پیش گفتار بزرگترین بینوایی برای یک ملت نداشتن سرمایه و توانایی نیست، بلکه نداشتن آگاهی بر دارایی و داشتههای فرهنگی است که ارسیه گذشته است ولی میتواند راه گشای امروز نیز باشد. ایرانیان وارث گنجینه ای از اندیشه های تابناک و رفتارهای درخشانی از فرزانگان خود هستند. این اندوخته ها نه تنها در زندگی فردی بلکه در پهنه زیست اجتماعی می تواند در کشورگردانی و گیتیارایی راهکار شایسته و ابزار سزاوار در راستای بیرون رفت از بنبست کنونی زندگی همگانیمان باشد. اندیشه کشورداری باید از زمینه فرهنگ ملی هر سرزمینی بروید و ببالد. و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی باید بر های فرهنگی بومی بنا شوند تا آرمان‌های ملی واقعیت پذیر گردند هر دولتی که سیاستش و هنجارهایش بازتاب دهنده منش آرمانی سرآمدان ملتش نباشد ناگزیر به زوال است و در مسیر فروپاشی خود مردم را نیز به سوی گرداب بزرگی می‌کشاند پژوهش در گنجینه فرهنگی گذشتگان بایستی ما را به نوزایش و نوزایندگی برانگیزد. ایران زمین با پرورانیدن و بالندگی و فراگستری اندیشه های از گوهر و سرشتخیش به خود می آید و راهش را می نه با انبوهی از ترجمه های بیروه و از اندیشه های گوارش نشده و وارداتی بیگانه. برخی از این افکار و باورهای وارداتی با کمک فرومایگان و گاهی زورمندان در جرفای ذهنیت و روان جامعه فرو رفتند و به جای ملتی بیدار و سرزنده امتی درمانده و مرد دل در صحنه بر جای گذاشتند. سخن از جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی است؟ در این رنسانس فکری و اخلاقی، در این نوزایندگی ایرانی و در این رستاخیز فرهنگی در پی آن نیستیم که همانند دیگری بشویم و یا برای بازگشت به هزارهای کهن دست و پا بزنیم. باید خود ایرانیمان را بشناسیم و از آنجا خود آیندهمان را پیدا نماییم. آینده مقصد از پیش تعیین شده و روشنی نیست که ما باید جاده ای را بپیماییم تا به آن برسیم بلکه این ما هستیم که آینده ایران را می تعریف نماییم و با بیکارگیری ابزار بایسته به سوی آن روان شویم هدف از نوزایی ایرانی بازگشت به گذشته نیست آماج یاری گرفتن از سرمایه های معنوی روزگار کهنمان برای ساختن امروز و فردایمان است. اندیشه و منش ایران شهری کوهن گشته است ولی کهنه نشده است. هدف بهرهگیری از مساله ساختمانی سازه های استوار برازنده و آبرومند کهن برای ساخت بناهای نو ساز امروزی با شکوه و مهندسی ساز است. آن مساله ساختمانی فرهنگ ایران شهری است و آن سازه های کوهن ولی آبرومند استوار ایران پیش از اسلام است. برای آنکه بتوان به ناشکفته و گم شده را در تاریخ پرفراز و نشی به سرزمین خود بازیافت، بایستی در آغاز سراسر باورهای تحمیلی و تلقینی در ذهنیت خیش را قربال نمود و از مغز و روان خود شست، خردورزی ریشهای با شکستن بوتهای مقدسی که در نزد ما حقیقت راستین پنداشته شده اند آغاز می شود. هر باوری در اجتماع با گذار از دالانهای دراز و تو در توی تاریخ بارامی در نهاد انسانها ریشه میدواند و نیرومند می گردد که برای گسستن از آن باور تنها رد کردن خیردمندان و اندیشمندانه آن بسنده نیست چون در جرفای روان آدمی لانه کرده است زمانی می توانیم مناسبات چیره بر انجمن انسان ها را دگرسان کنیم که درباره پایهای آن مناسبات و دلایل نهادینه شدن آنها روشنبینانه و هوشمندانه بیاندیشیم رویارویی با باورها و اعتقادات سنگواره در هر اجتماعی به استقلال فکری آزاداندیشان و بیان دلاورانه آنان نیازمند است و این بدان معناست که ما باید از پندارهای حقیقت انباشته شده خیش رها شویم تا آنها زندان ابدی ما نشوند سرخوردگی ها و شکست های پی, پی نیاز به یک چرخش بنیادی فلسفی را برای ما پیش آورده است. نوزای ایرانی تنها پیشنهادی برای بهتر نمودن شرایط زیست جامعه ایرانی نیست. یک ضرورت است برای ماندن و نیک ماندن. باید آینده آرمانی را با خرد جمعی اصحان توسعه یافته سرامدان جامعه ایرانی ترسیم نماییم. ریشه گرفتاری های کلان ملت کشور ما فرهنگی است. زوال اندیشه و افت اخلاقیات با خود انحطاط سیاسی و فساد گسترده اقتصادی را به همراه آورده است. وضعیت ما در دویست سال پیش یا چهارصد سال پیش بهتر از امروز نبوده است. این گذشته اندوهبار و آن گذشته نچندان شاد باید ما را به خود آورد که گرفتاری ملی ما، بس بنیادین و ژرف است با زنده باد و مرده گفتن هم پایان نمی گیرد گذشته را از پیامتهایش نمی توان جدا نمود بی آن گذشته چنان پیامتهای هم دامنگیر چندین نسل ایرانی نمی شد از خود بیگانگی به معنای دور شدن و بیگانه شدن نسبت به تاریخ و هویت خود است جامعه وامانده از شناخت خود تکه پاره شده آشفته حال و بیمار رو به مرگ است. جامعه ای است که دوست و دشمن را به درستی نمیشناسد و صلاح و فساد را نمیتواند از هم تمیز دهد. افلاطون بر این باور بود که هیچ بحران سیاسی وجود ندارد که نشانه نشانههایی از بحران فلسفی در ژرفای آن نباشد. بنابراین به این نتیجه رسید که اصلاح هیچ کشوری جز با بهبودی زیر بناهای فکری مردم آن کشور انجام پذیر نخواهد بود. پس تنها بودن اراده استوار برای به سامان کردن کارهای کشور کامیابی آن را انجام پذیر نمی کند. باید همزمان با آن به بحران فلسفی پدید آمده در جامعه نیز پرداخت و برایش راه کاری یافت. ایران ما با بحران فلسفی روبرو شده و برای رهایی از آن بنبسته کنونی نسخه سیاسی یا درمان اقتصادی بسنده نیست. باید به سراغ نگرش ایرانیان به مقوله‌های های بنیادین زندگی فردی و همگانی رفت تا با بازنگری آنها علت درد را پیدا کرد تا به توان درمانی برایش یافت. می گرانیگاه اندیش ورزی و جهان آرایی برای سامان دادن به ایران کنونی و ایران آینده را در فرهنگ ایران شهری بیابیم. گرچه نام ایران شهر تا جایی که ما می دانیم نخستین بار توسط اردشیر پاپکان بنیانگذار ساسانیان به کار گرفته شد ولی اندیشه های ایران شهری به هیچ روی محدود به ایران ساسانی نمی شبند. درست است که ایران شهر تاریخی در پیش از ساسانیان با این نام شناخته نمی شده است ولی جهانبینی روشن، سامان اقتصادی کارآمد هنجارهای اخلاقی پسندیده و اصول برتر کشورداری در نزد فرهیختگان قوم ایرانی برگرفته شده از همان اندیشه های برجسته و دیرپای تبار ایرانی آن روزگاران کهان بودند. در این دفتر این مجموعه را با آنکه بخش بزرگی از آن در پیش از ساسانیان ریخته شده بود اندیشه های ایران شهری مینامی این اندیشه ها نه تنها در زمان دودمان های شاهی پیش از ساسانیان نیسورغ گرفته می شوند بلکه با کندوکاف در دودمان نیمه تاریخی کیانیان دوره پیشدادیان و عصر اسطوره ای تفکر ایرانی نیز بخش های چشمگیری از این اندیشه های ارزنده را میتوان بازیافت. فرهنگ ایران شهری را که در این دفتر با آن خواهیم پرداخت مجموعی از اندیشه ها و منش است که برای صده های دراز در روزگاری که ایرانیان در جهان سرفرازی می کردند و سرآمد و پیشتاز ملت های بسیاری بودند، ستون استوار جان و روان تبار ایرانی بود. فرهنگی که ایرانیان را در آن روزگاران به فراز تاریخی خیش برده بود و آبشخور آین و منش آنان بود در اوستا متون کهن پهلوی سنگ‌نوشته‌های حخامنشی و ساسانی و صد البته در شاهنامه میتوان جست فرهنگی که بر بنیاد آموزههای های برجسته و زندگی سازی چون خردگرایی، دادگستری، آبادسازی، رواداری، آزادگی، شادزیستی و دهشمندی استوار بوده است می بار دیگر برکشیده شود تا روان ملی ما را بازسازی نماید و ما را از این بنبست تاریخی که گرفتارش هستیم رهایی بخشد پانویس، در حالی که آموزادگان ما هندیان به بیعملی و درونگرایی افراطی و گوش نشینی گرایش داشتند و با ذهنیت سرخم نمودن در برابر سرنوشت و رخدادهای پیرامون خود در هر رویداد از پیش بازنده به شمار می آمدند، ایرانیان به دلیل برخورداری از آموزه های در راستای داشتن اختیار و آن، مسئولیت سازنده بزرگترین شاهنشاهی آن روزگار یا خامنشیان در خاور نزدیک و خاور میانه گردیدند. همچنان که گفته شد از فرهنگ ایرانی که آبشخورش ایران کوهن بود و در برگیرنده جهانبینی ایرانی منش و اندیشه های ایرانی بود به فرهنگ ایران شهری یاد می شود. پس این فرهنگ ایران شهری با فرهنگ کنونی ملت ایران که از آن فاصله گرفته است نباید اشتباه گرفته شود. فرهنگ ایران شهری مانند هر فرهنگی در برگیرنده دو معنلفه است، اندیشه و منش. پس برای شناسایی فرهنگ ایران شهری، اندیشه های ایران شهری و منش ایران شهری باید بازیابی و بازخانی گردند. پانویس فرهنگ را مجموعه پیچیده از باورها، منشها، هنرها، سنن، دانشها، ادبیات، آدات و هرچه که فرد به عنوان هموندی از جامعه از آن فرامی میگیرد و یا دریافت می نماید تعریف می کنند. فرهنگ توسط آموزش و همچنین مشاهده از نسلی به نسل پسین منتقل می شود. فرهنگ پدیده است که خود را با نیازهای اقتصادی زمان، با محدودیتهای سیاسی و شرایط اقلیمی سازگار می نماید. بنابراین فرهنگ بر خلاف هویت پدیده ای ثابت نیست و با زمان و مکان در درازای زمان می تواند تغییر نماید و زیر تأثیر سیاست و اقتصاد دگرگون گردد. اندیشه های ایران شهری در یک جا و در یک زمان در گذشته های دور و یا اکنون نوشته نشده اند. آنچه در دسترس است، دستمایه همچون شاهنامه، بخش های از اوستا متون پهلوی سنگ نوشته های حخامنشی و ساسانی و اندرزنامههای های برجامانده از صده های نخستین هجری هند. باید با نگری در این هاست سرشت ایران شهر را دریافت و سپس دید که جهانبینی ایرانی و سامان ارزشی چیره بر ایران شهریان چه بوده اند؟ منش و نظام اعتقادی فرزانگان ایران زمین و همچنین اندیشه سیاسی اصول کشورداری باید مستقیما با بررسی متون و یا با خواندن میان خطوط دستمایه های بالا شناسایی و بازیابی گردند؟ سراشی به زوال در ایران پیامد دور افتادن از بینش ایران شهری و جایگزینی آن با آینها و باورهای بیگانه است. گرچه همه عناصر آینهای بیگانه ناگزیر ویرانگر نبوده اند ولی آمیختگی نگاه های هلنی، عربی، ترکی و مغلی و غربی نوین از سده های دور تا به امروز ما را دچار سردرگمی فرهنگی و آشفتگی اندیشه نموده است. ایران شهر ناچار نیست در میان چرختنده های بنیادگرایان اسلامی از و غرف آن از سوی دیگر گرفتار بماند. برای بازسازی اخلاقی، بهسازی اجتماعی و نوسازی اقتصادی و سیاسی نیاز به برگشتن به نگاه ایران شهری و مردریگی است که در گذشته ما را به فراز برده است و آزمون خود را پس داده است. روشن از زندگی و بدبستان های اجتماعی در زمان کنونی پیچیده از گذشته های کوهن شدهاند. بنابراین در راه نیکبختی و نوزایندگی میهن آنچه که در میراس فرهنگی بومی ایران زمین یافت نشود باید از دستاوردهای ارزندگ بشری دیگر تمدن ها و فرهنگ وام گرفته شود. در این زمینه نباید هیچگاه حقیقت و خردمداری مداری فدای تعصب و خوشکندیشی گردد. ایران تنها یک فرایافت جغرافیایی نیست بلکه سرشت فرهنگی و تمدنی درخشان ایرانی نیز داراست. هنگامی که یک دامنه جغرافیایی پیرامون یک اندیشه سامان میابد کشور شکل میگیرد. به زبان دیگر دولت به انگیزه وجود ایده و ضرورتی که در یک جغرافیا حضور یافته ساخته می شود و کشوری پا به پهنه هستی می گذارد. ای که ایران را از موجودیتی سرزمینی، نژادی و دینی به پرپایی یک کشور با همه معلفه های همراهش گسترانید و بالندن مود اندیشه ایران شهری بود. ایران کنونی و ایران شهر پدیده های همسان نیستند. ایرانشهر مفهوم گسترده از ایران کنوری را با خود به همراه دارد. نه تنها گستردگی جغرافیایی ایرانشهر شهر که اندکی بیش از فلات ایران بوده است که مهمتر از آن بار معنایی فرهنگی، آینی و تمدنی آن ایرانشهر را از ایران متمایز می نماید. ایران شهر افزون بربار جغرافیایی آن به عنوان یک مفهوم مینوی و انتزاعی، در یک مجموعه اسطوره‌ای، تاریخی، ادبی و هنری در شکلی دلکش و انسانی ترسیم شده است. کاوه، آرش، سیاوش، کیخسرو و رستم همان اندازه با آن داده ان که نوروز و مهرگان و صده و شب چله، کورش نمونه رواداری و مردم نیازاری آن است و داریوش آباد کننده و سالار سازندگی آن. فردوسی یک کتاز پهنه جان و خرد آن است و زرتوش آموزگار منش و بینش آن و با صده ها فاصله حافظ لسان به رموز و نمادهای آن می باشد. اندیشه ای ایران شهر که در میانه دوره اشکانیان دوباره از پس عبرهای هلینیسم یعنی یونانی گرایی سر برآورده بود و در آغاز دوره ساسانیان مکتب و مرام اردشیر پاپکان و یارانش شده بود در زمان خسروانوشی روان به فراز دیگری رسید. پانویس. ستایشی که ابن مقفع بزرگترین اندیشمند چهار صده نخست هجری از می میکند چنان است که جای گمانی برای ارزیابی مثبت این شاهنشاه برجسته ساسانی باقی نمیگذارد او میگوید آن پادشاه عادل بختیار و شهریار عالم کامکار انوشیروان کسرا بن قباد را از شعاع عقل و نور عدل بهره زیاد ارزانی داشت و در معرفت کارها و شناخت منازم آن رای سائب و فکرت ثاقب روزی کرد و افعال و اخلاق او را به تأیید آسمانی بیاراست تا همت به تحصیل علم و تتبع اصول و فروع آن مصروف گردانید و در انواع آن به منزلتی رسید که هیچ پادشاه پس از وی آن جایگاه را در نتوانست یافت. گردآوری تاریخ حماسی و اسطوره‌ای ایران در زمان انوشیروان زیر نام خدای نامه که دستمایه ساخت شاهنامه ها از جمله شاهنامه فردوسی بوده است انجام گرفت. سازی و بازنویسی حماسه ها و استوره های ملی و همچنین روایت ساسانی از تاریخ ایران کهن وامی بود که انوشیروان و بزرگان کشور به ایران شهر تاریخی داشتند و انصافاً در ادای آن کم نگذاشتند. همان خداینامه در صده پیشین دستمایه دهگانان فرهنگ پرور خراسان و سیستان برای ساخت شاهنامه عبو منصوری و سرانجام شاهنامه فردوسی شد. پیش از آن هم در زمان اشکانیان حماسه هایی چون یادگار زریران به انگیزه برافروختن شعله میهندوسی و پیکار آئینی با بیگانگان سروده شده بود که واکنشی به یونانی معابی سلوکیان و میراث یونانی اسکندر بود فروپاشی ایران ساسانی و آمدن اسلام به ایران بزرگترین گسست در زیست فرهنگ ایران شهری و بحرانی ژرف در شناسه ایرانی شناخته می شود. پس از فروپاشی ایران ساسانی تا روی کار آمدن صفویان با گسست ایران شهر به عنوان یک هسته سیاسی و حقوقی روبرو بوده ایم، ولی فرهنگ ایران شهری با وجود گوش نشینی و کمرنگ شدن بر جای ماند و در پاره زمانها بر تارک آسمان زندگی ایرانیان درخشید. روح ایران شهر یا همان مایه شناسه ایرانی در همه چهارده صده گذشته زنده بود و میشد از خیزش های سیاسی و دینی مانند سرخ جامگان و سپید جامگان گرفته تا جنبش های فرهنگی مانند شعوبیه و از شاهنام سرای دوران سامانیان گرفته تا فلسفه خسروانی صحروردی آن را دید و ستایش نمود. نهال شناسه‌ی آریایی که پیش از هخامنشیان در این آب و خاک کاشته شده بود، در زمان ساسانیان به درخت تناور هویت ایرانی تبدیل شد. این درخت سال با وجود زخم‌های سهمگینی که در درازای این 1400 سال خورد، بر جای ماند. آموختن از گذشته ایران و نیرو گرفتن از بخش تابناک آن که با خودستایی و برتریجویی نسبت به دیگر ملت ها تفاوت دارد، تنها یک نیاز روانشناسی برای ملت شکست خوردهی نیست که نمیداند شمسار بودن در چنین شرایط دردناکی را باید به کجا برد؟ راهکاری برای نهیب زدن به خداگاه ملی است که پیش از زوال کامل به خود بیاید و به دنبال درمان باشد. هرچندنین زمین خوردگی و فلاکت شرماور اگر پیشینه درخشان ایران به یاری بیاید و دمی احساس والایی را در خداگاه ملت بیدار کند، از آن نمیباید به کنایه باستانگرایی و یا شوونیسم روی برتافت. به هر حال در این روزگار نیمی از زیست ملی ما در گذشته خودمان و نیم دیگر در جهان امروز به سر می برد. آماج فرایند ایران شهری شدن برپایی رستاخیزی درونزا در جامعه ایرانی با ابزار و مساله بومی یا همان فرهنگ ایران شهری است. میراسی که به عنوان فرهنگ ایران شهری از آن نام میبریم هم گوهر و مایه این رستاخیز را داراست و هم به دلیل ایرانی و بومی بودنش ایستادگی و کارشکنی پایگاه های کنونی سنت در جامعه را کاهش میدهد. چون این گونه نوزایش ایرانی آبشخور بیرونی ندارد، حساسیت‌ها و اتحام هایی همچون تهاجم فرهنگی و قربزدگی درباره آن مطرح نخواهد شد. توشش برای شناسایی فرهنگ ایران شهری که پای در اصر باستانی کشور داشت در باخترزمین زمین با ایران شناسی مدرن آغاز گردید. دانش ایران شناسی با انتشار برگردان فرانسوی گاتهای زرتوش توسط آنکتیل دوپران در اروپا پا گرفت و پس از جلب شمار بالایی از اندیشمندان و فراسفه در نیمه نخست صده بیستوم به اوج خود رسید. بدین گونه از آغاز ایران شناسی و زرتشت پژوهی با هم گره خورد و این جای شگفتی هم نداشت چون فرهنگ ایران شهری و های زرتشت نیز در مواردی از هم تمایز نیافتنی است از آنجایی که جهانبینی بینی زرتشتی و نگاه ایرانی به های زندگی هستی انسان میهن داد خرد و غیره در هم تنیده اند مشخص کردن اینکه ان سور خواستگاه ایرانی و یا زرتشتی دارد در خیلی موارد سخت و یا نشدنی است و زمانهایی هم اصولاً این جدا سازی بی است البته یاداوری می‌شود که فرهنگ ایران شهری از آموزه‌ها و بینش زرتشت خوراک گرفته ولی از سوی دیگر خود زرتشت فرزند همین فرهنگ و بالنده و بزرگ شده همین سرزمین میباشد بنابراین اگر در دامنه بررسی فرهنگ ایران شهری از دستمایه زرتشتی بهره گرفته می شود، نه به معنای ترویج کیش و مذهب ویجهی که به دلیل در هم آمیختگی این دین ایرانی با عرف ایرانی که پاسدار میراس این آین در درازای تاریخ بودن می باشد. نیاز به یادآوری است که فرهنگ ایران شهری از دیگر اجزای سازنده ایران شهر نیز بار و نیرو گرفته است و به هیچ روی محدود به آموزههای های نمیشود. در روزگار ما خلای فلسفی و اعتقادی پیش آمده در کشور دیده شد و کوشیده شد پیش از آن که این کمبود دشواری ساز شود راهکاری برای آن یافته شود. محمد شاه خلع ناشیه از نبود یک نهاد پردازنده جهانبینی ایران شهری را در کشور حس کرده بود و شاید برای جبران آن با راهاندازی انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه ایران همراهی نمود. این انجمن با تشویق هانری، کوربن و سرپرستی حسین نصر و با همکاری افرادی چون مهدی محقق داماد، مرتزا متحری، محمود شهابی و چند تن دیگر برپا شد. از همان ترکیب آغازین این گروه می شد دریافت که فراخوانده شدگان با دستور کاری که برایشان نوشته شده همخانی ندارند. این نهاد به جای شناساندن و برکشیدن میراث اندیشه و جهانبینی ایرانی که انگیزه نخستین برامدن آن بود به گسترش و نشر آثار عرفانی و اسلامی پرداخت. یکی دو سال پیش از انقلاب اسلامی در همان راستا مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها با چهره مانند داریوش شایگان و احسان نراقی و پشتیبانی شهبانو فرح بنیاد گذارده شد. نظریه پردازانی که به شهبانو و نخست وزیر کشور نزدیک شده بودند و از پشتیبانی آنان برخوردار بودند نه تنها مکتب ایران شهری را هموارتر از پیش ننمودند بلکه خود آنتیتز میراس مانده از اندیشمندان پیش از مشروطیت و عصر رضا شاهی شدند. اینان خواسته و یا ناخواسته کوشش های 50 ساله ای ایرانگرایانه پیشینیان خود را در پای نگاه های مصحب زده خیش قربانی کردند. پانویس جالب است که پس از انقلاب اسلامی بازجوی احسان نراقی به او می‌گوید که تودهی سال‌ها سالها به ما القا کرده اند که شما تئوریسین رژیم شاه بوده اید پس از خوندن آثار شما مانند قربت غرب، آنچه خود داشت و تمع خام، حالا فکر می کنیم شما تئوریسین یعنی ما هستید. بر برپایی کتاب اقبال ناممکن احسان نراقی در هزاره نوین قدرت های جهانی برای نگهداشت چیرگی سیاسی و اقتصادی خیش آشکارا به درون دامنه فرهنگ چنگ انداختند. در کارزاری که این بار نه دولت نیرومند، بلکه شرکت های چند ملیتی قولاسا برای کنترل بر منابع و سرمایه های جهان آغازیده اند، به نام استعمار فرانوین زاده شده است. استعمار فرانووین بر پایه چیرگی ناپیدای استعمارگر پیریخته شده است، ویرانسازی شناسه های ملی از راه یکسانسازی فرهنگ و جهانی کردن بازرگانی، فن آوری، هنر و فرهنگ از آزارهای استعمار فرانوین است. فرهنگ به اصطلاح جهانی که هدایت شده و هدفمند، ساخته و پرداخته شده است، آماجش کنار زدن فرهنگ های بومی و ناتوانسازی شناسه های ملی برای پیشبرد راهبرد راه برد یکسانسازی فرهنگی در جهان است. شایان است که این روند هیچ پیوندی با گفتگوی تمدنها که روی کردی در خور برای کاهش تنش‌ها و کشاکش های ملی و است ندارد. یکسانسازی فرهنگ در پی ستروند کردن افمولت و توهی کردن آنان از خیشتن خود است تا به جای استادگی ملی گواه بیخیالی و بیغیدی مردم باشیم. اینگونه نه تنها حساسیت های افکار همگانی، نهادهای ملی و پارلمان های کشورها به منافع ملی بیرنگ رو رومی شود بلکه برخی از چلحه های کلیدی آنان نیز برای سود پرستی و مقام پرستی به زیر درفش شبکه های بزرگ شرکت های بیملیت در می آیند. همگرایی در کانونهای فراورش و پخش فراورده‌های فرهنگی و هنری با بکارگیری دستگاه دستگاه‌های تبلیغاتی بسیار پیشرفته و امروزی از ابزارهای توهی کردن ملت‌ها از داشته ها و توشههای تاریخی خیش هستند استعمارگران فرانوین با شعار جهانی شدن به جهانی سازی هویت پرداختند نخستین گام در روند جهانسازی هویت شتاب دادن به فرایند از خود بیگانگی فرهنگی و کاستن از وابستگی به میهن و هم میهنان است. گرچه جابجایی مردم از خاور به باختر زمین تا اندازه به فرایند کمرنگ شدن شاخصه ملی کمک می کند ولی جهانی سازی به دنبال آن است که بدون مهاجرت مردم وابستگی های میهنی را به آرامی سست نماید تا سرانجام ناپدید گردند. برخی از روشنفکران و تحلیلگران پدیده جهانی شدن را بیشتر بر بنیاد فرهنگ و اثرات اجتماعی آن بررسی می نمایند. جهانی شدن فرهنگی بر جهانی شدن اقتصادی و سیاسی چربش دارد. رشد فضاینده فناوری رسانه ها، اینترنت و ماهواره به از میان رفتن فواصل زمانی و مکانی می انجامد و یکسانی فرهنگی کشورها را به همراه خواهد آورد. در این برنامه، فرهنگی که باید چیره گردد نه فرهنگ است نه فرهنگ فرانسوی یا فرهنگ ملیت مشخص دیگری. فرهنگی را که میخواهند در سر و منش بیعتنائی به ریشه های سرزمینی، بابستگی های و تاریخی و منافع ملی است. در حقیقت شناسه های ملی ایرانی، ژاپنی آمریکایی روسی، ایتالیایی و غیره با بیهویتی جایگزین خواهند شد همین بلا بر سر کشورهای غربی هم میآید و با دو موج بزرگ جهانی شدن و مهاجرت ملتهای خاوری یعنی چینیان هندیان و مسلمانان آنان نیز دچار یک دگردیستی می میشوند که در میان مدت خاموشی خداگاهی ملی و به دنبال آن به از دست دادن پایداری در برابر طوفان جهانی شدن خواهد انجامید با کنار زدن مانع بزرگی به نام شناسه ملی و سطر بند کردن ارق ملی راه برای استعمار فرانوین بسیار هموار میگردد. مردم کشورهای گسترش یافته از جمله آمریکا نیز خود هدف استعمار فرانوین قرار گرفتند. گروههای سرمایدار و رسانهدار نیرومندتر شده و توان تاثیرگذاری بیشتری بر روی دولت‌ها و پارلمان‌های جهان خواهند داشت. فراموش نکنیم که از عصر استعمار دولت گذشته و بازیگردان های کنونی سیاست و اقتصاد در جهان شرکت های سرمایدار بیملیت هستند که تنها نگرانیشان افزایش سرمایه و سود و کنار زدن رقیبان توانا از صحنه هستند. اینجا دیگر ستم یک کشور به کشور ناتوانتر در میان نیست. ستم محفل های نیرومد و توانگر بازیگردانان بزرگ اقتصادی به شهروندار همه جا و همه کشور هاست. بنابراین، جنبش رونسانس ایرانی بر پایه مکتب ایران شهری نه تنها به دنبال راهکاری برای برون رفت از بنبست کنونی جامعه ایرانی که فراورده زوال اندیشه و از خود بیگانگی می میباشد بلکه میکوشد در این بزنگاه تاریخی و برپای نظم نوین جهانی دیگری برای چیرگی توانگران بر ملتهای جهان از جمله ملت ایران سپر پدافندی کارآمدی برای نگهداشت شناسه ایرانی و داشته های فرهنگی آن باشد اندیشه سیاسی ایران شهری که این دفتر پیش درآمدی بر آن از دیدگاه نویسنده این سطور می باشد، دارای گنجینه واژگان خیش می باشد، مانند شهریاری، فر دین داد و از این دست باید در فضایی که در هزاره های کهن به کار رفتن دریافت شوند ولی برای بهکارگیری در دامنه واژگان این روزگار با فرایافتهایی یا مفاهیمی سزاوار در ذهن خاننده جایگزین گردند برای نمونه شهریاری که در متون کوهن آشکارا به حکومت شاهنشاهی اطلاق می شده برای امروز می تواند برابر با دولت یا گابرمنت و یا دولت ملت یا نیشن استیت انگاشته شود در این روزگار این دولت می دولت شاهنشاهی باشد یا نباشد مهم مغز اندیشه کشورداری و گیتیارایی در نزد فرزانگان ایران زمین بوده است که کوشیده شده در این دفتر در اندازه توان نگارنده بازیابی و بازگو شود کوشیده شده که جستارها تا جای ممکن به زبان روز و پارسی ساده نوشته شود و از گونه نوشتار ویژه و تخصصی پژوهشگران تاریخ باستان کمتر بهره گرفته شود تا دریافت سخن دشوار نگردد. به هیچ روی ادعایی بر این نیست که آنچه گفته می شود سخن بدون کاستی و فرجامین می باشد. امید است که این پیش درآمد به پیش آمدن کشاکش های فکری و گفتگوهای سودمند در راستای گشوده شدن در اندیشه سیاسی ایران شهری به روی علاق مندان بی ایران شهر و یادمان آن ایران شهر تاریخی بند نخستین این نام ترکیبی ایران از واژه عوستایی ایرینم آمده است ار به چم یا معنای پاک نجیب و آزاده است همچنین در برگردان عربی نامه تنصر نیز مردم ایران شهر با صفت خازان خوانده شده بودند که یادآور واژه ار به معنی نجیب و پاک بود یکی از سرآمدان جنبش شعوبیه بشار بن برد تخارستانی که زیباترین های ایران دوستانه را به زبان عربی برای رویارویی با تحقیر کنندگان ایران سرود و جانش را نیز بر سر این راه گذاشت در چکامه هایش از قوم ایرانی به نام بنی احرار یعنی فرزندان آزادگان یاد میکند این نیز اشاره است به معنی ریشه‌ای واجه ار و آریا در زبان سانسکریت و اوستایی که برابر با آزاده و شریف می باشد. در شاهنامه نیز در چندین بیت واجه آزادگان به جای واجه ایرانیان نشسته است. از آزادگان این نباشد شگفت. ز ترکان چونین یاد نتوان گرفت. مرا پشت زازادگان است راست دل روشنم بر زبانم گواست. در واجه ایران بند واجه آن پسوند مکان است. پس ایران به معنی سرزمین پاک یا سرزمین شریف است. از سرزمینی که خواستگاه نژاد ایرانی بوده است با ایریانا یا ایرانویچ نام برده می شود. ریشه این نام مرکب را ایرینا ویجه میدانیم خود ویجه به چم گهواره زادگاه و کانون میباشد برابر این واژه در زبان سانسکریت که مادر همه زبان های ایرانی است بجه است که به معنی بزر نخستین یا نطفه آغازین است این ایران ویجه در سانسکریت به گونه آریا ورته پدیدار میشود گرچه بیشتر پژوهشگران ایران و یاجب را در سرزمین های پیرامون دریاچه خارزم جستجو می کنند ولی بندهش جایگاه آن را در آذربایجان می‌داند. بر پایه اسطوره‌های ایرانی هور مزدا به زرتشت میگوید. من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هرچند بس رامش بخش نباشد، به چشم مردمانش خوشآید. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم، که به چشم مردمانش خوشاید همه مردمان به ایران ویج روی میآورند. از اینجا اینگونه دریافت می شود که در نزد ایرانیان سرزمینی که خواستگاه آنان بوده است بهترین و برترین بوم و بر در همه جهان بوده است بخش دوم واژه ترکیبی ایران شهر واژه شهر در زبان ابستایی خشترا و در پارسی باستان خشسه بوده است در پارسی میانه یا پهلوی خشتراپ و همچنین به گونه پدیدار شده است این واژه هم به معنی کشور و هم به معنای شهریاری نیک است بر این پایه ایران شهر هم می میتواند کشور ایران و هم شهریاری نیک ایران معنا دهد در سنگ شاپور یکم در کعبه زرتشت در نسخه پارسیک یا همان پهلوی ساسانی ایران شهر و در نسخه پارتی یا همان پهلوی اشکانی آریان شهر آمده است. در نسخه یونانیش واجه بکار رفته است که باید برابر با انگلیسی استیت باشد. پس ایران شهر دولت ایران هم معنا میداده است. واجه ایران شهر به گونه آریانام خشت را در سنگ های حخامنشی یافت نمی شود، هرچند در یشتهای اوستا به صورت اعیریا دا بیو به معنی سرزمین آریایی پدیدار می شود. خود مفهوم کشور که بسیار والاتر از مفاهیمی چون مملکت است و به مجموعی سرزمین ملت و دولت موجود در آن گفته می شود ساخته ی اندیشه ایرانی است. در انگلیسی نزدیکترین عبارتی که برای آن میتوانی یافت است که آن هم دقیقاً بار معنایی کشور را با خود ندارد. تاریخنگاران و اندیشمندانی چون ویلدورانت، فیلیپیانی و نیز مفهوم کشور را فراورده ای ایرانی می دانند. این فرایافت که از ایران به روم راه یافته بود از راه امپراتوری روم به باختر زمین رسید و در صده های 18 و 19 میلادی شالوده پدیده دولت ملت گردید و به بارسترین ویژگی سیاسی و جامعه شناختی آن دوران اروپا بدل شد. در یارش های اوستا که بخش های از آن حتی کهنتر از گات ها میباشند ایران هم به عنوان نام سرزمین و هم به عنوان هویتی نژادی و تباری آورده شده است درباره سرزمین های ایرانی در بند چهارم مهر یشت نوشته شده است میستاییم مهر دارنده دشتای پهناور را او را که به همه سرزمین های ایرانی، خانمانی پر از آشتی، پر از آرامی و پر از شادی بیبخشد. در اینجا نام ایران آشکارا جغرافیای معینی را دربر بر میگیرد. در یاد دیگری از نام ایران در بند ششم تشتریشت میخانیم. میستاییم ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تشتر را. انتون تازه به سوی دریای فراخ کرد را به سان آن تیر در هوا پران پر تیری که آرش تیرانداز آن بهترین تیرانداز ایرانی پرتاب کرد در اینجا ایرانی بودن همانند یک فرایافت تباری و نژادی به آرش کمانگیر داده شده است فرایافت کشور در برگیرنده ی معنای دولت نیز میباشد با کشور بدون دولت فرمان روا و راهبر معنا نمییابد. هگل نقش ایرانیان در فراهم نمودن دولت سزاوار و شایسته در تاریخ را به روشنی بیان نموده است. او با نگاهی به ایران هخامنشی درباره سهم ایران در ارائه دولتی ارزنده و کارآمد مینویسد. از دیدگاه سیاسی ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از اناسور ویجهی فراهم می آیند. در اینجا نژادی یگانه مردمان بسیاری را دربر می گیرد ولی این مردمان فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند. این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین پدر شاهی و نه همچون امپراتوری هند ایستا و بیجنبش و نه همچون امپراتوری مغل زود گذر و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش برستمگری است. وارون آن، در ایران، مردم و گوناگون همچنان که استقلال شخصی خود را نگاه می‌دارند، به یک کانون یگانگی وابستند که می‌تواند آنان را خوشنود سازد. از این رو، شاهنشاهی ایران روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذارده است و شیوه پیوستگی بخشهای آن چنان است، که با مفهوم راستین کشور یا دولت بیشتر از امپراتوری دیگر همخانی دارد بالندگی فرایافت ایران شهر خود فراورده یک روند دراز مدت تاریخی است که دست کم از نخستین دهه های ایران حخامنشی ریشه می‌گیرد. آنجایی که داریوش یکم در سنگ نبشته بیستون از اهورا مزدا می خواهد که کشورش را از دشمن، خشکسالی و دروغ در امان نگاه دارد. در آنجا داریوش و جانشینش یعنی خشایاشا آگاهی خیش را بر وابستگیشان به یک تبار قومی معین یعنی همان قوم پارسی و یک نژاد مشخص یعنی آریایی روشن می نماید. در سنگ نبشته کعبه زرتوشت شاپور یکم از سرزمین های ایران شهری سخن می گوید که افزون بر ایران و افغانستان کنونی میان رودان یا بین و نهرین، قفقاز، بخشی از شپقاره هند و فرارود یا ناحیه میان آمودریا و سیردریا که ازبکستان و بخشی از تاجیکستان امروزی را دربر می را نیز در دل خود گنجانده است. جالب است که در سنگ یک کرتیر که از موبدان بسیار نفوذ در دوره بهرام یکم و دوم بود، قفقاز که عمدتا مسیحی نشین شده بود از زمره ایران شهر بیرون گذاشته شده و به فهرست سرزمین های انیرانی افزوده شده بود. در نوشته های گردآوری شده زرتشتیان در صده های نهم تا دوازدهم میلادی مانند دادستان دینک و یادگار زریران ایرانی بودن با زرتشتی بودن یکی انگاشته شده است و از غیر زرتشتیان به ایرانیان یاد شده است از سوی دیگر در برخی دیگر از متون زرتشتی مانند کتاب سوم دین کرد، غیر زرتشتیان ایران زمین نیز ایرانی شناسایی می‌شدند. از میانه دوره ساسانی که دولت ایران با پرپایی کلیسای فراگیر و نیرومند نستوری که مستقل از روم شرقی بود، خیالش از بابت وفاداری مسیحیان ایران، اُسودگشت گوهر ایران شهری فراتر از باورهای زرتشتی نشانده شد و ترسایان یهودیان و بودایان که قانون داد کشور را پذیرفته بودند نیز به زیر چتر آن درآمدند. بدین گونه همگی شهروند ایران شهر به شمار آمدند. ایرانی بودن از دیدگاه دینی و حتی قومی فراتر رفته بود و به همه مردم ایران بزرگ اطلاق میشد. بنابراین همه زرتشتیان البته ایرانی بودند ولی برای ایرانی به شمار آمدن زرتشتی بودن یک پیشنیاز نبود. در زمان انوشیروان رهبر ترسایان به عنوان ایران کاتولیکوس دست یافته بود که نشان از به شمار آمدن مسیحیان در جرگه ایران شهر و پذیرفته شدن غیر زرتشتیان در زمره ایرانیان بود. در همین راستا بود که در سده نهم میلادی یعنی 200 پس از فروپاشی ساسانیان بر روی تابوت یک مسیحی که از ایران به قسطنطنیه رفته بود و در آنجا درگذشته بود بر پایه درخواستش نوشته شد نام من فروخ گور است که از دیار ایران شهر آمدم در همین پیوند بر روی تابوت یک ایرانی مسیحی که در استانبول کشف شد، این گزاره نوشته شده بود. خرداد، پسر هرموز آفرید، از ایران شهر، روستای چالگان، ده خشت. این نشانگر آن است که مسیحیان، یهودیان و بودایان در کنار زرتشتیان، منش ایران شهری و شناسه ایرانی را دارا بودند و آن را فصل مشترک خود با دیگر مردم ایران زمین می‌دانستند. در همان سده نهم میلادی یعنی در سال 840 میلادی هنگامی که افشین اشروسنه را برای کیفر دادن به پیشگاه خلیفه عباسی بردند یکی از موارد اتهامش را تبلیغات ایرانگرایانه یا علعجمیه عنوان نمودند افشین که ریشه از بودایان بلخ بود وانمود میکرد که مسلمان شده است پذیرش تبلیغات ایرانگرایانه از سوی افشین نمایانگر وجود خودآگاهی ملی و وابستگی به ایران شهر در نزد بخش بزرگی از ایرانیان حتی غیر زرتوشتیان بود. افسون بران، بنابر تلمود بابلی و برخی شواهد دیگر مانند آثار کنیسه دورا که از میراث فرهنگی قوم یهود می باشند، یهودیان کاملا با بقیه جامعه ایرانی آمیخته شده بودند. کلاه ایرانی بر سر میگذاشتند و کمربند می بستند. آنان از شهروندان ایران شهر به شمار می آمدند. در کتاب بندهش ایرانی از ایران شهر معنایی جغرافیایی و سرزمینی را دریافت می کنیم. جایی که می خانیم؟ چون منوچهر کشته شد، افراسیا بار دیگر بازگشت. گشت، ایران شهر را ویران ساخت و باران از آن باز داشت. در کتاب سوم دین کرد از گزندی که از سوی اسکندر به ایران شهر رسید و در کتاب چهارم دین کرد به کوشش های بلاش یکم عشقانی برای باسازی فرهنگی ایران شهر پس از ویرانگری های اسکندر و جانشینانش پرداخته شده است. در این دستمایه ها هم به روشن ایران شهر ساختار فرادینی و فراتیرهی دارد و به کشور بزرگ ایران گفته شده است. بر پایه اقلیم شناسی ایرانی پس از حجوم اهریمن زمین به هفت سرزمین بخش گردید. سرزمینی در میان خونیدرست، در عوستایی و در پهلوی و شش سرزمین دیگر که پیرامون خونیرس را فرا گرفتند. خونیرس سرزمینی پرفروغ درخشان و نیکی هاست، در نگاه اصوره ای ایرانی آفرینش نخستین انسان در همین سرزمین خونی خونیرست بوده است. خونیرس با واژه بامی همراه است. بامی به معنای درخشنده و تابناک می باشد. پل چینود که در اسلام به گونه تغییر شکلی پل سراج گر شد و شهر زیرزمینی جمشید، یا ور و البورسکو که ماهیت سپنتایی یا قدسی و کیهانی دارند در همین سرزمین خونیرست جای دارند و بدین گونه به این سرزمین که در میانه جهان جای گرفته است ماهیتی فرازمینی دادند خونیرست که واجه است در برگیرنده ایران شهر می باشد از اونگرمه همواره به عنوان آفریدگار ایران زمین نام برده می شود تا بر سپنتایی بودن این سرزمین پافشاری ای شود. سعالبی تاریخ نگار برجسته سده به پیروی از باور سنتی ایرانیان می نویسد که فریدون ایران شهر را که مرکز و میانه زمین و خط اعتدال و مهمترین کشورها بود از ناحیه خراسان و عراق و فارس و کرمان و احواز و گرگان و تبرستان تا حدود شام به ایرج و گزار نمود این میان بودن ایران شهر یا خونی رست در هفت کشور بیش از میانی بودن جغرافیایی تفسیر می شود و به پهنه آین و مرام نیز گسترش یابد. آنچنان که در آین اردشیر شیر می خانیم که در میان نیاکان ما مردمی بودند که کشور ما را میانه و دیگر کشورها را افراط و تفریتی می نامیدند. در توصیف مقدسی، نیز از ایران شهر میانه بودند و اعتدال خوی ایرانیان ستایش می شود. گویند معتدلترین و باسفاترین و بهترین بخشهای زمین ایران شهر است. درازای آن، میان رود بلخ یا آمودریا تا رودخانه فرات و پهنای آن میان دریای آبسکن یا مازندران تا دریای فارس و یمن و سپس به طرف مکران یا بلوچستان و کابل و تخارستان و تا انتهای آذربایجان است و آنجا برگزیده بخش‌های زمین و ناف زمین است به علت اعتدال رنگ مردم آن و استواری پیکرهایشان و سلامت خردهایشان ایرانشهر سرزمین فرزانگان و دانشوران است و ایشان بخشنده و بخشاینده و با تمیز و هوشمندند و هر خوی نیکی را که دیگر مردمان جهان از دست دادهاند اینان دارا هستند در شاهنامه نیز در جایی که ویژگیهای سه پسر فریدون تشریح می شود درباره ایرج که نماد عنصر ایرانیست است خانیم؟ دگر کهترین مرد با سنگ و چنگ که هم با شتاب است و هم باد رنگ ز خاک و ز آتش میانه گذید چنان ره حوش یاران گذید دلیر و جوان و حشیوار بود بگیتی جزو را نباید ستود کنون ای رجن در خورد نام تو در مهتری باد فرجام تو بدین گونه شناسه ای ایرانی که با نماد ایرج همراه می شود از آغاز با میان روی شکل می گیرد. میان روی میان اندیشمندی و احساس، میان دوراندیشی و دلاوری. ای پس از فردوسی، نظام الملک، سلطان سلجوقی همروزگاران خیش را به میان روی که سنت ملکان عجم بوده است، فرا میخواند انگامی که می نویسد دیگر وظیفه شاه میان میانروی و دوری از حرص و طمع و افراط و تفریط است. با گذشت زمان ایران و یجه برای آریاییان تنها یک جغرافیایی نبود بلکه سرزمینی مینوی یا غیر حسی به شمار می آمد که آرمان شهر رو سرزمین آمال و آرزوهای آنان شد. هفت اقلیم را بر ستارگان به ترتیب هفت گانه به ترتیبی که در فلک جای دارد تقسیم کردهاند. اقلیم چهارم یا ایران از خورشید است که به فارسی خورشاد است و از نام های آن آفتاب است و برج آن اسد است. این همان نگاهی است که برای ایران شهر سرشتی سپنتایی یا قدسی قائل می شود بهدانگوونه که جایگاه ایران شهر را جایگاه میانی و مکان خورشید میداند و شش سرزمین دیگر را سیاره دیگر منظومه خوشیدی یعنی تیر، ناهید، زمین، بهرام، کیوان و اورمزد می انگارد. همچنان که گفته شد شاید این در میان جای گرفتن ایران شهر گوش چشمی به نهادین شدن خوی میان روی در ایرانیان نیز داشته است. در این پیوند در کتاب چهارم دین کرد، درباره یکی از معانی پیمان، یعنی میان روی می که ایرانیان همواره میان روی را ستوده و افراط و تفریت را نکوهیدند. فیلسوفان در روم، دانایان در هند، آگاهان در جاهای دیگر، بالاتر از همه چیز زبدگی و چیرگی در گفتار را ستوده اند. فرزانگان ایران میان روی را پسندیدند. همچنان که گفته شد، در نوشتارهای ایرانی، ایران شهر در دایره میانی جهان جای گرفته و شش کشور دیگر به شکل شش دایره پیرامون آن را گرفتهاند. خواستگاه این ساختار می تواند عوستا باشد که در آن جهان در برگیرنده هفت کشور است. در بخش نهم بندهش ایرانی نیست همین بخش بندی دیده می شود. در بخش شانزدهم بندهش از 17 سرزمین در ایران شهر نام برده شده است که پر ترین و گرامیترین آنها ایران و یاجه است. بر پایه این بخش از بندهش دو سرزمین از میان 17 سرزمین ایران شهر دارای مردمان ان ایرانی هستند که یکی هندوستان، و دیگری سرزمین تازیان است ایران و یجه میهن تیره های ایرانی فرایافتی مینوی داشت که جلوگاهی از آرمان شهر ایرانی با همه آرزوها و ارزشهایش بود این سرزمین آرمانی از اسطوره بیرون آمد و در بزنگاهی از تاریخ دارای مرزهای جغرافیایی و سپس هستی سیاسی گردید این فرایند بسیار پیش از ساسانیان آغاز شده بود ولی با برامدن ساسانیان به پختگی و بالندگی رسید و نمود بیرونی یافت و حتی برای جهان انیرانی یا غیر ایرانی نیز مفهومی جا افتاده شد. از این رو برخی کارشناسان همچون جواد تبا تبایی نظریه ایران شهر را گفتاری از گوهر فلسفه تاریخ می دانند. در برخی از نوشته های ایرانی برای ایران ویژگی که معمولاً به جانداران داده می داده شده و به دینگونه ایران دارای جان و روان انگاشته شده است. یکی از این نمونه ها اشتاعتی عشق عوستاست که از آن مفهومی والاتر و پیچیده‌تر از مفهوم صرفاً جغرافیایی برای ایران دریافت می شود. فر ایرانی اهریمن پرگزند را شکست دهد. خشم خونین در افش را شکست دهد، دیو غفلت و خابالودگی را شکست دهد، یخبندان در هم افسرده را شکست دهد، دیو خوشک سالی را شکست دهد، سرزمین های ایران یا غیر ایرانی را شکست دهد. در برگردانی اندک متفاوت با آن، این گونه از فر ایرانی یاد شده است، اهورامزدا گفت که فر ایرانی را آفریدم تا به آسانی خرد به دست آورد بر آز پیروز گردد دشمن و اهریمن تبهکار را بشکند دیو خشم و خونریزی را بشکند و سرزمین‌های نایرانی نا را بشکند درود بر فر ایرانی در کتاب بندهش از آثار به جای مانده به زبان پهلوی که دارنده آگاهی‌های ارزشمندی از اسطوره‌ها و جهانبینی ایرانی است آمده است که هر سه سال شماری از انیرانیان یعنی غیر ایرانیان که بدخواه ایران هستند بر سر البورسکو گرد می آیند تا به ایران شهر آسیب و گزند برسانند ولی پرندهی به نام چمروش به یاری ایران می شتابد و آن انیرانیان را چون دانه هایی که توسط مرغان برداشته می شوند از سر البورسکوه برمی دارد و از میان می برد. بدین گونه آرامش خیال را به ایرانیان باز می گرداند. در همان کتاب گزارش می شود که پس از اینکه فر از کیکاووس دور گشت، ایران شهر به دست زینگاو که از تازیان بود و به شاهی ایران شهر رسیده بود و همچنین افراسیاب و تورانی ایران گشت تا اینکه رستم، با نجات ایرانیان و شکست دشمن به آبادانی ایران شهر پرداخت. آنچه برای ایران شهر رخ می نگرانی در ایرانیان پدید می آورد. آنگاه که افراسیاب بیرون رانده شد و کشور به زو واگذار گردید، ایران شهر مانند پیری رنجور بود. زو آن را در حالی که چون عروسی زیبا و رعنا گشته بود، به سپرد این از بخیلی دنیا بود که به کسی چون زو با همه بزرگواری و دادخواهی و نیکاهی برای مردم پنج سال پادشاهی داد و افراسیاب را با همه ستمگریها و بیدادها و بدکرداری ها که بر مردم و شهرها روامی داشت چهارصد سال شاهی داد اندیشه و یادمان ایران شهر آن اندازه در نزد مردم ریشه دار بود که سیندر مقدونی پس از اشغال ایران برای کاهش نگرانی ایرانیان و در پیامدش کاهش ناسازگاری آنان با فرمان روایی خودش ماندگاری ایران شهر را علیرغم از میان رفتن حخامن به ایرانیان مجده می دهد. بدانید که امروز دارا منم گرو شد نهان آشکارا منم، همان است ایران که بود از نخست بباشید باشید شادان دل و تندرست نگهداشت ایران شهر تنها از دیدگاه مرز و بوم شایان اهمیت نبود، بلکه از سرشت و گوهر ایران شهری آن نیز می باید پدافند می شود. از همان آغاز ایرانیان به تهاجم فرهنگی ان ایرانیان بدبین و بدگمان بودند و در پی راهکاری برای استادگی در برابر باورها و آینهای بیگانه برآمده بودند. در دین کرد نه تنها یک دولت و یک درفش در ایران شهر برپاست بلکه داد و آین ایرانی پشتوانه ماندگاری و شکوفایی آن است. هرگاه ایران شهر بون خود را خود رادارا باشد، که اینانند داد آریایی و آین مزدایی مهماندار مینوی نیکست. است. ایران شهر آراسته، ویراسته، پیراسته، پاک، زیبا و خوشبو و لبالب از شادمانی می شود. درست به مانند اندامی که از راه همه گونه خورش ساماندهنده میان روی به تندرستی پایدار رسیده باشد. هرگاه، پاره های بیگانه فرمان برانند که اینانند همه خویه های انیرانی و بدایینی ایران شهر آسیب دیده و آشفت کار و بدبخت و ریمن و گندناک و زشت و آکنده از رنج می شود. درست مانند اندامی که از راه همه گونه خورش سخت ناب سامان از گزاف خوری یا کمبود به بیماری دچار آمده است. نویسندگان کتاب دینکرد سوم همراهی آیین و قانون غیر ایرانی را به مانند خوراکی می دانند که به درون پیکر آدمی می رود و با آن هماهنگی ندارد و تن انسان با آن خوراک دچار کمبود یا افزایش بیرویه یه می شود که زیانبار است. به زبانی دیگر قانون و آینی نیکبختی کشور را به همراه خواهد داشت که ریشه و سرچشمش در همان سرزمین و سرشت مردمانش باشد. در آن دینکرد می افضاید که دلیل زبال و فروپاشی دیگر سرزمین ها نیز ناهماهنگی و گسست میان گوهر مردم با آینی که بر برانها استوارگشته بوده است. نمونه هایی چون مسیحیت برای رومیان، یهودیت برای ترکان خزری و مانویت برای ترکستان آسیای میانه نشانگر شکست تیره است که داد و آین بیگانه را برخیش فرمان روان مودند که بعض هم گسیختگی و فروپاشی آنان انجامید. در روایات پهلوی درباره کنگدش که سیاوش آن را ساخت و که آن را از تورانیان باز پس گرفت میخانیم که ساکنان کنگدش که در شادی و سربلندی و دینداری و پاکی به سر میبرند به ایران شهر باز نمیگردند مگر هنگامی که پشوتن پسر گشتاسپ و برادر اسپندیار و فرمانده کنگدژ آنان را برای جنگ با دشمنان ایرانشهر به دنجا کشاند ایران شهری که با وجود فر ایرانی از هستی یک جغرافیای بیروح بیرون آمده و جان و روانی یافته دقدقه و نگرانی پیبسته ایرانیان را به دنبال خود داشته است. بزامیاد یش رأفتانیز می توان نگاه کرد. آنجا که می گوید هرگاه ایرانیانی چون آجیده هاک، یا هاک و افراسیاب بر فر ایرانی دست یابند. دیگر نشانی از ایران و ایرانی و زندگی و آبادانی بر جای نخواهد ماند. در آبانیشت نیز افراسیاب با آوردن پیشکش از آناهیتا می که به آن فرک مال ایرانیان است دست یابد ولی آناهیتا او را در رسیدن به آرزویش کامیاب نمی کند. همچنین هنگامی که پسران ویسه تورانی از آناهیتا درخواست دریافت فر می کند تا سرزمین‌های ایرانی را یک به یک شکست دهند و بر زمین زنند، باز هم آناهیتا از دادن فر به آنها خودداری می‌نماید. بدین گونه ایران نه تنها از تیره ها و دودمان‌های ماندگار در آن که از سرزمینی سپنتایی و شاید هم اسطوره‌ای نام خود را دریافت نمود، بدینسان هستی و ماندگاری آن وابسته به هیچیک از دولتها و تیراهای چیره در کشور نبود هیچیک از دودمانها و تبارهای چیره بر ایران از مادها و حخامنشیان گرفته تا پارتهای اشکانی و ساسانیان به این فهرست میتوان کیانیان نیمه تاریخی را نیز افزود در پی گذاشتن نام خود بر روی این سرزمین نبودهاند ایرانی بودن در پناه یک شهریاری شکل نگرفته و ماهیت خیش را از دولت فرمانروا دریافت نکرده بود. وارون آن آگاهی از دریافت و شناخت هویت ایرانی در میان مردم این سرزمین بنیادی ترین پیوستگی و همبستگی آنان در زیر چتر نادیده ایران شهری بوده است. بدین دلیل نظامهای فرمانروایی خود را شهریاری ای که با ویژگی ایرانیش از جهان پیرامونش یا جهان ایرانی متمایز میشد میدانستند. بدین سان ایرانیان جهان را در برگیرنده دو بخش ایرانی و ایرانی میدیدند که همانند نگاه یونانیان به بخش نمودن جهان به یونانیان و بربرها یا غیر یونانیان بود. در بزرگترین فرهنگنامه و شناسنامه ایرانی، شاهنامه، ایران آشناترین نامی است که خاننده با آن رو می شود. واجه ایران بیش از هشت صد بار در سراسر شاهنامه آمده است. افزون آن شمارگان پدیدار شدن واجه ایرانیان نیز در این دفتر بسیار بالاست. برای ردیابی هویت ایرانی در اسطوره میتوان به داستان فریدون و پسرانش در شاهنامه نگاه کرد فریدون پیش از مرگش بر آن میشوَد که سرزمین‌های زیر فرمانش را میان پسرش بخش کند و پس از آزمودن آنان بهترین بخش از جهان زیر چیرگیش را که سرزمین ایران است به ایرج کوچکترین پسرش که نماد هوش و فرهنگ و رایه است واگذار می‌کند بدین گونه ویژگی‌های ایرج صفات عنصر ایرانی و فروزه‌های شناسه‌ی ایرانی می‌شود برادران ایرج یعنی سلم و تور که به او رشک می‌ورزند به چشم داشت چنگ انداختن به ایران ایرج را می کشند و کشمکش ها و دشمنی‌های ژرف و پیوسته میان روم و توران و ایران را پدید می‌آورند بدین سان فرایافت ایران با فرایافت ایران همزمان زاده میشوند و از همان نخست نگرانی دستیسه بیگانگان یا ان ایرانیان بر علیه ایران در جرفای یادمان همگانی ایرانیان جای میگیرد نخستین به درون بنگرید همه روم و خاور مرو را سزید. دگر تور رادا توان و چین، کرد سالار توران زمین از ایشان چونوبت به ایرج رسید مرو را پدر شهر ایران گزید. پس از کینگخاهی ایرج توسط منوچهر از تورانیان پشنگ به افراسیاب سفارش میکند که به توران کمای بسنده نکند که در آن جز شهرکی ناچیز نخواهد یافت به ایران شهر دست اندازد که آنجا است مایه سرفرازی و آنجا سرور و نخبه و نگین کشورها در مال و درآمد و گنج و مکنت است. اینجا روی دیگری از برجستگی ایران شهر در برابر رقیبانش آشکار می شود، پدیده شهرنشینی در برابر کوچنشینی. پشنگ به درستی دریافته بود که برای ساختن تمدن و برپایی دولت نیاز به یک جانشینی و بخش نمودن پیشه هاست. در کوچنشینی نمی توان رفاهی نمود و نه دولتی پایدار و تمدنی ماندگار. همچنان که پیشتر یاد آور شد در مهریش روستا به نام عیری و شاینم به معنای نشیمنگاه آریایی برمیخوریم. شینم از ریشه نشیمن کردن است یک جانشینی و کوچ نکردن از بار معنایی این واژه بسیار روشن است. بر بخش کیانیان شاهنامه نیز ایران فراتر از مفهومی تباری و دینی آمده است. برای نمونه که خسرو شاه آرمانی ایران پس از آرام کردن مرسای کشور و نوسازی ایران و فراهم کردن امنیت اجتماعی تازه به پایتخت نوین خود یعنی استخر فارس می تا تاج گذاری کند. به استخش شد تاج بر سر نهاد به جای کیو مرس و جای قباد شدا راسته ملک ایران بدو قوی گشت پشت دل ایران بدو در مقدمه شاهنامه ابو ابومنصوری که از کهن نصرهای نثرهای بر جای مانده زبان پارسی است نثرهای جغرافیایی ایران شهر این گونه مشخص شده و ایران شهر از رود آموی است تارود فرات و این کشورهای دیگر پیرامون اویند و از این هفت کشور ایران شهر بزرگ وارتر است به هر هنری. این قائل شدن بزرگمنشی و بزرگندیشی برای ایران شهریان در دفتر دیگری هم به چشم آید. علم به وقتی در مردمان یونان بود و ایشان در این فضیلت معروف بودند و ایشان را فهمهای تیز و هوش بود و پس از آن بگشت به مسلمانان و از بیش از هر قوم فضیلت در ایران شهر بود. مسعودی از هفت ملت بزرگ جهان و جلوتر از همه آنان از ایرانیان یاد کرده و زیستگاه ایشان را از بلاد جبال یعنی همدان، زنجان و کرمانشا، ونیز، آزرباجان و از ارمنستان و اران یا جمهوری کنونی باکو، و بیلغان و بند قفقاز تا خراسان و سیستان و دیگر مناطق جنوب و باختر برش مرده و از همبستگی زبانی همه این سرزمین ها سخن می گوید. عبوریهان بیرونی ایران شهر را نام جامعه همه سرزمین های ایرانی از عراق و فارس و جبال و خراسان شمرده است، هنگامی که در آغاز کارنامه اردشیر بابکان از بخشهای دویست و چهلگانه ایران شهر سخنرانده و اردشیر از خلیشتن به عنوان شاه شاهان ایران یاد می کند. نمای بسیار روشنی از بودن فرمانروایی‌های کوچکی در همبستگی ایران شهر بزرگ به ما می‌دهد که همسانی آنان در شناسه ایرانی آنهاست. این کار بزرگ اردشیر نپدی داوردن اندیشه ایران شهر که بر کشیدن و گستراندن آن از دامنه نژادی، فرهنگی و زبانی به دامنه سیاسی می باشد. خود واجه ایران نه تنها در عنوان اردشیر پاپکان شاهنشاه ایران نمایان می شود بلکه در عنوانهای کشوری و لشکری دوره ساسانیان نیز چون ایران دبیر بود، ایران آمارگر، ایران امباربود و ایران اسپهبود جلوگر می شود اندیشه آن چردشیر پابکان ایران شهر می خاند. حتی در نیمه دوم دوران عشقانی نیز کم و بیش در دستور کار شهریاران آن روزگار جای داشت و برخی از شاهان عشقانی گام هایی در راستای رسیدن به این آرزوی بزرگ برداشته بودند در نامه تنسر مرزهای ایران شهر این گونه شناسانده می شود میانجوی بلخ تا آخر بلاد آذربایجان و ارمنیه ایران، ارمنستان کنونی و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران یا بلوچستان و از آنجا تا کابل و تخارستان. عبوریهان بیرونی ایران شهر را از یک کران تا کران دیگرش چنین برمی شناساند، از زمین چین و تبت و خطاب و خوتن و شهرهایی که به ببیان آن است و بر کوهای کشمیر و بلور و وخان و بدخشان بگذرد سوی کابل و غور و هرا و بلخ و تخارستان و مرو و کوهستان و نیشابور و توس و کومش یا سمنان و گرگان و تبرستان و ری و قم و همدان و موسل و آزرابادگان همدالله مصطفی ایران شهر را این گونه روی نقشه نشان می دهد. و اما حدود ایران زمین، حد شرقی ولایت سند و کابل و ماوران نهر و خارزم و حد غربی ولایات روم و نیکسار و سپس شام و حد شمال ولایات روس و چرکس و دشت خزر که آن را نیز دشت قبچاق خوانند و آلان و فرنگ است. و حد جنوبی از بیابان نجد است که به راه مکه است و آن بیابان را از طرف یمین با ولایت شام و از طرف یسار با دریای فارس که متصل دریای هند است پیوسته است و تا ولایت هند می رسد ابن بلخی نیز بر حوییت مشترک سرزمین های میان آمودریا رود فرات پافشاری نموده و مینویسد. در روزگار ملوک فرس پارس دارالملک و اصل ممالک ایشان بود و از حد جیهون تا آب فرات را بلات فرس خواندندی یعنی شهرهای پارسیان در برخی از موتون عراق به عنوان دل ایران شهر شناسانده شده است ابن خرداد به در این باره می نویسد قسمتی که ایران شهر نامیده شده نسبت به سایر قسمت های این سرزمین همانند سینه است در کالبد انسان و آن قسمتی که آسورستان خوانده می شود نسبت به سایر اقسام ایران شهر مانند قلب در سینه باشد. در زمانهای پیشین سرزمین سورستان را که همان سواد باشد دل ایران شهر می خواندند چون ایران را در دوره کوهن ایران شهر می گفتند و برخی از نویسندگان و تاریخنگاران نگاران به جای ایران شهر در نوشتارهای عربی واژه عراق گذارده از این رو برخی به نادرستی گمان بردند که عراق معرب ایران شهر است در حالی که معربه ایران است همچنین بنابر نوشته مسعودی و تایید ابن درید واژه عراق معرب واژه ایران است ابن درید در جمهوریت اللغت از اسمعی این گزاره را آورده است نام عراق از ایران برگرفته شده و عرب آن را اراق نامیدند همچنین در لغت الفرس اسدی توسی هم میتوان گفت ایران نام عراق است و عراق از ایران معرب است در نمونه هایی که در کتاب های ابن خرداد به و قدامه و ابن رسته و ابو حنیفه دینبری و تبری و خارزمی دیده می شود آشکارا اراغ معرب ایران شناسایی می گردد. از هری هم در تصیب و لغت می نویسد که اراغ عربی شده واژه ایران است. در این زمینه حتی در مواردی شاه ایران ساسانی را هم پادشاه عراق هم گفتند. لقب پادشاه اراغ، که عامه او را کسرا می خوانند شاهنشاه است شاید گویشی در ایران بوده است که واژه ایران را عراق تلفظ می‌کردند و به همین شکل هم آن نام بر جای مانده است از سوی دیگر دیدگاه دیگری نیز در پیوند با اینکه عراق قلب ایران شهر خوانده شده است وجود دارد در نوسهت القلوب حمد مصطفی نوشته است که شهرهای عراق را شاهان ایرانی بنیاد نهادند. کوفه را هوشنگ پیش دادی، انبار را به بکیانی، هلوان را قباد ساسانی، رومیه را انوشیروان، سامره را شاپور دوم ساسانی، مدائن را تهمورس پیش دادی و حیره را نعمان ابن منزر برای بهرام گور ساختند. از این رو اراغ را دل ایران شهر اند. زیرنویس 50 مسعودی و تبری، هنگامی که سخن از باختر ایران می گفتند، اران را هم شکل دیگری از ایران میدانند. درباره اران ابن اعسم به روشنی در کتاب فتوح نوشته است. مراد از ایران همان جایی است که بعداً اران خونده شده. یعنی جمهوری کنونی آذربایجان. میراث ایران شهر و هویت ملی ایرانشهر شهر که پیوند استوار مردم سرزمین های یاد شده بود، آنچنان ریشهی در میان نصهای گوناگون ایرانیان داشت که در زیر چیرگی حکومت اسلامی که نزدیک به شش صده مندگاری داشت، با هویت پارسی فرس یا عجم شناسایی میشد. ایرانیان با همه دشواری‌ها و بحران هایی که با انها روی آورده بود، در جهان اسلامی نوین ناپدید و بیشناسنامه نشدند، حس همدلی و همدردی آنها آنچنان آشکار و روشن بود که همه تاریخ نویسانی که از سرزمین های اسلامی و مردم آن برگی نوشته به این ویژگی ایرانیان و خداگاهی آنان بر پیوندهای تاریخیشان پرداخته اند. خداگاهی ملی در نزد نخبگان ایرانی به راه افتادن جنبش شعوبی انجامید.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 اسماعیل ابن برد از چهره های سرشناس جنبش شعوبیه در اوج قدرت خلافت اسلامی بنی اومیه که به شدت دولتی عربگرا بود این چنین میگوید مرا زبانی است که چون زبان تیغ زهراگین است و با آن از عظمت ملتی بزرگوار دفاع میکنم و پادشاهان جهاندار تاجداری را پشتیبانی مینمایم که بودند مرزبانانی نجیب و چالاک و جوانمرد و مهمون نواز سعالبی در این پیوند می نویسد در میان ملل جهان ملتی شناخته شده نیست که چون پارسیان دارای کشوری دیرپا و ناگسسته باشد و پادشاهانی داشته باشد که آنان را بر اساس پیوستگی و پایندگی و نظم و انتظام هم همارند هویت ایرانی که پیش از ساسانیان بیشتر سرشت فرهنگی، قومی و دینی داشت، با ساسانیان به تعریف سیاسی معین و روشنی رسیده بود که به پدیدار شدن حس ملی انجامیده بود. سرشت شدن هویت ملی از های دوره باستانی متأخر بود. این دوران تقریباً با فروپاشی امپراتوری روم باختری آغاز شد و با گسترش اسلام به بیرون از حجاز به پایان رسید. برپایی شاهنشاهی ساسانی و جا افتادن های قومی و دینی در زمینه آفرینش و تاریخ هویت ایرانی را در جایگاه جغرافیایی خود که در زمان حخامنشیان پیریزی شده بود، برکشید و زندگی دوباره ایبان داد با یورش عرب به ایران، کشور یا استیت ایران برای مدت زمانی هستی خود را از دست رفته دید ولی تمدن ایران شهری که تا پیش از این هم خود را در بافت سیاسی و فرهنگی نمایش داده بود این بار در جلوگاه تازهش یعنی زبان پارسی پویا گشت زبان پارسی با پشتوانه تمدن ایران شهری از شمال باختری چین و هندوستان تا فلات آناتولی و کرانه مدیترانه و دریای سیاه را در نوردید. اگر تنها یک پارچگی سیاسی و نظامی مهمترین عامل پیوستگی مردم در ایران شهر بود، میبایستی پس از فرو افتادن دولت ساسانی و از میان رفتن چیرگی سیاسی و حضور نظامی آن، این جوامع محلی به هم پیوسته از هم میگست هستند و راه و سرنوشت جداگانه ای را در پیش میگرفتند و در جاده قبار آلود تاریخ در جایی ناپدید میگشتند و یا در هویتی نوین آب میشدند، صد البته که چنین نشد. نقش زبان به عنوان یکی از پایه‌های هویت در پیشبرد اهداف ملی و گسترش برنامه‌های دولت بسیار برجسته بوده است. تاریخ نگار سرشناس ارمنی سده پنجم موسا خورنی می نویسد که مهرجوان آرتسترونی، سردار ارمنی شاپور دوم از سوی شاه به ارمنستان فرستاده شد. تا آن استان را از نفوذ رومیان مسیحی رها کند. در پی به درازا کشیدن نبرد میان ارمنیان مسیحی هوادار روم و ارمنیان مزداپرست هوادار ایران شاپور سپاه کمکی از ایران به ارمنستان فرستاد و پس از اینکه آنجا را از رومیان باز پس گرفت دستور داد نوشتارهایی که به زبان یونانی و در راستای گسترش مسیحیت بودند را نابود کنند، و به جای آنها دوباره مردم پارسی بیاموزند. در آن زمان زبان ارمنی فاقد دبیره بود. در آنجا شاپور به روشنی جایگزین شدن زبان ایرانی را با زبان یونانی یعنی زبان امپراتوری روم شرقی یک پسرفت برای حضور مقتدرانه ایران در قفقاز می دانست و جلوی آن ایستاد. او بخشی از ایران شهر یعنی ارمنستان را نمی بدون یکی از منمایه هویت ایرانی یعنی زبان ایرانی ببیند و به درستی واکنش نشان داد چون میدانست اندیشه‌های اندیشه های ان ایرانی از خلال زبان ارینانی راه خود را به درون جامعه باز می کنند. مقدسی در جلد دوم از کتاب دو خود به نام احسن التقاسیم به عقالی ملعجم پرداخته و چون ویژگی فراگیر همه سرزمین های ایرانی را زبان پارسی دانسته، میتوان آنچه را او به نام اقالی ملعجم خانده جهان ایرانی یا جهان پارسی زبان نامید. آنچه درباره کتاب مقدسی دارای همیت فراوان است، آن است که او نام کوهن این سرزمین به هم پیوسته را هم آورده و بدین گونه نمودار روشنی از همان ایران شهر تاریخی را ارائه نموده است، وی در جاهایی هم که مردم در کنار زبان پارسی به زبان دیگری گفتگو می اند افزون بر اینکه از زبان محلی هم یاد کرده چند و چون پارسی گویانها را هم نگفته نگذاشته است چنانکه درباره ارمنستان و اران می نبیسد. در ارمنستان به ارمنی و در اران به ارانی سخن میگویند و فارسی آنها هم مفهوم است و نزدیک به خراسانی است. یافت شناسای ملی در درجه اول با ایده یگانه بودن ملت و وابستگی به یک جامعه تاریخی پیوند می خورد. ملی بر پایه مرزبندی های, های و تشکیل جامعه سیاسی شکل می گیرد. خداگاهی بر شناسای ملی به فرد پروانه می دهد که سرزمین پیرامونش را برای خود داشته باشد و از دید تاریخی خود را به یک جمع پیوند زند. این تصویرسازی ذهنی به گونه همگانی روی می دهد و به دوره زمانی ویژه محدود نمی شود بلکه پیوستگی تاریخی دارد. عوامل گوناگون نمادین، ارزشی، سرزمینی، اسطورهایی و زبانی در ایجاد حس ملی نقش دارند. بنابراین ملت یک مفهوم تباری، فرهنگی پیدا می کند. نه تنها از دیدگاه فلسفی هگل ایرانیان را نخستین قوم تاریخی و ایران را نخستین دولت شاهنشایی یا رایش میدانند بلکه با نگاه فرهنگی و اجتماعی نیز همچنان که آنتونی سمیت با نمونه های تاریخی نشان داد نه تنها هویت ملی بلکه آگاهی از آن نیز در ایران وجود داشته است هویت ملی ایران و آگاهی از آن بنا به ملت های کهان به گونه پیوسته و با فراز و فرود در دوره های تاریخی جریان داشته و هر چند در این مسیر گذار از بحران تأثیراتی را از عوامل بیرونی پذیرفته ولی گوهر و سرشت ریشهدار خود را نگه داشته است. خود آگاهی ایرانیان بر ایرانی بودن خیش فراتر از اصر میرود می رود و به صده های گذشته برمیگردد گردد. بیراه نیست که پجوهشگر پرآوازه فرانسوی کونت گوبینو در بیش از 150 سال پیش مینویسد. ایرانیان قومی باستانی و چنان که خود می گویند شاید کهنترین ملت جهانند که حکومتی منظم داشتهاند و بر روی زمین همچون ملتی بزرگ عمل کردهاند. این حقیقت در زن هر خانواده ایرانی حضور دارد و تنها گروه های درس خوانده نیستند که این مطلب را میدانند و آن را بیان می کنند. حتی مردمان طبقات بسیار پایین نیز همین سخنان را مطرح می کنند و آن را موضوع گفتگوهای خود قرار می دهند. نیاز به یادآوری است که این سخنان را ایشان در اصر ناصری و در اوج دوران قفلت و بیخبری ملت ایران نوشته است، این بدان معنی است که خداگاهی ایرانیان بر ایرانی بودن خیش و پیوندهای دیرینه تاریخی با گذشته تابناک حتی در سیاهترین هنگام زندگی ملی امان مانند زوال ناصر شاهی نیز از میان نرفته بوده است. این حس شناسی و میهندوستی را پیش از آن در گذشته بسیار دور از سنگ های داریوش میتوان آشکارا دید. حتی هرودوت نیز که به هیچ روی دوست و ارادتمند ایرانیان نبوده است این حس میهن را به همه ایرانیان نسبت می‌دهد وی میگوید که هرگز یک پارسی از خدای خود نیکی‌ها را برای خودش نمی‌خواهد بلکه او درخواست نیکی برای همه ملت و برای شاه می‌کند گریشمن این ویژگی را تأثیر پرورش نجیبانه ملتی میداند که بعد دیگر ملتهای آن روزگار چیرگی داشت و بر وظیفه بزرگ و وجدانی خیش آگاه بود. اندیشمندان بسیاری درباره باره ایرانی و اجزای سازندهاش سخن گفتند. برای نمونه یکی از تعاریف شناسه ایرانی این گونه است. آن جنبه از خداگاهی ایرانیان که مانند خمیرمایهی در تاریخ تحول اجتماعی ایران جریان داشته است و به زندگی همگانی آنان پایندگی و پیوستگی بخشیده است. در بیان پایه های شناسه ایرانی نیز اندکی تفاوت در نگاه افراد دیده می شود. ذبی الله صفا نویسنده کتاب ارزشمند تاریخ ادبیات ایران بر این باور است که هویت ایرانی دارای دو بنمایه است زبان فارسی و نهاد شاهنشاهی از سوی دیگر شاهرخ مسکوب شاهنامه پژوه برجسته هویت ایرانی را بر دو پایه زبان و تاریخ میبیند حمید احمدی پژوهشگر همروزگارمان بنیادهای هویت ملی را تاریخ سرزمین میراث فرهنگی و دولت مشترک می‌داند. کاتم نویسنده کتاب ناسیونالیسم در ایران بنیادهای ملیگرایی و هویت ملی را سرزمین خداگاهی تاریخی فرهنگ مشترک زبان و تبار میداند فارغ از آنکه کدام عناصر را شالوده های هویت ایرانی بدانیم در عمل شناسنای ایرانی به عنوان یک حقیقت زنده و پویا نمودی برای نمادهایی است که در جای جای یادمان تاریخی و کولبار ادبی و هنری ایرانیان گاه در خامه تاریخنگاران، سرایان، اندیشمندان و گاه در سایه تدبیر وزیران، دبیران و اندیشمندان و گاه در پرتوی دلاوری سرداران و سربازان جلوه نموده است. شناسه ایرانی در این سفر دراز چند لایه گشته و آمیزه های سازنده آن به هم جوش خوردند. بگونه ای که امروز نمی توان سرزمین، زبان، تاریخ و دیگر ستونهای فرهنگ آن را جداگانه از هم نگاه کرد. این شناسه ایرانی کهنسال در آغاز سده بیستم در عصر رضاشاهی شاهی پایه هویت ملی شد. هویت ملی، هویتی که در اروپای صده های هجده و نوزده تعریف شده و جا افتاده بود، برای ایرانیان در بطن یک خودآگاهی همگانی از صده های دور گذشته وجود داشت. تنها در عصر نوین شناسه ایرانی ظرفی برای مظروف خود یعنی ملت ایران گشت. وگرنه هویت ایرانی همزمان با ایده ایران و سرزمین مینوی ایران و یجه زاده شده بود. در زمینه ناسیونالیسم نوین باختر زمین و پیوند و یا آن از ایرانگرایی یا ناسیونالیسم ایرانی بهجاست جاست که جستاری به دینگونه آورده شود. نظریه مدرن ناسیونالیسم نمی تواند آنچرا که ناسیونالیسم ایرانی می نامیم در دو نکته در برگیرد. در نظریه مدرن ناسیونالیسم بار هویت تاریخی را با خود همراه ندارد. بنابراین یا به بگونه دولت ملت یا نیشن استیت در ترکیب با مفهوم حاکمیت ملی و وجود دولت مشترک تعریف می شود و یا با فرهنگی تازه پدید آمده گره میخورد. در نظریه ناسیونالیسم نوین برای ملت به تنهایی و در گوهر خود هستی در نظر گرفته نمی شود. در حالی که در شکل تاریخی آن ملت خود ماهیتی انکارناپذیر دارد و تنها بر پایی یک قرارداد اجتماعی تعریف نمی‌گردد. پانویس شست. برای گونه نخست که با دولت مشترک شناسایی شدهاند سوریه، شیلی و بلژیک نمونه‌های خوبی هستند. همین پدیدار شدن دولت مشترک سوریه را از اردان جدا می نماید و گرنه هویت مشخصی وجه تمایز این دو کشور در آغاز نبوده است پانویس برای گونه دوم که کشورهایی با شکل گیری فرهنگی نوین بدون داشتن پشتوانه تاریخی هستند می توان از کانادا و ترکیه نامبرد. کانادا با مهاجران انگلیسی و فرانسوی ساخته شد و فرهنگ نوپای کانادایی پدید آمد ترکیه هم بر روی جسد خلافت عثمانی و مردمی که آمیخته ای از یونانیان ایرانیان ارمنیها گرجیها بلغارها قبال زردپوست آسیای میانه و مردم بالکان بودند ساخته شد و هویتی نوین یافت نکته دیگر در دیدگاه مدرن به ناسیونالیسم نیاز به وجود نظام سرمایهداری، بافت صنعتی، دستگاه دیوانسالاری دولتی و ارتش برای شکلگیری ناسیونالیسم می درباره ملت‌های ملتهای تاریخی که ملیگرایی سنتی را برای صده های دراز در پیکر جامعه خیش گواه بودند، انصار ای موجود است که در نگاه مدرنیست ها به چشم نیامده است و آن روان یک ملت است ارنست رنان ملت را دارای روان میداند روانی که در برگیرنده دو عنصر گذشته و اکنون میباشد گذشته ارسیه و عواطف مشترک مردم و یادمانهای صده های دراز تلخ و شیرین باهم بودن است و اکنون اراده با هم ماندن و در کنار هم زیستن، همراه با عرج نهادن به کوله‌بار فرهنگی مشترک می باشد. به همین انگیزه جوامعی با ذهنیت تاریخی به سوی گذشته‌ها گرایش مییابند. همه وابستگی‌ها، عواطف و آرزوهای خیش را در گذشته درخشان ولی پایان یافته می جویند. این جوامع در زیر تاثیر روانی و روحی اسطوره ها، حماسه ها و قهرمانان تاریخی خود زندگی می کنند. نه مرزهایشان با خطکشی های چند کشور استعماری تعیین شدند و نه در یک روز با یک رای گیری نیم ساعته در سازمان ملل متحد دارای هویت و حق حاکمیت شدند. بیگمان، ایران در کنار ژاپن، چین ایتالیا و یونان در این دسته از ملت ها جای میگیرد و ملیگرایی آن نیز برخاسته از نظام سرمایهداری و صنعتی شدن و نظامی شدن صدههای هجده و نوزده میلادی نیست از دیدگاه سمیت اگر چه ملیگرایی یا ناسیونالیزم به عنوان یک ایدولوژی سیاسی را می توان فراورده دوران پس از پیدایش سرمایداری و پایان اقتدار کلیسا در نظر گرفت ولی نمی توان پدیده ملت را الزامن پیامد پیدایش ناسیونالیسم دانست به واژگانی دیگر ملت پدیده کهن‌تر از ملیت‌گرایی است و گرچه در بسیاری از کشورهای تازه شکل گرفته در صدده‌های 19 و 20 این ایدولوژی ناسیونالیسم بود که آفرینش هویت ملی و شکلگیری ملت را در پی داشت ولی نمیتوان این موضوع را به کل تاریخ ها و به همه کشورها و ملت ها گسترش داد. تاریخ بشر نشانگر این است که پدیده ملت در برخی جوامع پدیده بسیار کهنتر از ناسیونالیسم بوده است. اسمیت در کتاب ریشه قومی ملت‌ها به معرفی ملت‌های کوهن یا باستانی پرداخت و ایران را یکی از همان ملت‌ها به شمار آورد. وی ملت‌های ایران، مصر، هند، مکزیک، ایرلند و ایتالیا را دارای ریشه نیرومند در دوران کوهن می‌داند. وی دیدگاه مدرن هابس تاریخنگار مارکسیست انگلیسی را بر پایه ساخت ملت از سده 18 هم به بعد تنها هماهنگ با وضعیت اروپای مدرن می داند و دیگر نواهی جهان را بیرون از آن قاعده می دانند. نه تنها پیدایش ملت و ملیگرایی در ایران پدیده نوینی نبوده است بلکه دولت ملی نیز در ایران بیپیشینه نبوده است. پیدایش مفهوم دولت ملی پدیده‌ای غربی انگاشته می شود که در سده 19 هم اروپا پدید آمده است نشانه‌هایی در دسته است که در آغاز دوره هخامنشیان گام‌هایی در ایران در راستای پیریزی دولت ملی برداشته شده بود ایجاد جاده‌های شاهی به درازای 3000 کیلومتر با 11 ایستگاه برای پیوند دادن کارآمد بخش‌های گوناگون کشور، یکسان کردن سکه یا پول رایج، هماهنگ کردن اوزان در سراسر پهنه شاهنشاهی، فرستادن بازرسان ویژه و پنهان یعنی چشم و گوش شاه به گوشه و کنار کشور برای آگاهی از کارکرد فرماندهان منطقی یا ها و اوضاع مردم از ویژگی‌های روشن آغازین ساخت دولت ملی در زمان داریوش بزرگ بود. روند پدید آمدن دولت ملی در دوره ساسانیان پی گرفته شد و در زمان عنوشی روان به مفهوم دولت ملی امروزی بسیار نزدیک گردید. نگاهی به نمود اندیشه ها در ایران شهر برخلاف نگاهی که ایرانیان را دین خوب و بیگانه با اندیشه ورزی می ایرانی نه تنها در اندیشیدن و ساختن ایده های و نووین سترون و عقیم نبوده است، بلکه دستکم در دوران پیش از اسلام در پیدایش مکاتب فکری و یا تأثیر بر روی های موجود بسیار پویا و زاینده بوده است. مانند هر ملت دیگری، در روزگار باستان تفکر استورایی جولانگاه اندیشههای های ایرانی بود. جهانبینی ایرانی در دامنه ها ساخته و پرداخته میشد. انسان ایرانی با رسایی و خورداد یا تکامل از جهانبینی استورایی گذر نمود و به عصر اندیشه ورزی در قالب تفکر فلسفی و منطقی رسید که فرجامش ارائه مکاتب فکری در شکل کیش و باورهای گوناگون گردید. در پیشا پیش همه اندیش برزان ایران زمین زرتوش دیده می شود که در گادهای خیش دریچه از مفاهیم انتظایی یا ابسترکت نو، همانند حق گزینش انسان، خیشکاری انسان، درگیتی، رسایی انسان، اشا، خردگرایی اندیشه پیشرو و آبادگر، نیک خدایی و غیره را بر روی ایرانیان گشود، سامان باوری ایرانیان پس از پیدایش زرتشت وارد پهنه دیگری در دیدگاه و غنای بالاتری در ژرفا شد زیرا او مفاهیم انتظایی را در جهان ایرانی به گفتمان چیره بدل نمود زرتشت نخستین چهره شناخته شده در تاریخ است که از جهان اخلاقی سخن گفت و هستی را از دریچه اخلاق ارزشیابی نمود این اندیشمند یگانه ویژگی‌های برجسته یک فیلسوف را دارا بود که عبارتند از نگرش به هستی و آفرینش، سامان کیهان و هنجارهای گیتی، شناسایی نیکو و حق گزینش انسان. تأثیر اندیشه‌های زرتشت بر روی حکمت یونانی که مورد بررسی شماری از پژوهشگران قرار گرفته است، توسط برخی از تاریخنگاران یونانی نیز بازگو اند. رای عرستو درباره آنکه تاریخ دارای دوره‌های منظم است که سرانجام هر کدام از این دوره‌ها با یک فاجعه طبیعی بزرگ پایان می‌پذیرد از آموزه‌های زرتشتی تأثیر پذیرفته است. عرستو همچنین افلاتون را در باور به وجود دو روح نیکی و بدی در هستی پیرو آموزش‌های زرتشت میدانست. ایرانیان اگرچه اندیشه ساز و اندیشه پرداز بودند ولی از جستجو در آگاهی و دانش همسایگان خود غافل نبودند نگاه ایرانیان به همسایگان و آنچه در جهان یونانی رومی میگذشت نشان از آن داشت که ایرانیان دوستدار دانستن و شناختن این رقیبان باختری خیش بودند گرچه ایرانیان توجه ژرفی به دانش بیگانگان به ویژه دانش یونانی نشان دادند، یونانیان و رومیان بیرون از مرزهای بزرگ شاهنشاهی ایران کوششی چندان برای دریافت درست آینهای بنیادین ایرانی از جمله آین مزدایی و جهانبینی ایرانی نکردند. هگل فلسفه تاریخ را والاترین پایه خداگاهی ملی می شمارد. فلسفه تاریخ همان بررسی اندیشمندانه تاریخ است پژوهشی است که می‌خواهد در پس رویدادهای پراکنده و ظاهر ناپیوستی تاریخی سامان و هنجاری هدفمند و هماهنگ بیابد فلسفه تاریخ می‌کوشد تا گذشته را از دریچه چشم مکنون و حتی آینده بنگرد ایده نبرد پیوسته و چند وشهی نیک و در مینو و گیتی که در قالب اندیشه های و در بستر ایران شهر تبدیل به فلسفه تاریخ ایران گردید، ایرانیان را از دید هگل نخستین ملت تاریخی جهان به شمار می آورد. در این زمینه در بخش های آینده باز هم گفتاری خواهد آمد. داریوش آشوری در مقاله نیچه و ایران چنین می نویسد؟ نیچه در پارنیوشتهایی در آثار منتشر نشده پس از مرگش از یک فرصت از دست رفته تاریخی دریغ می‌خورد که چرا به جای رومیان ایرانیان بر یونان شیر نشدهند. این یادداشت کوتاه را می توان این گونه تفسیر کرد که نیچه اینجا نیز گرایش خود به جهانبینی زمان باور ایرانیان را در برابر متافیزیک یونانی نشان داده است. زیرا با فرمان روایی رومیان بر یونان، فرهنگ یونانی و متافیزیک فلسفی آن بر فضای روم چیره شد و راه را برای پیدایش مسیحیت و نگرش آخرتندیش و زمانگریز و دید هیچ انگارانه آن نسبت به زندگانی زمینی گشود. نیچه بر آن بود که مسیحیت در جایگاه دین تایدستان زندگی گذرای زمینی را به نام پادشاهی جاویدانه آسمان رد میکند و بدین سان نگرش مثبت یا آریگویی به زندگی را بدل به نگرش منفی و پوچنگار انگار میکند حال آنکه فرمن ایرانیان بر یونان با نگرش مثبتشان به زندگی و زمان می توانست روند این جریان را دگرگون کند و از یک رویداد شوم در تاریخ جلوگیری کند افسوس نیچه چندان هم بی مورد نبود اگر به یاد آوریم که ایران از همان ورود تابناکش به گستره تاریخ جهان برای صده های درازی مشعلدار فروزان رواداری فکری و دینی بود و در جهان شناخته شده آن روز پیشتاز جلوگیری از قربانی کردن انسان و دیگر جانداران به شمار می‌رفت. نه تنها هخامنشیان این ویژگی برجسته را در تاریخ باستان از آن خود نمودند بلکه ایران اشکانی و ساسانی نیز در درازای یک هزاره نسبت به همسایگان رومی و بیزانسی خود بسیار شکیباتر و نرمتر با دگراندیشان اندیشان رفتار نمودند. در نزد شرخ شناسان به ویژه در سده بیستم یک نگرش خودی و غیر خودی برای بازخانی تاریخ و بررسی فرهنگ یونانی رومی از یک سو و ایرانی پارسی از سوی دیگر پدیدار شد که انگیزه های فلسفی و سیاسی در پس خود داشت. بر پایه این نگاه اروپا مهور، اروپا میراسخور فلسفه یونانی و اصول کشورداری روم شمرده میشد. و طبیعتا رقیب فرهنگی و نظامی آن دو یعنی ایران باید در جایگاه غیرخودی بیگانه و حتی دشمن جای میگرفت در همین پیوند آینهای ایرانی از جمله های زرتوش هم باید مورد بیمهری و یا گاه تفسیری قرار میگرفت از همین رو پذیرفتن اینکه پیش از افلاتون یونانی مردی در آسیا زاده شد و به آن ترازی از بلنداندیشی رسیده که عمل خدایان را به گونه نبردی میان نیروهای نیک و نیروهای بد بینگارد و خود این نیروها را به مانند مفاهیمی انتظاع جلوگر سازد به تصویری که تاریخنگاران و پژوهندگان اروپا محور از تفاوت قرب و شرق ساخته و پرداخته کرده بودند خچه وارد می‌نمود. پذیرفتن رفتن این حقیقت نفی برتری مینوی باخترزمین زمین بر خاور به شمار می رفت. حتی نخستین مترجم سرشناس گات ها در اروپا یعنی جیمز دارمستتر، بهتر آن دید که گاتها را جلی و اثری پیدا شده پس از زرتشت قلم داد کند تا بتواند آن را الهام گرفته از آموزش های به شما را برد. بدیگوونه میشد ایران را در پهنه اندیشه در برابر باختر زمین آن روز ندار و تویید است به شمار آورد. گذشته از اندیشه های باورهای زروانی نیز از کنش های فکری و ذهنی ایرانیان بوده است که آثارش تا امروز نیز بر جای مانده است. باورهای زروانی چه دارای ریشه ای ایرانی بوده باشند و چه از بابل و یا یونان سرزده باشند در دامن اندیشه ای ایرانی پرورده و پخته تر نمودن پدیده زروان یا زمان بیکرانه به عنوان زاینده یا مادر احورامزده و احریمند و به میان آوردن آفریننده بدی یا اهریمن در برابر آفریننده نیکی یا مزدا از راهکارهای هوشمندانه فرهیختگان ایرانی برای پاسخگویی به حکمت بسیاری از بلایا و فرجای طبیعی در جهان بود از سوی دیگر زمان کرانمند که در برابر این زروان یا زمان بیکران جای می گرفت نوعاوری انصار ایرانی در پهنه اندیشه بود که همه فرایافت پیشرفت و سیر تاریخ در راستای بالندگی و رسایی از آن میآید. و این دلیل دیگری است که هگل ایرانیان را نخستین ملت تاریخی نامید. یعنی ملتی که دارای حس تاریخی هستند. دیگر ویژگی‌های باور زروانی یعنی اسیر بودن در دست سرنوشت و دل سپردن به آن چه چرخ و فلک برای آدمی مقدر کرده در حماسه ملی ما شاهنامه به چشم می‌خورد. پانویس هفتاد زنده یاد ساقب فر دو داستان ایرج و سیاوش را به درستی دارای بار زروانی می‌داند. باورهای زروانی در مقاطعی از دوره ساسانیان به ویژه در باختر و جنوب ایران شهر بر آیین آغازین و اصیل زرتشت سایه افکند و به دریافت نیمه رسمی نظام ساسانی از کیش زرتشت بدل شد. افسون بر اندیشه های زرتشتی و باورهای زروانی از دیگر اندیشه های ایرانی که در پیکر کیش و آین به جهان آن روز شناسانده شد، آین مهر در فضای ایرانی یا نسخه اروپایی شده آن یعنی میترایسم است. این باور کوهن آریایی که شاید به عصر پیش از زرتشت برمیگردد، حتی با سپیده زدن آین زرتشت نیز با این که برای چندی از رونق افتاد ولی ماندگار شد و در دوران پسین بخشی از آموزه‌های آن وارد اوستا نیز گردید، به ای که یکی از یشت های برجسته اوستا مهریشت نام گرفت. مهرپرستی در خلال جنگهای ایران و روم در زمان اشکانیان توسط سربازان رومی و دیگر اروپاییان که دوره اسارتشان در ایران پایان یافته بود به میان رومیان و سرزمینهای زیر فرمان روایان ها برده شد و پیش از مسیحیت به رقیبی بزرگ برای باورهای کهن رومی یونانی در اروپا درآمد پانویس یک. جای گمانی نیست که در جابجایی مهر ایرانی به کیش میترایسم اروپایی دگرگونی در آن رخ داد. شاید به همین دلیل که این کیش را سپاهیان به روم بردند میترا خدای جنگ نام گرفت. ارنست رنان در پیوند با آیین مهر میگوید اگر رشد مسیحیت در پی بیماری درمان متوقف میشد، مهرپرستی آین سراسر جهان میگشت. مهرابه های برجامانده در اروپا نشانگر گسترش شگرف این ریشه دار ایرانی در آن سرزمینها بودند. عناصر بسیاری از این کیش وارد مسیحیتی شد که به دنبال فراهم نمودن ساز و کار لازم برای دگرسانی از یک ایمان به یک دین بود. روز کریسمس که زادروز عیسی شناخته شد و هر سال جشن گرفته می شود به درستی در اصوره ها زادروز زایش مهر است. نمونه های از این دست بسیارند. ارمغان انصر ایرانی در روزگار ساسانیان باز کردن افقی نوین در گفتمان برجسته و جنجالی سرچشمی قدرت و حقانیت حکومت بود. اندیشه ایرانی گره دوگانگی سرچشمی قدرت یعنی قدرت از منشه خدایی و یا قدرت از منشه زمینی و انسانی را با ارائه نمودن نظریه همزاد بودن دین و دولت گشود. در این نگرش دین و دولت یکی نبودند ولی در کنار یکدیگر جامعه را راهبری می کردند. پیش از آنها در خاورمیانه میانه و حتی خاور دور در سرزمین هایی همچون مصر، چین، بابل، فرمانروای سیاسی رهبر دینی به شمار می آمد. هرچند پیشینیان ساسانیان یعنی اشکانیان و حخامنشیان به راه مصریان، چینیان، بابلیان، آشوریان و سومریان نرفته بودند و به سنت ایران شهری یکی نبودن دین و دولت وفادار مانده بودند. این یکی از ویژگی‌های برجسته اندیشه سیاسی ایران شهری و وجه تمایز آن از همسایگانش بود. نخستین شاه ساسانی اردشیر پاپکان که برای نخستین بار دین رسمی را در کشوری بنیاد گذاشت همزمان با آن جدایی دین از دولت را نیز که از هزاره پیش از آن سنت دولت ایرانی شده بود عرج می نهاد. به بیانی دیگر حتی اردشیر که از خانواده آتش کده دار به شهریاری ایران دستیافته بود دین و دولت را دو همزاد می دانست ولی یکی نمیدانست. در کنار خود اردشیر که در جایگاه شهریار رهبری سیاسی را با رایزنانی زنانی چون ابرسام بر دوش داشت نظری پردازانی چون تنسر و ماهان نیز راهبری دینی جامعه را پذیرفتند شاهنشاهی ساسانی بر امواج ایرانگرایی و دین زرتشتی به فراز رسید و فلسفه حکومتی آن نیز از این دو آبشخور مایه می گرفت دولت ایرانگرا و دین زرتشتی که سرچشمه بومی در ایران زمین داشت با عرف جامعه همگون و همراه بود ترکیبی توانمند در دست ساسانیان برای درخششی 400 ساله بود. پس سوی دیگر برخی از مفاهیمی که توسط ایرانیان به جهان شناسانده شد در دیگر باورها و مکاتب رخنه کرد و به آموزه اصلی آنها تبدیل گردید. فرایافتهایی همچون روز رستاخیز، روز داوری، بهشت و دوزخ و ایزدان در پنج کتاب اصلی احدعتی وجود نداشت. پس از آزاد شدن یهودیان در بابل، توسط کوروش آنها این باورهای ایرانی را به تدریج در کتابهای پس از تبعید خیش گنجاندند. هرچند که در این انتقال باورها شکل درون ذهنی و مینوی این فرایافتها به ساختار برونی و حسی بدل شد و از معنی آغازین آن در آین زرتشت دور گردید. در دهه های نخست دولت ساسانیان همزمان با شاهی شاپور یکم مانی با آمیزش بنمایههایی از عرفان میان رودانی، تصوف هندی و چینی و فرهنگ واژگان کیش زرتشتی آینی را بنیاد گذارد که در جهان متمدن آن روز بسیار گسترش یافت و پیروانش برای چندین صده از آسیای میانه تا باختر اروپا پراکنده ولی کوشا بودند. تأثیر دین مانی بر دیگر ادیان را در نمونه سن اگستین نظریه پرداز نامدار مسیحیت در صده های چهارم و پنجم میتوان دید. وی پیش از اینکه که برجسته مسیحیت شود از مانویان بود و بسیاری از آموزه‌های های مانوی را با ایده های خیش به پیکر یزدان شناسی و فقه مسیحی تزریق نمود. هرچند روح چیره بر آموزه های مانی با برمایه های منش ایران شهری مانند آباسازی و شادزیستی هماهنگ نبود ولی نمی شود کامیابی مانویان در گسترش کیش خود در جهان پهناور آن زمان به ویژه در میان غیر ایرانیان را ندید گرفت. این دلیلی دیگر بر این دا بود که ایرانیان در باروری اندیشه در میار جهان آن روز از پیشتازان و سرآمدان بودند. بیراه نیست اگر در اینجا اشاره‌ای هم به یکی از چهره‌های ماندگار حکمت خسروانی در عصر پسا اسلامی بکنیم. بیگمان شهاب الدین سهروردی یکی از فرزانگان و برجستگان ایرانی در پهنه اندیشه است. در فلسفه اشراق او پانوی فلسفه اشراقی با اناسر کشف و شهود در رویارویی با فلسفه مشائی یونانی که ابن سینا و فارابی نیز پیرو آن بودند قرار می سنت‌های سنت های فکری ایران باستان با حکمت روز بازخانی شد. جزمندیشان بر او رشک بردند و به سلطان سلاه دین عیوبی نوشتند که آموزه‌های های صحر اسلام را به خطر می اندازد. و سرکوبی وی نیاز است. سلاه الدین فیلسوف جوان ایرانی را از میان برد. وی در پردازش تاریخ فلسفه ایران کمر همت بست و حقایق شیوه های فکری ایران را باز شناخت. سهروردی می گوید در میان ایرانیان قدیم گروهی از مردمان بودند که به حق رهبری میکردند. و حق آنان را در راه راست رهبری می‌نمود و این حکمای باستانی به کسانی که خود را مقان می‌نامیدند همانندی نداشتند حکمت والا و اشراقی آنان که حالات و تجربیات روحانی افلاطون و جانشینان او نیز گواهی بر آن بوده است را ما دوباره در کتاب خود حکمت الاشراق زنده کرده ایم اندیشه ایران شهری نگرش فرزانگان و سرامدان ایران کهان در اوضاع و احوال روزگاران در راستای طرح یک هنجار اخلاقی، یک سامان اجتماعی و یک نظام سیاسی که در برگیرنده نیکخواهی و بالندگی فرد و جامعه باشد زیر عنوان اندیشه های ایران شهری در اینجا بررسی می شود. پس اندیشه های ایران شهری مجموعه آرمان های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی فرهیختگان و اندیشمندان ایران پیش از اسلام است که گیتی بر بنیاد آن نگاه و بررسی می گردید. این اندیشه ها از سوی، فراورده اسطوره هایی بودند که به تفکر فلسفی نزدیک شده و از سوی دیگر برایند اندیشه های فرزانگان قوم ایرانی در دوره های گوناگون بودند که نگاه عنصر ایرانی را به جهان، انسان، اجتماع، زندگی و پیوند اینان با یکدیگر شکل داد. پس اندیشه های ایران شهری در برگیرنده جهانبینی ایرانی نیز هستند که جلوگاه برجسته آنها شاهنامه فردوسی، گاتهای زرتوش، سنگ نوشته های باستانی و متون کهان پهلوی و برخی نوشته های صده های نخستین اسلامی بگونه اندرزنامه ها و یا اندیشنامه ها هستند. پانویس بسیاری از درون مایه گزارش‌ها و روایات تاریخ نگاران و اندرز نویسان دوران اسلامی از ایران پیش از اسلام آمده است. در اصوره ها باستابی از آرزوها، آرمانها، ارزشها، نگرانیها و عواطف ملتها دیده می شود. برای نقب زدن از اسطوره به اندیشه فلسفی یک ملت کوهن، ژرفنگری در داستانها و روایتها و انگیزهی که در پشت ساخت و اسطوره بوده است بایستی دانسته شود. اسطوره ها و همچنین داستانهای هماسی در برگیرنده پیام در پیوند با نگرش بزرگان و خردمندان قوم ایرانی در پیوند با آنچه میپسندیدند و آنچه آزارشان میداد و نگرانشان میکرد هستند مهم بازخانی و دریافت این پیام ها و شناسایی ارزش‌ها و ارزش‌خ‌ها است که جهانبینی ایرانی را می ساختند. برای نمونه زمانی که جمشید مدعی دارا بودن یک جای رهبری سیاسی و رهبری دینی می‌شود، مردم به او پشت می‌کنند و زهاک را به فرمان روایی می‌پذیرند. این استوره به روشنی بیزاری ایرانیان از گرد آمدن رهبری دین و دولت در یک نهاد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر آوردن مردم به زحاک بدون داشتن دریافت درستی از سرشت او نمونه روشنی از بیخردی ملی و احساسی عمل کردن عموم مردم در تصمیم گیری های اساسی کشوری است در کنار اسطوره و هماسه برای پیبردن به بنمایه های اندیشه ایران شهری باید به کارنامه شهریاران و بزرگان ایران شهر نگاه نمود همچنان که بایست به جرفای اندرزنامه ها و های اخلاقی و سیاسی آنان نیز رفت. با کندوکاف در نوشته هایی که اندیشه ایران شهری در آنها نمود یافته دو ستون داد و خیرد پربهاترین ارزش موجود در این دستمایه ها به چشم می‌آیند. افسون بر این دو ارزشی همچون آبادسازی در سراسر ایران کهن ستوده می‌شود و شهریاری که آبادگر است فرهمند و برحق است در منش و رفتار چهار ویژگی شادزیستی رواداری آزادگی و دهشمندی در نزد نیاکانمان ارجمند و پسندیده بودند نمونه های بسیاری در این زمینه در دست هستند که به برخی از آنها در این دفتر خواهیم پرداخت در جهانبینی ایرانی تاریخ پهنه رسایی و بالندگی اندیشه می باشد و رسایی در گیتی نمود این فرایند بالندگی در اندیشه است. پذیرش جهانبینی ایرانی پذیرش اصالت اندیشه بر ماده و حس است که پیامدهای های گسترده ای در پیوندهای های انسان ها با یکدیگر و با پیرامون خود دارد. در نسخه ایرانی داستان آفرینش نیست که در بندهش آورده شده است، مینو یعنی جهان غیرمادی یا جهان اندیشه پیش از گیتی یا همان جهان مادی و محسوس آفریده شده است. همچنان که داد یعنی قانون ریشه گرفته از عرف جامعه ایرانی باید در گیتی ایرانیان جاری و ساری می بود، اشها به عنوان هنجار و سامان هستی در حکم قانون مینوی بود و پیروی و پاسداشت آن شایسته و بایسته. به که جایگاه شاهنامه در کندوکا و اندیشه ایران شهری روشن شود. یک هماسه ملی مانند شاهنامه چون از سرگذشت یک ملت سخن میراند یادمان تاریخی آن ملت است در دالان زمان، و اگر تاریخ دانشگاهی هم به شما نیاید دستکم تاریخی است به باور و روایت آن ملت و اتفاقا اهمیت آن هم در همین است پس شاهنامه آن دریچه‌ای است رو به افق گذشته که ایرانیان از درونش سرگذشت نیاکان خیش را دیدند. همچنین هماسه ملی ایران یعنی شاهنامه بازتابنده آرزوها و آرمانهای نستهای پیدرپی پی ایرانی در درازای زمان هم هست. پس آینه تمام نمای تاریخ فلسفه ایران نیز می باشد. از این رو شاهنامه بهترین پهنه برای دریافت اندیشه و منش ایران است که در دست یک پرجوهنده می باشد. البته برای درفت درست پیام شاهنامه نباید آن را جدا از اوستا و دیگر متون کهان ایرانی بررسی نمود. بازخانی همزمان شاهنامه و متون کهان ایرانی به روشن شدن هر دوی آنها کمک شایانی می نماید. کتاب پیش درامدی بر اندیشه سیاسی ایران شهری نوشته شاهین نژاد گویندگان آرتمیس علیابادی و بابک پاپیان دسفولی خدمات فنی فرهاد آریان و شهرام آریان اندیشه سیاسی ایران شهری. اندیشه سیاسی سامانی فکری است که به چگونگی تولید و پخش قدرت در جامعه می پردازد. اندیشه سیاسی از ایدئولوژی اقلانیتر و با این تر است و البته نسبت به یک نظریه سیاسی استوارتر، مستدلتر، پختهتر و واقبینان تر می باشد. جوانه های اندیشه سیاسی از نیازهای جامعه برمیخیزد و در راستای گشودن چالش های آن سر و سامان می گیرد. با گذشت زمان بر پایه گوهر و سرشت انوسر هویتی مردم پخته می گردد و پرداخته می شود تا ارائه شدنی و پذیرفتنی گردد در ساخت و ساز یک اندیشه سیاسی، جهان بینی یعنی چرایی و هدف از پیدایش جهان و خیشکاری آدمی در این گیتی و عرف اجتماعی و البته سامان باوری نقش بسیار پررنگی دارند. پانویزه هشت اخلاق و عرف گرچه دو مفهوم متفاوتند ولی با هم در پیوند هستند. عرف هنجارها و توافقات چیره بر روابط اجتماعی است بدون آنکه لزوماً در قانون جامعه گانجنده شده باشند. پس عرف را می توان قانون نانوشته دانست. و از کننده عرف خود اجتماع است. پس عرف را می توان اخلاق جامعه دانست. به سخن دیگر عرف عادتها و رسومی است. که بخش عمده جامعه آن را پذیرفته اند و روا دارند. این عرف به شدت از شرایط مکان و زمان تاثیر میگیرد و پدیده ثابتی نیست. اندیشه سیاسی ازیر از مجموعه های اندیشه ایران شهری است که پیوستگی زیست فویتی و اجتماعی ایران زمین را در درازای صده های طولانی در پی داشته است. اندیشه سیاسی ایران شهری مکتبی است که بر شالوده های اصول جهان آرایی و تدبیر امور کشور در ایران کهن ساخته می شود. این اندیشه مجموعی از آران گرشها و تجربیات سرامدان جامعه ایرانی را در درازای تاریخ درباره امور بنیادین فرمانروایی و کشورگردانی در بر می گیرد. نیاز به یادآوری نمی باشد که به دلیل پیچیده شدن مناسبات اجتماعی، دیگرسانی شرایط جهانی و پررنگ شدن نقش دانش در این روزگار بنمایه های اندیشه سیاسی ایران شهری باید با وضعیت نوین زندگی انسان همسو شود و برای عصر کنونی ارائه پذیر گردد. از این رو با شناسایی و بازخانی مکتب ایران شهری و اندیشه سیاسی آن از خلال دستمایه های در دسترس و ریختن آن در ظرف زمان مظروفی که همانا بنیاد و پایه نوزایی ایرانی می باشد، ساخته می شود. در پی برخورداری از اندیشه سامانمند و در زمینه های جهان و کشورداری نیاکان ما توانستند در پایگزاری نظامی نیرومند و کارآمد در چندین دوره کامیاب گردند. نظامی که هم مدل حخامنشی و هم مدل ساسانی آن مورد ستایش و اقتباس و تقلید دیگر کشورها در زمینه های پس از خود قرار گرفت. عوستا، سنگ نبشته های بازمانده از ایران باستان، متون پهلوی، برخی اندرزنام و پننامه ها و البته شاهنامه فردوسی که از بنیادی ترین مایه های اندیشه ایران شهری هستند، در خود آموزههای ارزشمندی از اندیشه سیاسی را نیز دارا هستند. نوشته های سهروردی تجار و بل و جاویدان خرد ابن مسکویه که در برگیرنده اندرز نامه ها، سفارش ها و سایه اردشیر بابکان، انوشیروان و غیر باشند، سیاست نامه خاج نظام الملک توسی، قابوس نامه انصر المعالی که کابوس، ادب و ادب کبیر روزبه پوردادویه یا ابن مقفع، تاج جاهز و مرز نامه از دیگر دستمایه هستند که می در آنها جلوه‌های های از اندیشه های ایران شهری از جمله سیاسی آن را دریافت. اندیشه سیاسی ایران شهری همچون رشته ناپیدایی بود که در گذره ایران پیش از اسلام به ایران پسا اسلامی حضور داشت و یکی از ابزارهای توانمنده نگهداشت هویت ایرانی در آن صده های بحرانی بوده است. آبشخور اندیشه سیاسی ایران شهری خیشکاری نهاد شهریاری در پاسداشت قوانین طبیعی، عشا و قوانین حقوقی داد بود. اشا یا آرتا سامان کیهانی و هنجار چیره بر طبیعت بود. پاره از فرایافت اشا امروز در واجه نیز شناخته می شود. نگهداشت داشته عشا که در واجه اردی بهشت هم جلوه شده است خیشکاری فرمانروا در عرج به انسان طبیعت و نظام چیره بر هستی بود. آشکار است که بهرکشی و بردسازی قربانی کردن انسان و البته بیرانسازی آلوده کردن زیست بوم از کارهای دروغ زنان و دیف پرستان بودند که در راستای دار کردن عشا به شمار می رفتند. همراهی با عشا پایبندی به نیخواهی خیر همگانی به شمار می رفت. خیری که نه تنها نیخواهی ایرانیان آن روزگار که صلاح دیگر جانداران فلات ایران و زیستبوم و خوشزیستی نستهای نیز دربر می گرفت. بیداد در حق هر یک از این عناصر که در مجموعه زیر درفش عشا به سامان می شدند خشدار کردن نیخواهی همگانی انگاشته می شد. عرف جامعه ایرانی سرچشمه قوانین حقوقی یا داد بود اخلاق ملی جاری در کشور که برآمده از ارزشها، آینها و آداب ایرانیان بود عرف و در پی آن قانون یا داد را تعیین می‌نمود. در اندیشه سیاسی ایران شهری شاهنشاه یا شهریار قانون گذار نبود بلکه از قانون یا داد پدافند مینمود قانونی که ریشه در عرف جامعه داشت و همه شهروندان زیر سایه پشتیبانی آن میزیستند. این نگاه با آنچه در ذهن برخی افراد جای گرفته که شاه را بالاتر از قانون یا حتی خود قانون پنداشن تفاوت بزرگی دارد. در از شهریار از عرف جامعه که خود این عرف هم تحصیل گرفته از اخلاق مدنی و آینهای ملی می باشد پاستاری می کند و در آن راستا فرمان می راند. عرف بیگمان برایند منش و اندیشه های جاری در میان یک ملت است. پس شهریار می باید نگهبان نگهبانه هنجارها، ارزشها و شناساگه مردمش می بود. در یک گزاره ساده و فشرده می توان این گونه اخلاقی بودن سیاست را در نگرش ایرانی بیان نمود. هنگامی که در ایران حخامنشی در فرمولی ساده، گیتیارایی کشورداری و تدبیر امور مردم معنای کار سیاسی بود سیاست در نسخه یونانی خود به مفهوم سیاست در اصر نو نزدیک بود با همه حوشیاری ها،, ها، فسادها و هواشی آن در پیوند با قدرت و ثروت این مفاهیم که ستونهای اندیشه سیاسی ایران شهری به شمار میروند در این بخش از کتاب مورد بررسی قرار می گیرند فر کیانی، شهریاری و کامگی، پیوند دین و دولت و نه یکی بودن این دو، نیخواهی همگان به عنوان هدف از کشورداری، آبادسازی، شایسته سالاری و یک حاکمیت و حکومت. فر کیانی در دیدگاه فرزانگان ایران زمین شرط بنیادی برای فرمانروایی یا خدایی داشتن فروزه‌ای به نام فر بود واژه فر که همان واژه اوستایی خبر است به معنای درخشیدن و تابندگی است و در متون پهلبی اوستا به معنای رسایی جان و نیز آمده است در استور شناسی ایرانی فر و فره و خره نیرویی است نهفته در گوهر هر فرد که اگر در وجود او بتابد کانون رسایی و بالندگی می گردد و آن فرد شایستگی رهبری همگنان خود را می آبد. در قابوسنامه اون مالی به فروغ شاه و اینکه این فروغ به گونه مهروزی و پشتگرمی به همه مردم تابیده می شود می پردازد، آن جایی که به فرزندش می گوید که از بره آنکه پادشاه چون آفتاب است نشاید که بر یکی بتابد دیگری نه. این فروغ و درخشندگی چه بوده و چه ویژگی را نمایندگی می کرده است؟ برایند وجود دو ویژگی داد و خرد در شهریار به فر تعبیر می شد. بنابراین باورهای مزدایی هر موجودی دارای فر میباشد باشد ولی در پهنه کشورداری و فرمانروایی دو فرایافت یعنی فر ایرانی و فر کیانی دارای اهمیت هستند که نخستین آنها در بخش پیش بررسی شد و دومی در اینجا بازشناسی می شود. از دیدگاه نیاکان ما، سرچشمه فر کیانی، ایزدی بوده است یعنی خاصه اورامزدا برای بخشیدن این فروغ ویژه به دل و جان انسان‌های برگزیده بوده است در بند پنجم از فرمان داریوش بزرگ در سنگ‌نوشته بیستون آمده است بخواست اورامزدا من شاه هستم اورامزدا شاهی را به من عطا فرمود در داریوش بزرگ در شوش آمده است آنچه من کردم همه را به خواست اهورامزدا کردم ولی از سوی دیگر همان داریوش برایمان روشن می‌سازد که بخشش فرح از سوی اهورامزدا به وی به دلیل اینی کرداری و دادگری او بوده است از آن رو اهورامزدا و خدایان دیگر من را یاری دادند که پلید نبودم دروغگو نبودم تبهکار نبودم نه من و ندودمانم به راستی رفتار کردم. نبناتوان و نبتوانا ستم نکردم. بنابراین فره کیانی که آبشخورش مهر یزدان به دارنده فر عنوان می شده است در اندیشه سیاسی ایران شهری باستابی از راستی و درستی فرد فرهمند یا همان شهریار نیک است. در بندهش فر کیانی نزد شهریاران پیشدادی و کیانی بوده است. فر کیانی آن است که با هوشنگ و جم و کاووس و دیگر شاهان آفریده شده است. فر آزادگان آن است که در نزد ایرانی آن است. فر کیانی و آفرینگویی مردمان به دارنده فر بیان حقانیت حکومتی از نگاه ایرانیان در هزاره های بوده است. کسی حق فرمانروایی داشته که به سبب کردارهای نیک و سزاوارش و عرج به زندگی جانها از سوی مردم دارنده فر انگاشته می شده است. فر ارسی نبود و از پدر به فرزند منتقل نمی گردید. بر بران در نزد یک نفر فر جاودان و همیشگی هم نبود و با لغزش دارنده فر از او دور میگشت و بدین گونه وی را از حقانیت حکومتی میانداخت فرا یافت فر به وارونه از سوی برخی در روزگار کنونی به مردم شناسایی شده است آنان به گونه ای درباره فر سخن میرانند که انگار هر دارنده تاج و تخت دارای فر است و بنابراین دارای حقانیت فرمان روایی و تازه این فر را ارسی نیز میپندارند که از پدر به فرزند منتقل میشود. در اینجا به این کجندیشی میپردازیم و آماج فرزانگان ایران شهر را از مفهوم فر میشکافیم. در دین کرد از نوشته های با اهمیت بهجامانده از صده نخستین پس از تازش اعراب مسلمان این چنین میخوانیم. و این گونه است که هیچکس دارای رامش و خرد توهی از بیم و دجاگاهی نیست. به همان گونه که هیچ کس نیست نیست که دارای بیم و دجاگاهی سراسر توهی از رامش و خرد باشد. به همین گونه نیز هیچکس حتی هنگامی که در فراسترین پایه از رامش و خرد ایستاده باشد باز هم تویی از بیم نیست و از این گذر دارای دانش کامل نیست. باز نیز به همین گونه فرد گرفتار به گرانترین بیم و دارنده بیشترین دو نیز نمیتواند به کلی تویی از رامش و دانش باشد. بنابراین پاک بودن آدمی از اشتباه، خطا و گناه یا همان معصومیت در باورهای ریشهدار ایرانی جای نداشت. از این رو که خردمندان بلند جایگاه نیز، لغزش پذیرند. بنیاد نگاه ایران شهری در پهنه زندگی فردی و عمومی، خیرد مداری بود و مفهومی مانند اسمت که مطلق اندیشی بیکم و کاستی در آن موج میزند نمی توانست برخواسته از آبشخور خردگرای مکتب ایران شهری باشد. پس فر کیانی نمی توانست محبتی خدایی باشد که شهریار از اهورا دریافت نموده و بنابراین او را بری از اشتباه و گناه کرده و سزاوار به فرمان روایی. درباره فرمانروایی کیقوباد کیانی این چنین می‌خوانیم که فر مدتی به کیقوباد سردودمان کیانی تعلق داشت از پرتو آن پادشاهی ایران رونق گرفت از این رو فر نمیتوانسته وراستی باشد چه برای مدتی به کیقوباد تعلق گرفته است و وی را برای انجام نیکی و داد توانمند ساخته است پس فرکیانی چه بوده است؟ شاه آرمانی آنگونه که اوستا متون پهلوی سنگ ها و البته شاهنامه با مامی نمایانند دارای ویژگی است که هیچ قدرت مداری بدون داشتن آنها سزاوار دستیابی و یا نگهداشت جایگاه شهریاری را ندارد یعنی خرد، داد و آبادگرید برای همین در درازای تاریخ ایران پیش از اسلام چندین بار بزرگان کشور شاهی را از تاج و تخت بر کنار کردند و یا نگذاشتند که بزرگترین پسر شاه پیشین به شهریاری برسد و به جای او فرد سزاواری را به شاهی رساندند با بیگانه شدن شهریار با فروزه های داد، خرد و آبادگری فرح از او دور می‌گردید و او فاقد حقانیت فرمانروایی میشد. به همین سبب بود که در اسطوره‌های ایرانی فر سه بار از جمشید جدا شد که نخستین بار ایزد مهر، دومین بار فریدون و سومین بار گشاس آن را به دست آوردند. اگر تنها بودن در جایگاه شاهی برای فردی فر و در پیش حقانیت فرمان به همراه می آورد، دیگر نباید. شاهی چون جمشید فر را از دست می داد. بزرگ مهر حکیم به روشنی بیان میدارد که از فر شهریار به هیچ کس گزندی نمی‌رسد چون این فر زاده مهر شاه و کشور به یکدیگر است. به شهری که هستند در او مهر شاه نیابد نیازند در بوم راه بدی بر تو از فر او نگذرد که بختش همه نیکویی پرورد. جهان را دل از شاه خندان بود که بر چهره او فر یزدان بود. گردیه خواهر بهرام چوبینه به برادرش یادآور می شود که او از تخمه شاهان نیست و بنابراین نباید چشم به گرفتن تاج و تخت داشته باشد. نبیگان زیبای افسر بود، سزای بزرگی به گوهر بود. چو خواهی که شاهی کنی بینجاد، همه دوده را داد خواهی به باد. این به معنا نیست که شهریاری باید ضرورتا ارسی باشد و حتما فرزند شاه شایسته فرمانروایی خواهد بود. بلکه در پایبندی به سنت ایران شهری که سرداران و سپه سالاران نباید به تاج و تخت دست یازند گردیه از برادر دلاورش بهرام چوبینه می خواهد که بدعت دست اندازی به تاج و تخت را رواج ندهد. نمونه روشنی از اینکه به هیچ روی فرزند شاه الزامن شایسته رهبری باشد، در رویداد زیر ارائه شده است پس از بیرون راندن افراسیاب از ایران شهر بزرگان ایران برای گزیدن جانشین نوذر جان باخته هم آمدند آنها با پیشنهاد برخی برای گزینش یکی از پسران نوذر یعنی توس یا گستهم، همراهی نکردند و آن دو را سخت از فرح ایزدی به دور دیدند این نمونه دیگری از باور سرآمدان ایرانی به ارسی نبودن فرح در خانواده شاهی بوده است. چه اگر فر موروسی بود، دیگر نیازی به همپرسگی بزرگان کشور برای گزینش شهریار نبود و بدون رایزنی سرداران یکی از پسران نوزر یعنی توس یا گست هم به شاهی می رسید. در همین زمینه از آنجا که در فرهنگ ایران شهری ملاک برتری برای انسانها خردمندی است از میان چند فرد مدعی فرمانروایی آن یک سزاوار شهریاری بوده که افزون بر نژاد و تبار والا خردمند نیز بوده باشد اگرچه در فرهنگ ایران شهری به نجاد و گوهر به عنوان ارزش پرداخته شده است ولی سروری و برتری بالاتر از نژاد و گوهر به هنر است. به واجگانی دیگر برتری افراد در هنر با فضیلت‌های به دست آمده او در زندگیش است که بیش از تبار و خانواده او در شخصیت سازی او نقش داشته است. در بندهش آمده است که دو مرد که با هم فراز روند آنکه داناتر و راستگوتر است سرور است اینجا خردمند کسی است که هم دانا و هم راستگو باشد راستگویی در رویارویی با دروغ‌گویی است و در متون کهن تنها به معنای سخن راست نبوده است بلکه راستی و درستی در اندیشه و کردار رانیز در بر گرفته است در گات های نیز نیست شاه بی اخلاق و بیدادگر بسیار نکوه شده است به که زرتوش آرزویش را شاهی آرمانی می تا با شهریار دروغ پرست ستیز نماید کیخسرو در شاهنامه شاه, شاه آرمانی است و جلوه فرکیانی را در همه کنش های وی می شود دید او در اوستا و متون پهلوی نیز به عنوان نمادی از داد و خرد و نیک گوهری بسیار ستوده شده است. او دلاوری است که سرزمین های ایرانی را متحد می‌کند و بر همه کشورها فرمان می‌راند و جادووان و فرمانروایان ستمگار را برمیاندازد. در واقع کیخسرو نمونه مطلق رهبری کامل و بی‌عیب است. اکنون پرسش این است که این خرد چیست که از شروط فرکیانی بوده است؟ خرد از نابترین و غنیترین مفاهیم موجود در اندیشه ایرانی بوده است. ریشه آنواجه عوستای خرطو است که به معنای فروغ گوهرین و پرتوی ذاتی است. خیرت سرمایه معنوی انسان برای تشخیص بد از یک دیگر است. بنابراین فرایافتی متفاوت با عقل اسپینوزا یا عقل دکارتی است که ابزار تمیز سود از زیان می باشد. عقل غربی که پایه مکتب رشنالیزم است نیروی بررسی و واکاوی انسان در قلم روی فیزیک و محسوسات است و متافیزیک در آن جایی ندارد. خرد ایرانی ژرفتر و پیچیده تر از است عقل برخواسته از توان مغز انسان است، برخلاف عقل غربی خرد دارای روح است. بر پایه درکی از متون ایرانی خرد را می توان به معنی عقل زیر چتر اخلاق گرفت. یکی از اندیشمندان بزرگ ایرانی ابن مقفع یا همان روزبه دادبه در این باره می نویسد، تربیت پذیری در سرشت عقل است و با تربیت است که خرد آدمی رشد کند و پاک و منزه گردد و عقل آدمی چون تربیت یابد به کار افتد زیرا رشد و زندگی و زایش خرد با تربیت است به دین گونه باید خرد را عقل پرورش یافته دانست سه گونه خرد در نزد ایرانیان شناسایی می شدند آسن خرد یا خرد خدادادی خردی است که در گوهر انسان است دیگری گوش سرود خرد که فراگیرتن است بنابراین به پرورش انسان برای به کار گرفتن آن نیاز است سومین گونه خرد رشن خرد است که با احساسات و عواطف انسان در پیوند قرار میگیرد و از این راه جلوگاه میشود. می شود ممکن است این پرسش پیش بیاید که اخلاق ای سیال و متغیر با زمان و مکان. بنابراین خرد نیز امریست که با گذشت زمان و با تغییر اخلاق دیگرگونی یابد. پس بر این پای کنشی که روزگاری خردمندانه به شما میرفت امروز شاید نابه خیردانه جلوه نماید. در پاسخ به این پرسش گرچه میتوان گفت که برخی ارزشهای های اخلاقی، با زمان و مکان دگرسان میشوند ولی روح حاکم بر اخلاق یا همان قوانین طبیعی ثابت و پایدار میماند و هر مانند دزدی، جنایت، دروغ و آز که با جان بیدار انسانی نپسندد و بیداد در طبیعت بیافریند همیشه ناپسند و غیراخلاقی اخلاقی انگاشته می شود و پیرو زمان و مکان نمیباشند خردورزی در بیشتر متون ایرانی مربوط به پیش از اسلام شرط لازم برای کامیابی در زمینه زندگی جمعی و فردی می باشد و به عنوان بهترین فرزانگی سفارش شده است. از متون پهلوی همچون اندرزنامه بزرگمهر و مینوی خرد گرفته تا متون فارسی پس از اسلام که ریشه در دوران پیش از اسلام داشتن مانند برزونامه، فرامرزنامه و کوشنامه، سراسر امباشند از ستایش خرد مداری و نکوهش ناب خردی. در این میان گادهای زرتشت و شاهنامه فردوسی لبریز از سفارش روشن به پیروی از خرد هستند گونه ای که خرد را بزرگترین سرمایه انسان می دانند. استاد سخن چنین می گوید. خرد افسر شهریاران آران بابد. خرد زیور نامداران بابد. خرد زندگی جاودانی شناس، خرد سایه زندگانی شناس، خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. در سی تا سی و پنج بیت آغازین شاهنامه، بسته به نسخه‌ای که محره برداری قرار گیرد، فردوسی 20 بار واجه خرد و چهار بار واجه اندیشه را به کار برده است، این اندازه بالا از حضور یک فرایافت یعنی خرد در اثری که به گونه ای شناسنامه ایرانیان به شمار می آید، نشانگر نیاز بنیادی جامعه ایرانی به این ارزش والای انسانی بوده است فردوسی همچنین شاهنامه را با گزاره برجسته به نام خداوند جان و خرد آغاز می نماید آغازی که متفاوت با دیگر آثار ادبی ما در همه این هزار و اندیسال میباشد نخستین مرد و زن در اسطوره ایرانی هنگامی که از پیکر گیاهی به پیکر انسانی دگرسان میگردند از سوی اهورامزا سفارش می شوند. هرمزد به مشی و مشیانه گفت که مردمید، پدر و مادر جهانید شما را با برترین عقل سلیم آفریدیم جریان کارها را به عقل سلیم به انجام رسانید اندیشه نیک اندیشید گفتار نیک گویید، کردار نیک ورزید، دیوان را مستایید. برای این دو انسانی که می تا نسل آدمی را در کره خاکی بگسترانند، گسترانند، عقل سلیم یا هماخرت بزرگترین سرمایه برای زندگی انگاشته شده است، برای پیکار با دیوان اهریمنی خرد ساز و کار آدمی است و آن است که میتواند انسان را از بلایای اخلاقی و ویرانگر رهایی دهد و آسودگی گیتی و مینو را برای آدمی به همراه بیاورد. زدان بپرسید پس شهریار که چون دیو بادل کند کارزار به بنده چه داده است کیهان خدیو که از کار کوتاهی کند دست دیو چون این داد پاسخ که دست خرد ذکردار اهریمنان بگذرد. خرد با جان تو را رهنمون کراهی دراز است پیشندرون. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است. دل و جان داننده زو روشن است. در گاتها زرتشت نیز میگوید. بهترین گفته را با گوش بشنوید. با اندیشه روشن به آن بنگرید. سپس هر مرد و زن از میان دراه موجود نیکی و بدی یکی را از روی خرد و اختیار برگزینند در جایی دیگر زرتوش به دختر خود، کوروچیستا و دیگر دختران دم بخت میگوید بر پایه خرد خویش و با آگاهی تمام همسر خود را برگزینند مردان فروخ نویسنده یکی از متون پهلوی در صده نهم شرح میدهد که چگونه به بررسی دینها و آینهای دیگر پرداخته تا بتواند خرد را جستجو نماید و سرانجام آن را نه در ادیان و کیشهای رایج قرار قراردادی که در راستی و درستی یافته است درباره این سفر حقیقت یاب گونه می نویسد و چون به این ترتیب نگریست است به خواستاری خرد در این جهان شهر به شهر و ناحیه به ناحیه درآمد و از بسیار کیشها و گرایش مردمانی مردمی که آنان را در دانایی برتر میاندیشید، پرسید و پژوهش کرد. و چون دید که هر یک از آنان چنان متناقض و مخالف دیگری است، آنگاه دانست که این کیشها و گرایش که با همین چنین متناقض هستند نمی توانند از اندیشه ای ازدان باشند، زیرا که دین ایزدان راستی و قانونشان درستی است، پرسش دوم این است که این داد چیست که آن را نیز از شروط فرکیانی می دانیم و بدون آن فری برای فرمان موجود نیست و پیروی از او نارواست. داد یا همان دات یا داتا در ریشه خود معنی قانون و سامان یا نظام می دهد، به همین دلیل دوره پیشدادیان در شاهنامه به عصری گفته می شود که نخستین شیوه قانونگذاری در آن روی میدهد و ایرانیان با سامان و نظام اجتماعی آشنایی مییابند در مقدمه شاهنامه ابو ابوالمصوری میخوانیم که نخست پادشاهی که بنشاست هوشنگ بود و او را پیشداد خواندند که پیشتر کسی که آین داد در میان مردم پدید آورد او بود و به ترتیب نخستین قانون در میان ایرانیان در زمان هوشنگ رخ داد فرایافت داد در اندیشه ایران شهری در برگیرنده صلاح کشور است و تفاوت ظریفی با ادالت اروپایی یا همان جاستیس دارد هرچند این فرایافت معنی امروزی خود یعنی عدل و ادالت را هم در بر میگیرد، ولی محدود به این دو مفهوم ارزنده نمی گردد. داد در فرهنگ ایران شهری به معنی عدل است یعنی هر چیزی و هر کسی را در جای خود نهادن و به معنی ادالت است یعنی هر حقی را به جا آوردن و عدا نمودن افسون بر اینها داد در خود معنای قانون و اشا را نیز در بر قانون بر پایه مقررات در زندگی روزانه و اشا هنجار و سامان موجود در هستی بود که عرج به این دو آسایش و آرامش دو جهان یعنی گیتی و مینورانیز به همراه داشت. پس از خیرت فرایافت داد بیشتر از هر ویژگی دیگری در شاهنامه ستوده شده است. در شاهنامه نزدیک به سد و بار واژه دادگر هم به کار برده شده است که نشانگر جایگاه آن در ذهن و اندیشه نخبگان ایران شهر در روزگاران کوهن بوده است. به اندازه ای داد و بیداد برای انصر ایرانی ملاک و میار نیکی و بدی بودند که ستمکارهی چون زحاک ماردوش که 17 پسر کاوه آهنگر را بکشند داده بود برای گذشتن از ریختن خون 18 همین پسر کاوه از وی خواست تا دادگری و مهرپروری زحاک را گواهی دهد یعنی حتی فرمانروای بدنام و رسوایی چون زحاک اهریمن کیش نیز برای ماندگاری حکومت خود نیاز به تایید رعیت و اقرار بر دادگری نداشته اش داشته است. گزنفون یونانی داستانی را درباره کوروش روایت می کند که نگاه ظریف ایرانی را به مفهوم داد و بیداد بیان می‌کند. کوروش <وضحف> پسر <قصال> پادشاه انشان در دوران کودکی دو مردی را در نزدیکی خانه اش دید که یکی درشتندام و بلند بود ولی جامعی تنگ و کوتاه به تن کرده بود دیگری ریزندام و لاغر بود ولی رختی بلند و گشاد بر داشت. کروش دستور داد تا آن دو نفر جامعه را با هم عوض کنند تا هر دو رخت مناسب و برازنده بر داشته باشند. اکنون پرسش این است که آن چه کوروش کرد داد بود یا بیداد؟ داد بود چون دو نفر که در رخت خودشان راحت نبودند را دارای جامعه های اندازه و برازنده نمود. بیداد بود چون حق گذینش و مالکیت خصوصی دو شهروند را از ایشان سلب نموده بود. فارق از اینکه این داستان را راستین یا افثانهی بدانیم، نفس وجود این چنین جستارهای ژرفی در مقوله داد، نشانگر توجه ویژه و دقدقه چشمگیر جهان ایرانی در درازای صده های طولانی نسبت به این مفهوم والا و ارزنده می باشد. در پیوند با داد به معنی ادالت هرودوت داستانی را از اصر حخامنشی بازگو می کند که جالب توجه است. کمبوجیه از رشوه ستانی بسیار نفرت داشت او فرمان داد تا یک قاضی را که با وجود بودن مال و منال کافی رشوه گرفته بود تا حکم ناحقی صادر کند را بکشند و پوستش را بکنند پوست قاضی فاسد را زیر پای قاضی بعدی انداختند تا هرگاه وسوسه شد که رشوه دریافت کند به یاد قاضی پیشین بیفتد و جرأت نکند تا بر انسانی بیداد روا دارد در خصوص دادگستری و رعایت کامل حقوق مستمندان و همچنین توانمندان و پاداش نیگوکاران و کیفر بدکاران داریوش کم چنین میگوید نمان و ندودمانم دروغگو و بیانصاف و بدقول نبودیم. من برابر حق و ادالت رفتار کردم. ناتوان و توانا را نیازردم. نیکوکار را نیک نواختم و بدکار را سخت کیفر دادم. رسم نیکی که در هزاره پس از آن در ایران شهر برپا بود، در پی پاسداشت حقوق مردم که بر پایی داد یا قانون کشور بود، پدیدار گشته بود، این رسم بار عام جشن نوروز در زمان ساسانیان بود بدین گونه که هر کس که مورد ستم قرار گرفته بود می توانست از هر ستمگری حتی خود شخص شاه در نزد شاه شکوه کند و درخواست دادخواهی نماید به حضور پذیرفتن رعیت به مناسبت های ملی و دادن امکان دادخواهی به آنان در راستای نشان دادن اراده شهریار برای جاری کردن داد در کشور انجام می شود. در سیاست نامه خاج آمده است رسم ملکان عجم چنان بود که روز مهرگان و نوروز پادشاه مرعام را بار دادی و هیچ کس را بازداشت نبودی. فارغ از اینکه در مرحله عمل چندازه این سنت کار آمد و یا ناکار بود، نفس این سنت پسندیده خود نشانگر پاسخگو بودن همه مراجع، از جمله خود شاه در برابر ملت در زمینه کار بود. پافشاری نظام حکومتی بر بستن همه درهای اعمال بیداد اهمیت مقوله دادگری در پاسداشت حقانیت شهریاران را نشان می داد. ابن مقفع اندیشمند و دانشمند برجسته ایرانی دوره بنیومیه در پیوند با شرایط فرما در نگاه ایران شهری چنین می گوید. مردی که به درستی خود را به داد در اندیشه، گفتار و کردار وادار سازد، فرمانرواست. رواست. به دین گونه اندیشمند بیرقیب صده های نخست هجری، داد را از شروط لازم برای داشتن حقانیت در فرمان روایی می داند. در پننامه آذرپاد و مینوی خرد آمده است که انسان نیکوکار دادگر است و می داند که اجرای تنبیه روانی مگر مگر که حقیقت جرم ثابت شده باشد. او با دشمنانی که با ما در حال پیکار هستند نیز با داد و امصاف رفتار می کند. اینجا دیگر دادورزی نه تنها برای خودیها سفارش شده که رعایت داد در رویاروی با دشمنان نیز اندرز داده شده است، در های پس از تازش اعراب مسلمان یکی از جنبشهای های ایران گرایانه پس از چیرگی خلافت عربی بر ایران خیزش عیاران یا جوان مردان بود که برای ستاندن داد ستم دیده از ستمگر برخواسته بودند و از دل این گرایش دادخواهانه ایرانی یعقوب لیس صفار برآمد. به عبارتی دیگر از بستر یک ارزش تاریخی ایرانیان یعنی همان دادجویی یک جنبش سیاسی نظامی ایرانی جوشیدن گرفت که تا یک گامی تصرف بغداد و سرنگونی خلافت عباسی نیز پیش رفت اگر ارزشی چون خرد در بخشی از ایران زمین در زیر چیرگی سامانیان اصری از درخشش فرهنگی را رقم زد، دیگر ارزش برجسته فرهنگ ایرانی یعنی داد در جای دیگر از کشور سفاریان را برای دادخواهی ایرانیان بر علیه خلافت عباسی برانگیخت و سفاریان برای 17 سال سیستان، خراسان، کابل، سند فارس و کرمان را در چیرگی خیش داشتند و از نخستین پشتیبانان زبان فارسی بودند. استقلال دادگستری و وجود داوران مقتدر که بیرون از دامن نفوذ قدرتمندان به داوری و دادگستری می پردازند شرط لازم استوار نمودن داد در جامعه است. این چنین سامانه دادگستری در ایران وجود داشت و این بر دادگری را در کشور شدنی می نمود. اردشیر دوم حقامنشی در پی دریافت گزارشهایی که درباره تیرپاد فرمانده نیروی دریایی گسیل شده او به سلامین داده شده بود، وی را به پایتخت خواست و به دادگاهی با سه داور زرد سپرد با وجودی که فرمانده ارتش ایران آرنتاس داماد اردشیر شاه بود گزارشی بر علیه تیرپاد فرستاده بود داوران به دلیل نبودن مدارک و شواهد استوار تیرپاد را از اتهامات تبرئه نمودند هنگامی که شاه تصمیم داوران را دریافت بر پای استدلال آنها تیرپاد را به جایگاه بالاتری رساند و از داوران دادگر نیز سپاسگزاری کرد رخداد اندیش برانگیزی در ادبیات ایران درباره بهرام گور و در پیوند با مقوله داد گزارش شده است. داستان این گونه است که بهرام گور که غرق خوشگذرانی بود امور کشور خود را به وزیر خود، راست، روشن، سپرد و وزیر نابکار از قفلت شاه سود جسته و با ستم به مردم به مال می میپردازد. او کار را به آنجا میرساند که خاقان ترک را به تجووز به ایران بر میانگی خواهان و سپاهش بهرام را قفلگیر می کنند و او را شکست میدهند. بهرام ناامید و سرگشته به دامان صحرا پناه می برد. در آنجا به شبانی برمیخورد که سگی را به دارا آویخته است. هنگامی که بهرام دلیل این کار را از شبان جویا می شود در می که آن سگ نر با ماد گرگی در آویخته بوده و هر روز یکی از گوسفندان گله را به این گرگ پیشکش مینموده است بهرام بیدرنگ همانندی این داستان با وضعیت کشور را در میابد و خود را در نقش شبان غافل وزیر طبحکار را در قالب سگ خیانتکار و مردم را به ماننده گله قربانی می باور به اینکه بیداد در ایران کشور را به سوی زوال و تباهی می برد ریشه ژرفی در یادمان تاریخی قومی ما دارد در ترجمه چند متن پهلوی آمده است که پس از فروریی ساسانیان از بزرگمهر پرسیدند که سبب فروپاشی ساسانیان چه بود؟ پاسخ داد: کارهای بزرگ را به مردم خرد سپردند و کارهای خرد را به مردم بزرگ بزرگان به کارهای کوچک دل ننهادند و خردان از عهده کار بزرگ برنیامدند ناچار هر دو کار تباه گشتند یار چه زیستن بزرگمهر تا حمله تازیان به ایران از دید تاریخی نادرست است و پشوانه تاریخی ندارد ولی مقصود از نسبت دادن این سخن خردمندانه به بزرگمهر حکیم نشان دادن نگرش آگاهانه عنصر ایرانی است به تباهی و ویرانی که بیداد یعنی بر جای نبودن اشخاص در جایگاه مناسب خود در کشور باعث می شود آنان که این داستان را درباره بزرگمهر ساخته بودند به درستی نقطه آسیب پذیر جامعه ساسانی در سالهای واپسین را که همان سپردن کارهای بزرگ به افراد کم‌مایه بود یعنی بیداد شناسایی کرده بودند. گسترش داد همراهی و همدردی فرمانروا با جامعه است که باید به آن سر و سامان دهد. در فرهنگ ایران شهری بابر بر این بود که فرمانروایی که دادگستر و رعیت پرور باشد و بتواند مردم خود را در مسیر خوشبختی، آرامش و رفاه نسبی راه بر این دارای فره است و تا زمانی که این فرمان روا از جاده داد و خرد دور نمیشد دارای این فره باقی می ماند و بنابراین دارای حقانیت برای شهریاری بود. در بخشی از وصیت هوشنگ از شاهان پیشدادی به فرزندش میخوانیم هر هران کس از پادشاهان که به ستم دست یازد از شرف پادشاهی و آزادگی خارج شده و به سمت پستی و شر و نقصان سوخ یافته و همانند رعیت و بردگان گشته است فر کیانی اینجا در شرف پادشاهی و آزادگی جلوه یافته است در چندین سروده گات ها نیز آرزوی زرتشت برای شهریاری آرمانی و دادگستر را بروشن می دید. هنگامی که کیگوشتاسف از گسیل کردن جوانان خانواده خیش به همراهی سپاه ایران برای رویارویی با تورانیان سر باز می زند، وزیر خردمندش جاماسپ این کنش را تباه کننده فر شاهی میداند و شاه را در این باره سرزنش می کند. گریشان نباشند پیش سپاه، نهاده به سر بر کیانی که یارت شدن پیش ترکان چین که باز آورد فره و پاک دین توزین خاک برخیز و بر گاه مکن فره پادشاهی تباه نرفتن فرزندان و برادران شاه در پیشا پیش سپاه ایران برای نبرد با دشمن بیداد است و بیداد تباه کننده و از میان برنده فر شاهی دادگسترانیدن نه یک گرایش ستایش شده در کشور که بالاتر از آن یک باید اخلاقی و قانونی غیر قابل زنی بوده است. از دستگاه دادگستری در ایران حخامنشی، گزارش‌هایی از صدور احکام سنگین علیه افراد خاندان شاهی و درباریان در دست است. حتی داوری به نام راکوسس فرزند خود را برای گناهی که مرتکب شده بود محکوم به اعدام کرد. در بخشی از شاهنامه که اردشیر پاپکان اندرز سیاسی می به روشنی مفهوم فر را نشان می و شاه بیدادگر را سزاوار تاج شهریاری نمی داند. دلت بسته داری به پیمان او، روان را نپیچی چیز فرمان اوی، بر او مهر داری چو بر جان خیش، چو با داد بینی نگهبان خیش، قمه پادشاهی جهانجوی راست، زگیتی فزونی سگالت نکاست، گر از کارداران و از لشکرش، بداند که رنج است بر کشورش، نیازت بداد او جهاندار نیست، بر او تاج شاهی سزاوار نیست. حوشنگ ای و همچنین فریدون آبتین که در بند کننده زحاکه است، با دهش بر کشور فرمان راندند و چشم خیش را بر روی بیداد بر مردم نبستند زگرد فریدون و هوشنگ شاه همان از منوچهر زیبایگاه که گیتی به داد و دهش داشتند به بیداد بر چشم نگماشتند در آیین کشورداری ایران نه تنها خود بیداد ناپسندیده و اهریمنی است جبران ستم گذشتگان و دادخواهی از ستم دیدگان دولت پیشین نیز از خیشکاری شهریار بیداد دلی چون فریدون است. فریدون سیرتی بنها در عدل و انصاف که از آن پسندیده تر نباشد و هرچه به ظلم از مردم ستانده بودند فرمود تا به مردم بازگرداندند. زمینهایی که زحاک به ستم از مردم ستانده بود، به خداوندان یا وارثان آنها برگرداندند و یا بر درویشان یا بینوایان وقف نمودند دادخواهی برای رعیت که پناهشان شهریار است و درمان دردها و رنجهای آنان باید در دستور کار شهریار در تدبیر امور باشد و اگر نهاد شهریاری توانایی انجام اینها را نداشته باشد باید برای سرنگونی آن برخاست هرگاه تنگ دستی و مزلت در همه جا پدیدار شود و پادشاه را شایستگی آن نباشد که با نیروی خیش بدان پایان بخشد و یا اینکه در غم خلق نباشد و یا راه یافتن درد آنها را نداند چون این پادشاهی که توانای چیری شدن بر درد را ندارد و درمان آن را نداند به یقین هرگز به عطل و داد شاهی نتواند کرد پس بر دیگران است که به خاطر داد با او درآویزند. در مینوی خرد دولتی که نتواند امنیت و داد را در کشور برپا نماید و نگهداری کند به عنوان ناشایست ترین حکومتها شناخته می شود. آن سروری بدتر است که نتواند کشور را ایمن و مردمان را بیستم دارد. اردشیر بابکان خیشکاری نهاد فرمانروایی درباره اجرای داد را اینگونه گونه می بینند. بر بینند. پادشاهان است که حق ضعیف از قوی بستانند و سهم فقرار را از توانگران بگیرند و نسبت به زعفا مهربانتر و دلسوزتر باشند. او بدترین پادشاه را کسی می داند که بیگناهان از او بترسند، هر زمان شاه از دادگری سرپیچد مردم باید از فرمانبری او سرپیچند بدین گونه بیدادگری حکومت به از دست رفتن حقانیت آن میانجامد و بنابراین نافرمانی مردم از دولت نه تنها توجیه میشود که الزامی میگردد به روشنی در این گزاره‌های بالا روشن می شود که فر پدیده ای ارسی و ژنتیکی نیست و با پشت کردن شهریار به خرد و داد فر از وی جدا شده و او را از حقانیت فرمانروایی میاندازد. در این زمینه حافظ که به دریافت درست و والایی از مفهوم فر رسیده بود به زیبایی گوهر و سرشت شهریار را زامن حقانیت وی برای دولت مداری می داند. و آن را به هیچ روی پدیده ای الزامن ارسی نمیدانند تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای بر خود از تخمه جمشید و باشی. انوزیران بسیار روشن و گویا تکلیف خیش را با اشراف و بزرگان کشور در زمینه ریت پروری و پهیز از بیداد روشن نموده است. دوستترین ویژگان و نکوترین بندگان در چشم ما آنانند که با مردم هم بر شیوه ما باشند و با تویی دستان و درویشان مهر ورزند و دادشان بدهند چه هر که بر اینان ستم کند بر ما ستم کرده و هر که به اینان زور گوید به ما گفته و خواسته است که زینهار ما را که نگهبان و پناهگاه فرودستان است نادیده انگارد. پس این فر با جوشش و کوشش خود انسان در به آوردن فروغ روشن و نیک خواهی همراه بود. نیک کرداری و نگهبانی از زندگی مردمان و فراهم نمودن شادی و آرامش آنها به نگهداشت فرمی انجامید. زدودن درد مردم و پروریدن زندگی بود که حقانیت فرمانروایی را می توانست به یک فرد نیرومند ببخشد. با این همه چون انوشیروان بخت بیداد اشراف و ناتوانان را بالا میداند از رعیتی که شکوه بر علیه فرد توانگری نزد شاه ببرد درخواست گواه نمی کند و او را موهق میداند در آنجا که سخن از راستی و داد باشد یزدان در چشم ما ارجی برای خیشان و بندگان و پیرامونیان ما ننهاده است زیرا که نزدیکان شاه با شکوه و نیرویی که دارند ستم کردن از ایشان برمیآید آید و اگر شهریار آنان را به خیش واگذارد هر که با ایشان در بر برفتد مگر کسانی از ایشان که هم به فرهنگ شاه فریخته باشند و آین او را پاس بدارند و با مردم او مهربان باشند که اینان اندک هستند پس ستم هایی که از ایشان می ما را بران داشت تا در دادخواهی هایی که بر آنان به نزد ما میآورند گواه نخواهیم. هم او درباره سروتندوزی فرمان روا و فسادی که از آن دچار کشور می شود می گفت... شاهی که خزانه خود را با مال رعیت آباد می دارد، مانند آن است که پی خانه خیش می و بام خانه را با آن اندود می کند. تنسر رایزن برجسته اردشیر پاپکان که از مهمترین بیان کنندگان اندیشه سیاسی ایران شهری است در پاسخگویی به برخی نگرانی های پادشاه تبرستان به اقدامات اردشیر هر کار بیدادگرانه را ضد ارزش میداند و به صرف کوهن بودن و سنتی بودنش آن را روان نمی داند اگر از ظلم پیشینیان شاهنشاه اردشیر چیزی ناقص میکند که صلاح این عهد و زمان نیست گویند که این رسم قدیم و قاعده اولینان است ظلم در هر اهدی که کردند و کنند سنت نامحمود است اگر اولین است و اگر آخرین این روشن ستایش برانگیز است که آنچه نادرستی و زشتی است چه سنت باشد چه ناعینی باید کنار گذاشته شود و هر رسمی را تنها به دلیل کهان بودن نمیتوان در جامعه نگه داشت. جاهز در بیان آین و مراسم دوره ساسانیان به نشستن شاه در روزهای مشخص برای بررسی درخواست و شکفه های مردم حتی از خود شاه اشاره می کند. در آن روز شاه آشکارا، فساد و زوالی که به دست فرمانروای بیدادگر و گنهکار در کشور رخ می دهد را مطرح می نماید و گمراهی شاه را بدترین بلای جامعه سوز می انگارد و این چنین می گوید. ای موبد تو این را بدان که در پیشگاه خداوند از گناه پادشاه هیچ گناهی بدتر نیست زیرا پادشاهان از جانب وی گمارده شده اند تا رسم ستم براندازند و از زمین تخم بیداد برارند و اگر خود ستم کار و جابر باشند دیگران را آسان افتد که آتشکده ها ویران کنند دخمه های مردگان بکاوند ایشان بدزدند. بنابراین خیشکاری شهریار که از سوی یزدان پشتیبانی می شود، از کندن بیداد در کشور است. در فراخان همگانی که در جشنهای ملی در زمان ساسانیان برگزار می شود، این گونه بود که هر کسی که مورد ستم قرار گرفته بود می توانست از هر ستمگری حتی خود شخص شاه در حضور شاه شفه کند و در دادخواهی خواهی نماید،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 فارغ از اینکه در مرحله عمل چنداذه این سنت کارآمد و یا ناکارآمد بود، نفس این سنت پسندیده خود نشانگر پاسخگو بودن همه مراجع از جمله خود شخص شاه در برابر کارکردشان بود. پافشاری نظام حکومتی بر بستن همه درهای بیدادگری، اهمیت مغوله دادگری در نگهداشت حقانیت شهریاران را نشان میداد. همچنین در نوروز و مهرگان که برای رفتن مردم به پیشگاه شاه و بیان مشکلاتشان فراخانی داده میشد. بر حسب فرمان پادشاه موبدان موبد گروهی از قضات و معتمدین خود را میگمارد تا به دروازه های کاخ شاهی مراقب باشند که نگهبانان و پاسداران پادشاه کسی را به ورود من نکنند. رسم بار دادن به مردم برای دادخواهی نمودن در پیشگاه شاه ریشه کهنتری هم داشته است. جاهز اردوان اشکانی را بنیانگذار این رسم دیرین می داند. اردوان نخستین پادشاهی بود که این در بگشود یعنی مردم را بر این بر اجازت داد تا آنچه بخواهند از او طلب کنند و او نیز نیازمندان را محروم نمی کرد. و چه بسیار که به بخشودن و کرم کردن پیش دستی می کرد. داستانی از شاپور دوم ساسانی بازگو شده است که اوج تیزبینی و دوراندیشی فرمانروای ایران شهر را در زمینه پاستاشت داد در کشور نشان می دهد، این شهریار در واکنشی که به پرخوری و زیاد خواهی موبدی که برای جایگاه دادستانی کشور در نظر گرفته شده بود نشان داد که بینیازی و دوری از زیاده خواهی و آز شرط لازم بر نشستن در جایگاه داوری در دادگستری ایران شهر است. و چون میز خوراک را ترک کردن شاپور گفتش اینک مرخصی و میتوانی به شهر خود برگردی هرچند تو را برای بزرگترین مناسب قضاوت خواسته بودم ولی نیاکان و پادشاهان پیش از ما گفتند که هرکس در برابر چشم پادشاهان آزمندی کند، صد البته به دارای رعایه و توده مردم و آنها که ضعیفترند آزمندی بیشتری خواهد کردند. از برایند همین دستمایه های بازمانده از ایران باستان ساسانی شناس نامداری چون کریستینسن سن درباره دادگری این دغدغه اصلی نظام شهریاری ایران این گونه می نویسد. عموماً ادالت در ایران باستان مقام بسیار جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائن کافی در دست هست که پادشاهان جدا مراقب حسن جریان گستری و درست دادرسان بودند. شاه بهرام یکم فرزند هرمز ساسانی هنگامی که مانی و مانویان را فتنگر میداند و در پی از میان بردن آنهاست حتی در خشم به یاد می‌آورد که در شهریاری ایرانی نمی توان بدون دلیل انسانی را کشت و دادگستری نیازمند برهان درست برای کیفر دادن گناهکاران است. بهرام در انجمنی که از بزرگان و دانشمندان برپا شده بود گفت من این سگ زندیق و اتباع او را میخواهم که همه را بردار کنم تا این فتنه و فساد فرو نشیند ولی در عدل و پادشاهی نیست بیالزام حجت کسی را کشتن فردا بامداد با او مناظره کنید و او را مقهور گردانید تا من را سیاست کنم جامعه شناس برجسته تونسی ابن خلدون نامدار نگاه هنوشی روان به داد و تاثیر داد در کشورداری را از زبان خود وی این گونه بیان میکند کشور به سپاه و سپاه به دارایی و دارایی به خراج و خراج به آبادانی و آبادانی به داد استوار گردد و داد وابسته به درست کرداری کارگزاران و درست کرداری کارگزاران وابسته به راست کرداری وزیران است یکی از زوایای نگاه ایران شهری به مقوله داد در همین گزاره باستاب یافته است بر این پایه داد در کشور پیش نیاز آبادانی است بدینگونه دینگونه داد نه تنها به هیچ روی پخش منصفانه فقر و رنج در میان ملت نیست بلکه پخش سخاوتمندانه رفاه و آسایش در میان مردم است. کیقوباد سردودمان کیانیان گفته است که رعایت شون و برپاداشتن آین داد و مردمی آید کشور می شود و به صلاح آن است و آنچه به صلاح کشور انجامد به صلاح مردم خواهد بود در همین راستا دیگر شاه کیانی بهمن پسر اسفندیار برپایی و نگهداشت داد را شرط لازم برای صلاح ریت و در پیان صلاح کشور میداند ملوک به اصلاح خود محتاج ترند زیرا که ریت در صلاح و فساد ایشانند پس ریت را قوام نیست یعنی استحکام احوال نیست مگر به صاحب ریت که ملوک باشند و قوام نیست پادشاهی را جز به حیبت و حیبت نیست ملوک را جز به ادالت. پس دادگری خواستگاه اقتدار و استواری دولت است حکیم عمر خیام درباره نظارت مستقیم بر روی کارگزاران توسط شخص شاه برای جلوگیری از ویداد آنان می نویسد. ملوک اجام کاراگاهان را در مملکت به هر شهر و ولایتی گمارده بودند تا هر خبری که میان مردم حادث گشتی پادشاه را خبر کردندی و چون حال چنین بودی. دست تتاول کوتاه بودی و عمال بر هیچ کس ستم نیارستی کردن و یک درم از کس به ناحق نتوانستی ستاندن و اگر کسی از عمال چیزی بر ولایتی یا روستایی بیرون از قانون در افزودی اون شغل بدون ندادندی بلکه او را مالش دادندی تا کسی دیگر آن طمع نکردندی که زیادت از مردم بستاند و ملک خراب گردد نظامی گنجوی که خود است که آین ایران باستان را آتش پرستی و ناپسند میداند داند دادورزی شهریاران ساسانی را اینگونه به رخ مسلمانان می کشد جهان ز پرستی شد چنان گرم که بادازین مسلمانی تو را شرم نظام الملک توسی در سیاست نامه در باب داد سخن بسیاری گفته است زیرا او ادالت را برای به سامان کردن ایران زمین که با آمدن ترکان آشفته و پریشان گشته بود کارآمد میدانست و برای بیان شیوه های دادگری از شاهان ایران باستان داستان ها و حکایت ها می آورد داد را ابزار اصلی مهار قدرت سیاسی در جامعه می دانست. او می نویسد؟ شیروان بزرگان رو گفت پیوسته شما را همیگویم گویم که با رعایا نیکور رفتار نمایید و به جزمال حق نستانید من حرمت شما نگه می دارم و شما نگه نمی دارید و شما سخن من در گوش نمی گیرید و از خدای نمی ترسید و از خلق شر نمی دارید. و من از پادآفری ازدان همی ترسم پانویس 133. برخی با دید سرزنشی از سنگدلی انوشیروان در سرکوبی مزدکیان یاد می‌کنند و بر این پای ستون داد و دادگری را ملاکی برای حقانیت فرمانروایی در نزد ایرانیان باستان نمی‌دانند در این بار نیاز به توضیح می باشد خاننده ارجمند نباید جنبش مزدکی را یک دین و یا کیش به عنوان رقیب آینهای زرتشتی مسیحی و مانوی بپندارد، بلکه باید آن را به مانند یک خیزش اجتماعی انقلابی و تندرو بررسی کند گرچه این جنبش گسترده بر بنیاد دادخواهی اجتماعی و نیازهای های پایعی رده های فرودست جامعه پای گرفت ولی پس از چندی تندرویها و تبهکاری برخی از مزدکیان نابودی بافت و هنجارهای اجتماعی را به همراه داشت که کشور را به سوی ارس همگسیختگی و آشوب گسترده فرو برد این آسیب به پیکر جامعه آن روز واکنش کنش توده پایین دست به نبود پخش دادگرانی دارایی و رفاه بود و از این دید روا و سزاش مرده میشد ولی با گذر زمان روند پیش آمدهایی که فرومایگان و اوباش را بر جان و مال مردم چیره ساخت و همچنین کشور را از سوی دشمنان بیرونی آسیب پذیر نمود از این جنبش پیشرو و انسانی یک خیز شکور و ویران کننده ساخت که خیلی از مردم به دنبال راهی برای رهایی از آن بودند. فرصت طلبی برخی مردم فروده است که از ناب سامانی اوزا بهرگیری می کردند و به ناموس و مال رده های مرفع جامعه دست رازی می کردند جامعه را به سوی فروزی فرهنگی و اخلاقی می کشند. این چونین دریافت می شود؟ که بیش از چهل سال کشاکش مزدکیان با سالاران زرتشتی، بلند پایگان و توانگران جامعه را بسیف فرسوده و خسته کرده بود. امنیت جانی و مالی از میان رفته بود و برخی از توده سرکش که آموزه های مزدک را بحانهی برای خان شکنی و نافرمنی می دیدند دست به مصادره دارایی های توانگران و دست رازی به حریم خانه های آنان می زدند. همچنان درباره انوشیروان این نماد دادگری استاد سخن سعدی میگوید آوردند که نوشین روان عادل در شکارگاهی سید کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت دستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد گفتند از این قدر چه خلل آید گفت بنیاد ظلم در جهان اولندکی بوده است. هر که آمد بر او مزیدی کرده تا به دین قایت رسید. حتی امام محمد غزالی که هیچ ارادتی به ایران پیش از اسلام ندارد و بسیار شریعت است در زمینه پایبندی شهریاران به برپایی و نگه داشته داد در ایران شهر می نویسد و بدان که کوشش آن پادشاهان قدیم به آبادان داشتن این جهان بود. از بهر آن که دانستند که هرچند آبادانی بیشتر ولایت ایشان بیشتر و رعیت ایشان به انبوهتر نیز دانستند که حکیمان جهان راست گفتهاند که دین به پادشاهی و پادشاهی به سپاه و سپاه به خاسته و خواسته به آبادانی و آبادانی به عدل است و به جور و ستم کردن همداستان نبودندی و از کسان خیش بیداد کردن روان نداشتندی، از آنکه میدانستندی که مردمان با جور و ستم پای ندارند و شهرها و جایها ویرون شود و مردمان بگریزند و به ولایت دیگران شوند و پادشاهی به نقصان افتد و دخل کم شود و گنج تویی شود و عیش بر مردمان تلخ و بیمزه گردد. برایند این جسار، فر کیانی را بر پایی آنچه در این بخش گفته شد، این گونه می توان تحلیل نمود. در زبان ای فر از سوی اهورا مزدا به افرادی ویژه داده می شود تا آنها را سزاوار رهبری مردم نماید. هنگامی که در موتون شرایط دریافت فر بررسی می گردد، آشکارا، گرد آمدن داد و خرد در فردی او را شایسته فرحمند بودن می کند، و به سان حقانیت فرمان برای دولت نیک و شهریاری نیک تعریف می گردد همچنان که فر بازاده شدن فرد همراه او زاده نمی شود اگر شخصی به دلیل گوهر و سرشت نیک و خرد اکتصابی خیش فرحمند گردید زمانتی برای جاوید بودن فر در رهبر وجود ندارد بنابراین دولت نیخواه و آبادگرد تا زمانی که برویه سازنده و دادگرانه خود ادامه دهد، دارای حقانیت حکومتی است و در صورت انحراف از مساله کشور و دادگستری، فاقد فرقیو نیست و نه تنها نباید از آن پیروی نمود، بلکه باید در کنار زدن آن کوشی شهریاری شاهی در ایران شهر چه جایگاهی داشت شاهنشاهی ایرانیان شیوه فرمانروایی در سرزمین گسترده ای بود با مردمی با زبانها و کیشهای گوناگون که به آرامی و در آرامش با نگهداشت گوناگونی خود ملت یگانه ای را تشکیل می‌دادند شاه در اندیشه سیاسی ایران شهری قانونی برای یک یکپارچگی ملت ضمن گوناگونی همه تیره‌های آن به شمار می‌آمد سامانه شاهی با فرمان روایی دادگرانه تادل ناپایدار تیره های ایرانی را به توازن پایدار یک ملت تبدیل می کرد. اکنون پرسش این است که آیا همانند خودکامگانی که در بیرون ایران شهر سر بر آسمان خدایان می سایدند و به هیچ کس و هیچ چیز پاسخگو نبودند می باید شهریاری ایران شهری هم به یک خودکامگی و استبداد تبیر شود؟ در ایران شهر یک پارچگی و همدلی ای از قبایل چادرنشین یا ایلات و یک یعنی شهرنشینان و روستایان شکل یافته بود. همگرایی هفت دودمان ریشهدار و با نفوذ ایرانی که برای سالیان سال شورای شاهی را تشکیل می‌دادند در برپایی و نگهداری این هماهنگی تأثیر نبود. هرودوت در کتاب تاریخ خود به رایزنی هفت سالار این قبایل پس از کشتن بردیای دروغین برای تعیین سرنوشت کشور و شکل حکومت اشاره می کند. این هفت دودمان همان هفت دودمانی که در درازای دوره اشکانیان و تا واپسین سالهای ساسانیان نیز بزرگان کشور به شمار می آمدند نبودند ولی سنت به شمار آوردن نظرات و آرای خاندانهای پرنفوذ کشور در تصمیمات بنیادین در همه آن 900 سال دوران اشکانیان و ساسانیان باقی ماند و در خیلی موارد در بزنگاه های تاریخی کمک حال کشور برای از سرگزناندن بحران ها شد برای توضیح چگونگی شکلگیری حکومت در تاریخ کوهن، نظریههایی توسط فلاسفه ارائه شدهاند. نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس و انگلز که در چین، مصر و تمدنهای شکل گرفته در میان رودان مانند سومر، بابل و آشور قابل ارائه باشد، درباره شاهنشاهی ایران کاربرد نداشت، بر پایه این نظریه از آمیختگی مالکیت زمین و حاکمیت سیاسی دولت آسیایی پدید می‌آید که تولید اقتصادی را پشتیبانی می‌نماید. این تئوری که توسط کارل ویتفوگل تکمیل گردید شکل گیری خودکامگی شرقی را نیاز آغازین مردم این سرزمین ها به نظارت بر پخش منابع آب مانند رودخانه ها چشمه ها و مدیریت آبیاری میداند حال آنکه در فلات ایران به دلیل وجود رودخانه های کم شمار و کم آب رواج کشت دیم و وجود قنات های محلی هیچگاه نیاز به پیدایش مالکیت برای مدیریت آب که زمین ساز رشد یک خودکامه در نقش فرما ایران زمین باشد، پیش نیامد. بنابراین شاهنشاهی ایران را نمیتوان بر پایه نظریه تولید آسیایی مارکس و انگلز برسی نمود. از استبداد شرقی نیز، از زمره نظریه های چگونگی حکومت ها به ویژه در خاورزمین زمین یاد می شود. از نظر مونتسکیو در جوام شرقی برخلاف جوامع غربی هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای فرمان روا وجود ندارد زیرا بنیاد پیوند فرمان بر و فرمان روا تنها بر ترس استوار است. همچنان که در برگه های در پیش خواهیم دید شاهی در ایران بر پایه نظریه استبداد شرقی نیز تبیین نمی شود. زیرا در سرشت جهانبینی ایران کوهن ترس پایه فرمانبرداری مردم از شهریار نبوده است نظریه استبداد شرقی آنچنان که خواهیم دید دوره اسلامی تاریخ ایران تقریبا از حکومت غزنویان تا جنبش مشروطیت را میتواند در برگیرد پس یک ضرورت آینی و یک ویژگی جهانبینی مردمان ایران زمین باید توضیح دهنده پیدایش شهریاری در ایران شهر بوده باشد. دیدگاه هگل فیلسوف نامدار آلمانی نیست که درباره ایران شهر ژرف نموده این بود که به هیچ روی شاهنشاهی برابر با خودکامگی تعریف نمی‌گردید. هیچ ارزش و فضیلتی به داد در نزد ایرانیان جذاب و ارجمند نبوده است. هگل برای تبیین سامان سیاسی ایران شهری و متمایز کردن آن از نگاه انیرانی به فلسفه چنگ انداخت. مفهوم شاهنشاهی ایرانی در نزد او مفهومی فلسفی است. و با فرایافت فرمانروایی حتی از گونه هندی و چینی همگونی و سنخیتی ندارد. اگر دولت را تحقق مادی دین در گیتی بدانیم که سرچشمه آن بینی فرزانگان کشور است، بر این پای شهریاری در ایران جلوه زمینی و گیتیایی سامان و هنجار مینوی هستی یا همان عشا بوده است. در اصر حخامنشیان، در هند و چین باستان هنوز مفهوم وحدت در کسرت ساخته نشده بود. هگل دریافتی از فلسفه زرتوشت را بنیاد اندیشه سیاسی ایران شهری می که در سایه آن مفهوم نظام شاهنشاهی به عنوان وحدت در کسرت سامانهای نوابسته ولی پیوسته به هم شکل میگیرد. گیرد. اصولاً خودکامگی و چیره بودن بر جان و روان انسانها و مالک اختیار زندگی آنها بودن نمیتوانست توانست آبشور ایران شهری داشته باشد. هنگامی که بر پایه سخن روشنی از جهانبینی زرتوش که در دین کرد آمده است بنیاد آفرینش و دهش پروردگار بر این اصل و است، که هر انسانی بر جان خیشتن شهریار است. این بینش نه تنها انسان را بنده زور مردان و دولت مردان و در بالای همه آنها شاه کشور نمی داند بلکه هر فردی را شهریار و فرمانروای جان و وجود خیشتن می داند. این چنین جهانبینی و نگرشی به انسان نمی تواند سرچشمه نظام سیاسی خودکامه و نکرپرور باشد. در فرهنگی که بزرگ کشور از آفریدگارش برای آفریدن شادی برای مردم سپاسگزاری میکند پیوند شاه و مردم را باید متفاوت با پیوند سلاطین خودرای و خودکامه دیگر سرزمینهای خاورمیانه و یا خاور دور با مردمشان دید در شاهنامه فردوسی بهرام گور را می ستاید چون در زمان شهریاری او مردم آسوده و دلخوش بودند حتی بهرام با آوردن شماری کلیان از هند به ایران که کارشان نوازندگی و پایکوبی دورگردانه بود ایرانیان را به شادزیستی و شادکامی ترقیب نمود بهرام گوری که فرمان داد بر روی سکه هایش نوشته شود مزداپرست پرست خدایگان بهرام شاهنشاه شادکننده کشور آفریدن شادی برای مردمان و آرزوی شادی و آسودگی آنان را داشتن هیچ رنگ و بویی از رفتار تحقیرآمیز خودکامگان با رعیت را به نمایش نمیگذارد سرشت و خمیرمایه پیوند میان شهریار و شهروند بسی متفاوت با رابطه ارباب و رعیت بوده است اندیشه سیاسی ایران شهری از فرهنگی برخواسته که رواداری یا تساهل و تصامخ از ستونهای استوار آن در روبرو شدن با دیگران بوده است، آن هم به عنوان یک اصل فلسفی در اخلاق ایران شهری نه همچون یک مسلحت اندیشی. از فضیلتهای برتر در فرهنگ ایرانی که منسوب به بهمنشاه می باشد، خودداری از سرکوب مخالف حتی در صورت داشتن قدرت می باشد. پذیرش سخن تند زیردستان با شکیبایی، وقاحتنداری و, و بخشاینده بودن در هنگام داشتن قدرت از دیگر سفارش‌های بهمن بودند. این گونه برخورد با دیگران از روی آفیات‌طلبی یا ترس نیست، سفارش به رواداری و خیشتنداری در اوج قدرت است و همین است که این کنش را ارزنده می‌کند. گزنفون یونانی از گفتگوی میان کوروش و مادرش یاد میکند که مادر به فرزندش میگوید که در دیار پارس خودکامگی برقرار نیست و دادگری که بر پایه برابری افراد در برابر قانون میباشد جاری است. مادر کوروش می افسایند که پدر کوروش فرمانروایی یا حق دولتی میدانست که دامنه قدرت آن هوس نیست بلکه قانون است. توصیفی که تاریخنگار سرشناس یونانی از شهریاری در جهانبینی ایرانی از زبان مادر کوروش را میدهد، روشنی با آنچه پیش از آن در بابل، آشور، مصر و چین دیده شده بود، بسیار متفاوت بود و آنچه پس از آن در دوره اسلامی زیر عنوان سلطنت در جریان بود، یک جهان فاصله داشت. بنابراین شاه در دوران ایران باستان حتی به عنوان دارنده جایگاهی بیرقیب در کشور دارای خودکامگی به معنی آنچه در نظریه سلطنت در آینده پدید آمد نبود. داریوش در سنگ نوشته خود در تخت جمشید بیزاری خیش از خودکامگی و دوری از هوا و هوس در فرمانروایی را این گونه بیان کرده است سخت بر هوس خود فرمانروا هستم مردی که همکاری می کند را به پاس همکاریش پاداش میدهم آنکه زیان میرساند را به خاطر زیانش کیفر میدهم دهم نمرا میل است که مردی زیان برساند و نمرا میل است که مردی زیان ببیند، نمرا میل است که اگر زیان رساند، کیفر نبیند. به زبانی دیگر داریوش در گرفتن تصمیمات کشوری و گذاری بر روی افراد و رفتارانها میار سنجش و ارزیابی خود را فراهم نمودن سامان گیتی و مینو یا عشا میدانست است. در همین راستا افلاتون داریوش را نه فرای قانون که قانون گذاری و دوراندیش می‌داند و درباره وی می نویسد. داریوش قانون گذاری بود که قوانین او شاهنشاهی ایران را تا زمان زندگی من از هر گونه گزندی مسحون و محفوظ نگاه داشته است. اردشیر پاپکان جمله‌ای نقض درباره واکنش دولت به خواسته های مردم دارد که هر گونه خودکامگی در گوهر اندیشه سیاسی ایران شهری را رد می‌نماید. پادشاه به جای اینکه با وعده دادن و یا غلظت نمودن در خاموش کردن مردم بکوشد، باید به دنبال اصلاح عیوب خیش باشد. وی مستی قدرت را بسیار ویرانگرتر از مستی و می و باده می هر چند سال بر شاهی شهریار افزوده گردد چهار خوی بزرگی، نیرومندی، برتری جویی و خودپسندی در او افزایش می آبند تا آنجا که او را به مستی شاهی گرفتار سازد و آفت آن از مستی شراب پرزورتر است عوج بلند نگری را باید در این سخنش دید. شاه باید برخیشتن جاسوسانی گمارد تا بتواند منش خود را پاکیزه کند. چون این کسی برزشتی های خیش پیش از مردم آگاه خواهد شد. بنیادگذار ساسانیان به روشنی دولت فرمان روا را نیازمند دستگاه بازرسی و سازمانی برای پیگیری تخلفات خودش میدانند. این دقیقا آن چیزی است که امروزه به عنوان مهار قدرت هیئت حاکمه و جلوگیری از گسترش بیحد و مرز آن در جهان مطرح است منوچهر پیشدادی در سخنان خیش با مردم به مقوله حق مردم بر فرمان روا می پردازد. حقی که در هیچ نظام خودکامهی جای ندارد، چه اصولا در این چنین نظامی انسان به عنوان رعیت فرمان روا فاقد حق و جایگاه حقوقی است. حق مردم بر شهریاران است که روزیشان به هنگام دهد. چه مردم را پشتوانهی و صدایی جز او نباشد؟ حق مردم بر شهریار آن است که در کارشان نیک بنگرد با ایشان مهر ورزد بیش از توان بارشان نکند اگر گرفتار شوند و بهرشان به آسیبی آسمانی یا زیانی زمینی کاستی پذیرد به همان اندازه از باج یا مالیات بکاهد و اگر به پیش آمدی خواسته از دست دهند یاری کند مردم را تا براباد کردن توانا شوند بر پایه اندیشه سیاسی ایران شهری است که بدین گونه مردم میتوانند داشت خدماتی از دولت را در ازای فرمانبری و پرداخت مالیات دارا باشند این به هیچ روی در حکومت های خودکامه و ستمگر پیشینه نداشته است اردشیر باپکان برای خود ولایتی بر نگزید ولی این روش را به گونه سنتی برای آیندگان نیز الزامی نکرد در این باره آن بزرگمرد مرد گزاره ای دارد که آشکارا نشانگر نبود خودکامگی در نزد بنیانگذار ساسانیان و زنده کننده ایران شهر است. او میگوید من نمی کنم که بر رأی ما ختم کنند که ما بر علم غیب واقف نیستیم و تواند بود روزگاری آید متفاوت رأی ما و صلاح در آن روزگار روی دیگر خواهد داشت. این نهایت آاد یک شاه مقتدر است که آرا و دیدگاه های خویش را جاری و ساری برای همه زمانها نمیدانند و تصمیمات اساسی هر دوره را بی خرد و تدبیر فرزانگان همان دوره می سپرد.تنصر رایزن او این چنین مطلب را پی میگیرد. ما چنان خواستیم که شاهنشاه در این رای، از جهانداران منفرد نباشد و نه اینکه با هیچ مخلوق مشورت نکند شهریار بر بنیاد جایگاهی که در آن بود میبایست صلاح کشور را در دستور کار خیش بگذارد و از خودکامگی و پیروی از گرایش‌های شخصی خودداری نماید اشک عشق اشکانی بدین جهت که کارکردش بر پایه هوا و هوس نباشد و برای اینکه در تصمیم گیری های روزانه اش از کام خود پیروی ننماید دو خبرگزار گمارده بود که یکی وظیفه داشت که شاه را کتبا از کارهای نیکی که باید انجام دهد آگاه سازد و دیگری باید یادآوری می نمود که کیفر دادن سرکشان را به یاد داشته باشد فرد نخستین همچنین می بایست که بپاید که مبادا پادشاه در حال خشم فرمانی بیدادگرانه و دور از انصاف بدهد و در هر زمانی بایستی شاه را به داد و نودوستی راهبری نماید فرمان روایی کشور که در پیکر شاه در اصر کهن جلوه گرمی شد دارای خیشکاری‌هایی بود که حتی با ملاک و میار امروزی نیز خردمندانه و پیشرو به چشم میآیند. جاهز تاریخنگار برجسته دوره اسلامی درباره نگاه ایرانیان به نقش شهریار در کشور و خیشکاری او در برابر ملت اینگونه می نویسد. نخست از پادشاهان ایران شروع می کنیم زیرا ایرانیان در رسوم و آداب بر سایرین سبقت و مزیت دارند و ما از قوانین مملکت داری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست مدنی و ملت پروری و برخورداری هر طبقه از طبقات مردم و حفظ منافع آنان و سیانت حدود هرانچه آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته و از آداب ایشان برخوردار شده ایم. سیاست مدنی، ملت پروری و حفظ منافع طبقات مردم، از جمله وظایفی هستند که بر دوش شاه ایران بودند ولی کمتر رد پایی از آنها در میان سلاطین دوره پسا اسلامی ایران دیده می شود. شهریار آرمانی در نگاه انصر ایرانی در پیش از اسلام که باید ملت پرور و نگهبان منافع کشور می بود در صده های پس از اسلام به خود ای افسار گسیخته قانون شکن و بی اخلاق بدل شد. اردشیر شیر در وصیت سیاسی خیش برای جانشینش سفارش مینماید که به کارگیری بازرسان پنهان و سازمان اطلاعات برای پیگیری وضع زندگی ملت و کارکرد مدیران کشور و استانها سبب می‌شود که پیش از مردم شاه از کاستی دولت آگاه شود و در پی درمان آن براید. پیشینیان ما گفتند خوشی مردم درست در ستودن شهریاران و خوشی شهریاران، درست در مهرورزیدن به مردم است. هر کس از شما بخواهد که شیوههایی برگزیند که از وی جز به نیکی یاد نکنند، چنین کند و هر که بخواهد تواند که چشمان خیش بگمارد تا در آگاهی بر های خیش از مردم کشور پیش افتد. مهرورزی شهریار به ملت یک ویژگی برجسته است که در دیگر نظام سیاسی رد پایی از آن نمی توان جست. ویژگی های یک فرمان پسندیده و شایسته در شاهنامه پرهیز از کجویی، پرهیزگاری، ناداوری، ماهار خشم و راستگویی است که از صفات یک خودکامه جهانی فاصله دارد. چو پرهیز کاری کند شهریار بر آساید از کینه و کارزار زناکردنی کار برتافتن به دل به اندوه و غم یافتن چه نیکو زدین داستان هوشیار که نیکوست پرهیز با شهریار ز یزدان بترسد که نیازد به کین و به گنداوری خرد را کند پادشاه بر هوا بدانگه که خشم آورد پادشاه روشن است که ویژگی شهریار شایسته صفات پسندیده و ارزش‌های های برجسته یک فرد اخلاقگره است که در جهانبینی ایرانی تصویر شده است. این ویژگی‌ها گرچه با نظریه افلاتونی حکومت آرمانی شاه فیلسوف پیوندی نمییابد ولی نظریه ایرانی شایستگی شاه فرزانه‌ها و یا شاه حکیم‌ها را جلوگر می سازد. سلطنت مطلقه در خود متون ایرانی بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است. جمشید پیشدادی که در آغاز آبادی و بیمرگی را برای مردم به همراه آورده بود در دام خودکامگی افتاد و حقانیت شهریاری را از دست داد. در بخش پنج کتاب نهم دین کرد درباره انحراف جمشید از راه یزدان این گونه نوشته شده است که جمشید به لذات دنیاوی حریز شد و به سلطنت مطلقه عشق وافر یافت و از طاعت اورمزد باز ایستاد. اینجا سلطنت مطلقه آن اندازه نکوهی و درزش دانسته شده است که به منظله سرکشی در برابر گزدان انگاشته شده است. در دوره کیانیان، کیکاووز هم به دلیل سبکسری و بیخردیاش گرفتار بحران مشروعیت شد و سرانجام کنار گردید. در بازگشت کیخسرو به ایران، کیکاووز را که ناشایستگی و خیرهسری خویش را چندین بار نشان داده بود از تخت شاهی برداشتند و دا پایان زندگیش در بازداشت نگه داشتند. خود کیخسرو در درباره فساد شاه این چنین می گوید. شاه به نمک ماند که تعام را پاکیزه سازد و تباهی از آن بزداید و چون نمک بگندد پاک ساختن آن پذیر نباشد. اردشیر پاپکان بنیانگذار ساسانیان در وسیتنامهٔ سیاسی خویش درباره پیوند شاه و مردم گزارهٔ زیبایی دارد که فاصله ژرف شهریاری در ایران با فرمانروایی معمول در خاور میانه و خاور نزدیک آن روزگاران را نشان میدهد بدانید که خوراک و پوشاک شاه باید همانند خوراک و پوشاک توده مردم باشد و سزد که بهرمندی شاه و مردم از خوردنی و پوشیدنی یکسان و شادمانیشان برابر باشد. برتری شاه بر توده در توانایی وی بر فراهم آوردن نیکی ها از تو جستن از بزرگی است و در این که هرگاه بخواهد نیکی تواند کرد و توده چونی نباشد. نگاه ظریف و زیبایی است که برتری شاه بر دیگران را در آن میبیند که شاه بیش از دیگر مردمان دستش برای نیکی کردن به کشور و مردمش باز است. در دنباله وی مسئولیت شهریار را در برابر مردم بالاتر از مسئولیت او نسبت به منافع خود می‌داند. پس شهریار باید نخوص برای یزدان سپس به سود مردم آنگاه برای خیشتن، کسی را به جانشینی خیش برگزیند. اردشیر همچنین میافزاید که مردم به هیچ روی ناچار به دوست داشتن آنچه فرمان را با دوست میدارد نیستند بدانید شهریاریتان از دو جای آسیب بیند یکی چیرگی دشمن و دیگری تباهی فرهنگتان تا هنگامی که شهریاران را بزرگ میدارید مرزهایتان از گزند بیگانگان و آینتان از چیرگی آینهای دیگر بر کنار ماند. بزرگ داشت شهریاران و پاس شکوهشان را داشتن در این نیست که با ایشان سخن نگویند یا کسب ایشان نزدیک نشود. دوست داشتنشان نیز به دوست داشتن آنچه ایشان دوست میدارند نیست. بزرگ داشت شهریاران در بزرگ داشت آین و خردشان و پاس شکوهشان در پاس داشتن از پایگاهی است که در نزد یزدان دارند، و از دوستیشان در دوست داشتن درستکاریشان و بازگفتن کارنیک ایشان است. پس عرجگزاری به شاه عرجگزاری به شخص وی نیست، به اندیشه و مرامی است که شاه را در جایگاه شهریاری قرار داده است، این جهانی فاصله دارد با نگاهی که مردم در آن وادار می شوند به سلطان و فرمانروای خودکامه احترام توعم با ترس بگذارند و ای جز پسندیدن آنچه رهبر مستبد میپسندد نداشته باشند سالبی جستار پیوند شاه و مردم را پی می گیرد و مینویسد که مهر جمشید به مردمش مانند مهر پدر به فرزند بود رفتار زحاک با مردم مانند فردی با هووی خود بود و فریدون با مردمش مانند برادر بود با برادر. افراسیاب به تورانی که بر ایران دست یافته بود با ایرانیان چون دشمن رفتار می نمود و گشتاسب با مردمش چون آموزگار بود با کودکان. پیوندهای فرمانروا و مردم که با کنار گذاشتن انیرانی ان یعنی زحاک و افراسیاب به گونه های پدرانه، برادرانه و آموزگارانه جلوگر شده است به هیچ روی نمیتواند به سرشت روابط فرد خودکامه و رعیت مفلوک و زیر ستم تبیر شود. پلوتارک، تاریخنگار یونانی که چندان نگاه دوستانه ای هم به ایرانیان ندارد درباره اردشیر دوم هخامنشی چنین میگوید: در آغاز پادشاهیش از او نیخوی اردشیر یکم پیدا بود هر کسی می توانست پیش او بیاید و به همه کس جوانمردی نموده از نوازش دریغ نمی ساخت. در کیفر دادن به گناه نیز دشنامی نداده کینه از خود نشان نمیداد هرچه به او داده میشد اگر چه بسیار بیارج بود با خوشرویی میگرفت. هنگامی که راه میرفت و کسانی هدیهایی پیش میآوردند کارگر بینوایی که به هیچی دسترس نداشت به جویی که در کنار راه بود دویده و دو دست خود را پر از آب ساخت و به عنوان پیشکش برای شاه آورد. شاه از این کار او چندان خورسند گردید که کاسی زرین و یک هزار دریک پول برای او فرستاد. این کردار نه تنها نمیتواند رفتار یک خودکامه مردم ستیز و سر باشد، بلکه نشانگر پیوند ژرف عاطفی و پرمهری میان شاه و ملتش بوده است، رفتارهای بسیاری از شاهان ایران پیش از اسلام به هیچ روی با کردار یک رهبر خداگونه و خودکامه که از همیهنان خیش جدا افتاده است همخانی ندارد. پلوتارک در بیان ویژگی‌های اردشیر دوم هخامنشی چنین سخن خود را پی می‌گیرد. اردشیر با آنکه رخت شاهانه در برداشته و سراپای او با زرین ابزار آراسته بود، که اگر قیمت می بیشک بیشتر از دوازده هزار تالنت می شد با این همه زیبرالات و با اون عنوان پادشاهی که داشت در غیرت و کوشش گامی از دیگران پس نمی گذاشت و همیشه ترکش از کمر آویخته و سپر بر دوش گرفته پیاده در پیشاپیش سپاهیان در آن فرازها و نشیبها راه می پیمود. همین غیرت و مردانگی او و چهره شادان و خندانی که همیشه داشت تو گویی به سپاهیان پروبال می‌بخشید و آن سفر سنگین را بر آنان چندان سبک گردانیده بود همانند تاریخ دانشگاهی در تاریخ حماسی ایران نیست شاه در پیشو پیش سپاه به پیشوازه خطر می‌رود و خودکامی نیست که به خوشگذرانی بنشیند و دیگران را راهی جانبازی نماید کیقوبات گرایش بسیار به آباد کردن داشت. ایران زمین را در برابر دشمنان پاسداری کرد و گنج های فراوان فراهم آورد. میان وی و ترکان جنگ های بسیار در گرفت. او در نزدیکی رود بلخ یا آمودریا ماندگار گشت تا ترکان را از دستندازی به کشورش باز دارد. برای آسوده ماندن ملت، شهریار ایران شهر زیستگاه خیش را به نزدیک مرز جابجا جا می کند تا در نخستین تک دشمن به کشور به پدافند از میهن بپردازد. این کردار شهریاری است که پدافند از کشور را خیشکاری خود میداند داند و نرفتار ای که ملت را سپر بلا می کند و خویشتن به کنجافیت پناه می برد. نکته چشمگیر دیگری که پندار خودکامگی شاهنشاهی ایران شهر را مردود میکند، رایزنی شاه با کارگزاران خیش در استانها برای تنظیم سیاستهای اقتصادی بود. هرچند که منابع به دست آمده از فروش فراورده‌های سرشار معدنی بخشی از درآمدهای دولت‌ها بوده است، ولی بخش چشمگیر خزانه از خراج دریافتی از فراورده های کشاورزی پر می‌شد. پلوتارک در کتاب اخلاق خیش در این باره نوشته و یادآور شده است که شاه پس از معین کردن منابع خراج رؤایای خیش کارگزاران خود در استانها را فرامی‌خواند و درباره این خراج ها از آنها پرسید که مبادا بیش از حد سنگین باشند چون آنها پاسخ میدادند که خراج ها سنگین هستند وی فرمان میداد که هر استان تنها نیمی از آن را بپردازند پرهیز از خودرایی و استبداد در کنش های دیگر فرمانروا مانند رایزنی با کارشناسان مسائل و سیاستهای سپاهی نیز نمود میافت. هنگامی که خشایارشاه آهنگ لشکرکشی به اروپا را نمود، شورای رازنی بزرگان را فراخواند تا آرای آنان را در این باره بشنود. اردوان اموی شاه با تصمیم شاه مخالفت کرد. خشایارشاه تا هنگامی که اردوان را قانع نکرد و شورای بزرگان را همراه نظر خیش نیافت دست به لشکرکشی به یونان نزد پانویس داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را ایجاد کرد و فهرست خراج همه نفایی را روشن نمود و این شیوه تدوین بودجه سالانه نخستین تدوین بودجه توسط دولت ها در تاریخ بوده است. منابع درآمدی اصر خامنشی برای تدوین بودجه عبارت بودند از مالیات، خراج، هدایای دریافتی، منافع حاصل از سرقفلی، اجاره دادن املاک ملی، عوارض گلهداری یا اجاره مراتع و آبخیز و منابع طبیعی و مالیات صنعتگری. در عمل دوری از خودرایی و خودمهوری بگونه انجام رایزنی با کارشناسان و فرزانگان سیاست های خارجی در نزد بخشی از شهریاران جلوگر می شد. نمونه اش واکنش انوشی روان به نام گستاخانه و بیشرمانه امپراتور روم است، پاسخ شاه انفجاری و از روی خشم فردی نیست راهکار شاهنشاه رایزنی گسترده با بزرگان و کارشناسان برای گرفتن تصمیمی درست است که صلاح کشور را در پی داشته باشد بیامد بر شاه ایران چو گرد سهنهای قیصر همه یاد کرد چو برخاند آن نام را شهریار برا شفت با گردش روزگار همه موبدان و ردان را بخاند و از آن نام چندی سخنرها براند. سه روز اندران بود با رایزن چه با پهلوانان لشتکر شکن. اندرزی از پیش پیشدادی در جاویدان خرد آمده است که آین رایزنی و همپرسگی را با راستندیشان شرط دورندیشی و خردمندی فرمان روا می داند. حکم این سخنان راست نمی شود الا به تدبیر سباب، و تدبیر سواب به هم نرسد الا به مشورت کردن و رای زدن و رای زدن باید با وزیران مخلص و ناسه باشد. بزرگ مهر حکیم به عنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان نظام اخلاقی ایران شهری به روشنی پادشاه را نه یک خودکامه که یک رهبر روشن رایونی و نیکندیش می هرگاه پادشاه رای خود را به جدیت بگیرد، و محکم شود که غیر از آن نمیکنم. هر آینه پوشیده و پنهان شود بر بروی آرای حق دانایان آیان و تدبیرات درست دیگران. ابن مسکوی رخدادی را از شاهی هرمز بازگو میکند کند که نشانگر اهمیت ایجاد آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی برای مردم از سوی شهریار است. راه گذر شاه و همراهانش از کنار بوستانها و تاکستانها می گذشت. از مهتران یکی به تاکستانی سرکشید، کشید، خوشه های قوره را آویزان دید. خوشههایی چند چید و به بنده خود داد و به وی گفت این قوره را به خانه ببر و با گوشت بپز و از آن خورشی بساز که در این هنگام سودمند است. لیک نگهبان تاکستان سر رسید و با وی در و فریاد کشید. ترس آن مهتر از کیفر هرموس چندان بود، که کمربند زرکوب خیش را از میان بک شد و به جای ای چند که از تاک اوچیده بود به وی داد تا شاید از کیفر هرمز برهد. شهریار ایرانی میباید در پیوند عاطفی و روانی با ملت خیش باشد و مردمش را در به آوردن نیک خویی و نیک اندیشی برانگیزد. در سخنان انوشی روان سفارش به ملت از فرمان سیاسی بسی فراتر رفته و پیکار با بیفرهنگی و بی اخلاقی از نبرد با روم و توران نیز مهمتر عنوان می شود. ای مردم، اینک که در ناز و رامش به سر می دیگر از پراکندگی و سرکشی و رشک آشکار و بدگویی و سخنچینی سخنی نشنوم که یزدان، خوی ما را و کشورداری ما را از این پلیدیها بپالوده و شهریاری ما را از آن برتر داشته است. ای مردم، آنچی از هم با درستی و پارسایی و شایستگی به ما ارزانی داشته ما را از آن چه بدین خویهای پستکننده پست کننده و بیشگون به آید بینیاز کرده است. پس مرا در این پیکار یار باشید و با خویشتن بجنگید که چیرگی بر دشمنان درون از چیرگی بر دشمنانی همچون توران و روم مرا خوشتر و شما را سودمندتر است. آنچه که امروزه توسط علوم اجتماعی و جامعه شناسی اثبات گشته است، در نزد نخبگان ایران شهر نیز روشن و آشکار بود. مردم در دراز مدت همانند فرمان روایان خود می شوند. فرمانروای روای و فاسد ملت را به زوال و پریشانی میکشاند همچنان که ابن مسکویه در حکمت های بهمنشاه مینویسد پادشاهان به اصلاح نفوذشان نیازمندترند چرا که اصلاح مردم وابسته به اصلاح پادشاهان است و فساد آنها وابسته به فساد پادشاهان است از این رو بیخردی و بیداد شاه و سیاه کاری دین نه تنها کشورداری و جهان آرایی را به زبال می کشاند بلکه مردم را نیز به آرامی به فروپاشی اخلاقی و فکری می اندازد. اج نهادن به زندگی و جان رعیت تنها سزاوار ایرانیان نیست و بلکه ویگانگان نیز باید از این فضیلت اخلاقی ایرانیان بهره برند تا جایی که سفارش کیخسرو درباره تورانیانی که اسیر ویند چنین است چنین گفت کیخسرو هوشمند که هر چیز که نیست ما را پسند نیاریم کس را همان بد بروی اگر چند باشد جگر کین جوی. بلند نگری وی در رواداری با دشمنان تا به آنجاست که نه تنها به تورانیانی که اسیر وی هستند امان می دهد و کین توزانه آنها را نمی آزارد بلکه راه برگشت آنان به سرزمینشان را باز می گذارد. نیم من به خون شما شست چنگ نگیرم چون این کار دشخار و تنگ همه یک سره در پناه منید وگرچند بدخواه گاه منید شاه آرمانی ایران شهری در اینجا حتی خود را پناهگاه بدخواهان و دشمنان میداند و در برابر پاسداشت جانانان تفاوت نیست در واپسین سال‌های ساسانیان رویداد دادگاهی نمودن خسرو پرویز نمونه تاریخی برجسته ای است که نشان می‌دهد همه از جمله شاه میباید پاسخگوی کارکرد خیش میبودند او که از چهرههایی در خاورزمین بود که به دلیل تجمع و شکوه دربارش از پهنه تاریخ به دامنه ادبیات و شعر فارسی و عرب هم راه یافت پس از به زندان افتادن توسط دادستان پایتخت به نام اسپاد گشسب و تفهیم اتهام شد بخشی از این کیور خواست که برای خسروپرویز خوانده شد به گزارش تبری چنین است بسیار کسان را به روزگاران دراز به زندانها بداشتی و در کار گرفتن خراج با همه رعیت بد کردی و با خشونت و سنگ دلی حرمت کسان ببردی و آن مال که به ستم از مردم بستدی برای خیشتن فراهم آوردی و مردم را به تباهی کشندی و خسارت افکندی و در مرز روم و دیگر مرزها سپاهیان فراوان بداشتی آنها را از خانه و خانواده دور نگه داشتی. برای پانزده سده پیش، روی کرد بزرگان کشور در دستگیری و کیفر دادن به بالاترین فرد کشور، آن هم با این کیفرخواست هوشمندانه و دادخواهانه ای که برایش فراهم گشته بود شگفتانگیز و غرورآفرین رافرین می نماید. این سرش اندیشه سیاسی ایران شهری بود که خودکامه شدن هیچ فرمان روایی را بر نمی‌تابید در نزد کسانی که خسرو پرویز را به کیفران رساندند و همچنین مردم آن روزگار فر از نزد او رخت بربسته بود و وی فاقد حقانیت برای شهریاری ایران شده بود برخلاف روزگار اسلامی تاریخ ایران شاه نمیباید به مال دیگران چشم می‌داشت او نمی توانست به ثروت زیر دستان دستندازی نماید، مالکیت خصوصی ارج داشت و شاه ای نبود که با زیاد خواهی خیش، امنیت مادی و روانی را از جامعه دریغ نماید. از این رو، انوشی روان در نامهای به فرزندش هرمز سفارش می کند؟ وگر زیر دستی بود گنج دار تو او را از آن گنج بیرنج دار. که چیز کسان دشمن گنج توست؟ بدانگن شو شاد که از رنج توست وگر زیر دستی شود مایدار همان شهریارش بود سایدار همی در پناه تو باید نشست اگر زیر دست است اگر برزده است فرمان ایران شهر باید دارای دانش می بود و کسی که بی دانش بود شایستگی بر تخت نشستن را نیز نداشت اینجاست که از زبان انوشی روان می خانیم؟ واقعیت آن است که معرفت به حقیقت و دانش والاترین چیزی است که شاه میتواند خود را با آن بیاراید و زیشترین چیز برای شاهان شرم داشتن از آموختن و از پژوهش در دانش هاست آن که نمی آموزد خردمند نیست باز می میبینیم که سر هر رشته به شرط خردمندی برای شهریار پیوند می خورن. چندین بار بخشیدن شورشیان و مدیان تاج و تخت از سوی شهریاران ایران باستان دیده شد که نه برای جهان آن روز مرسوم بود و نه بعدها در دوره سلاطین اسلامی ایران معمول شد، اردشیر دوم هخامنشی در هنگام تاجگذاری توسط برادرش مورد سوء قصد قرار گرفت. وی از این توته جان به در برد و در پی خاست مادرش پروشات از کیفر دادن برادرش گذشت کرد. همین اردشیر در رختادی دیگر یکی از شهربانان را که علیه او برپا خاسته بود ولی سپس پشیمان گشته بود را بخشید و کیفر نداد. حتی دوازده صده پس از فروپاشی ایران ساسانی و مدفون شدن اندیشه سیاسی ایران شهری در زیر قباره کشفهمی و فراموشی روشنندیش برجسته دوران ناصری میرزا فتلی آخونزاده در نامه ای که به همندیش خود جلال میرزا می نویسد توهی شدن جایگاه شاهی از درون مایه خود و زشتی مفهوم جایگزین آن یعنی سلطنت را به روشنی بیان می دارد. به اصطلاح اروپایی واژه پادشاه به کسی اطلاق می شود که تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکر تربیت و ترقی ملت باشد در مملکت ایران پس از غلبه تازیان و زوال دولت پارسیان سلطنت حقیقی نبوده است در مدت تاریخ هجری فرمان این مملکت کلن دیسپات، ستمگر، و شبیه حرامیان بودند. یکی دیگر از سرآمدان آن روزگار جامعه ایرانی که در کنار آخوندزاده از بنیانگزاران ناسیونالیسم عصر نو در ایران بود یعنی میرزا کرمانی نیز به روشنی دگرگونی سرشت فرایافت فرمانروایی در ایران و دگرسانی آن از شاه به سلطان را به گونه بیان می کند. از استیلای عرب بر برعجم که قانون پادشاهی فارس و نظام و فرهنگ از میان رفته تا امروز که هزار و دویست و هفتاد سال است، دو بند قانون مملکت و نظام شهریاری و قرار رعیت پروری از برای ایران نوشته نشده است و یا اگر نوشته شده موافق طبع و صلاح آن نبوده است. در کلیل و دمنه که در اصل اثری است هندی ولی به دلیل اعمال نگاه ایرانی در بازنویسی و برگردان آن از هندی به پهلوی و از پهلوی به عربی رنگ و بوی اعتقادی ایران ساسانی را به خود گرفته است شاه در گرانیگاه راهبری کشور جا دارد و پاسداره اشرا یا سامان و هنجار موجود در هستی میباشد ریش وی باید همراهی با نیروهای اهورایی برای نبرد پیوسته با بیداد و بیسامانی که اهریمنی هستند باشد وی باید به زیور حکمت، تدبیر و دلاوری آراسته باشد از آنجا که شاه آرمانی جانشین اهورامزدا در جهان است می باید دادگری یزدان را در منش و تدبیر او را در کنش برای ساماندهی گیتی پی بگیرد در متون کوهن ایرانی می توان از داد شهریاران در جلوه های چون دستگیری از دیدگان بخشایشگری و مهربانی به مردم یاد نمود. نمونه هایی همچون هوشنگ فریدون، کیقوباد، کیخسرو، کهیلو راسب در تاریخ استورهی و هماسی و دیاکو، کوروش، اردشیر پاپکان، شاپور یکم و دوم، هرموز یکم، بلاش و انوشی در تاریخ مدون سرشناس ترین آنها هستند. در همه تاریخ مدون پیش از اسلام ایران که به درازای دوازده صده بود، تنها سه دودمان ایرانی حخامنشی، اشکانی و ساسانی بر تخت نشستند در حالی که سلسله هایی که پس از اسلام بر ایران فرمان راندند عمدتا زمانهای کوتاهی در قدرت بودند و در خیلی موارد حتی همه ایران زمین را در زیر چیرگی خیش نداشتند با کمرنگ شدن فرایافت فرکیانی فر کیانی از ارج جایگاه شاهی کاسته شد و پیوندهای عاطفی میان ملت و نهاد پادشاهی سست گردید و از گونه پدر و فرزندی به گرگ و گوسفندی دگرسان شد در ایران پیش از اسلام با همه فراس‌ها و نشیب‌ها، توانمندی‌ها و کاستی ها شخص شاه به دلیل پیشینه تاج و تخت دودمانش و پیوندهای ژرف نیاکانش با مردم ناچار بود که نسبت به بزرگترین دغدغه ملت یعنی دادگری و آبادسازی بی تفاوت نباشد. شاه نمیخواست که با تبهکاری و بهره گرفتن نادرست از قدرتش یادگاری زشت در نزد مردمان به جا گذارد و اینگونه برای فرزند و جانشین خود بحران مشروعیت ایجاد نماید به دلیل پیوستگی و پایداری در دودمانهای شاهی در این دوره شاه انگیزه و فرصت آبادانی و توسعه را داشت و به گسترش بازرگانی و رونقی کشاورزی به میداد. فروپاشی ایران ساسانی و بر افتادن دودمانهای نجاده و ریشدار به بی ویژه با ورود تیره های زرد آسیای میانه یعنی ترکان، قدرت را در ایران زمین به چنگ گردنکشان و ماجراجویانی انداخت که هیچ پیوند ژرفی با ریت نداشتند و خود را اصلا ناچار به توجه به مسائلی چون دادگری و آبادانی نمیدیدند. در شرایطی که قبایل ترک و ترکمن غزنوی سلجوقی خوارزمی و مغولان ایل‌های قرقوینلو آق و ازبک یکی پس از دیگری وارد پشته یا فلات ایران می شدند و پس از چندی با تکیه بر نیروی سپاهی بر تخت سلطنت دست می نه ارجبههایی برای نهاد سلطنت می ماند و نه سلطان خیشتن را ملزم به رعایت هیچ اصل و ارزشی میدانست. همچنانکه همچنان که فردوسی به زیبایی و رسایی آن را این گونه بیان کرده است شود بنده بیهنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. به همین دلیل به صفویه که حکومتی فراگیر را پیریخته بود و از توبره تصوف و تشیع میخوردند همه این سلسله‌ها به دو یا سه نسل پایان میافتند روشن از سلطان و یا امیری که تردید داشت که تاج و تخت در خانوادهش باقی میماند یا نه از انجام بسیاری از طبخ و جنایت ها شرمی نداشت از این رو که هر گردنکش و سردار نیرومندی که توانه رزمی برانداختن حکومت را داشت با سرنگونی آن به تاج و تخت دست میافت و به هیچ رو بر برگرده مردم سوار میشد. واژه سلطنت جای واژه شاهی را گرفت. از آغاز صفویه هم که شاه اسمایل واجه شاه را دوباره به کار گرفت، این عنوان توهی از درون مایه ریشه خود بود و دلیل به کارگیری آن هم نیم نگاه صفویه به ایران باستان و یادمانهای کهان آن بود. در این نوشتار کوشش به محدود کردن اندیشه سیاسی ایران شهری به پدیده شهریاری نیست ولی همچنان که جواد تبا تبایی می نویسد، خشتوانه تکوین ملیت ایرانی اندیشه ایران است و نه نظام شاهنشاهی ولی واقعیت تاریخی ایران با اقوام متنوع و ضرورت حفظ وحدت سرزمینی آن ایجاب کرده است که ایرانیان و به ویژه وزیران که در دورههایی نمایندگان راستین تمدن و فرهنگ ایرانی بودند آن شیوه فرمان را حتی به اقوام مهاجر هم تحمیل همراهی دین و دولت در گذشته‌های دور دین نزدیکترین واژه به بار معنایی وجدان و یا اخلاق بود هرچند که با گذر زمان معنای دین از وجدان و یا اخلاق به کیش و مذهب گرایش یافت واژه دین ریشه ایرانی دارد و با دیدن هم ریشه است و در زبان سانسکریت در گاتها و در دیگر بخش‌های اوستا به گونه دائنا آمده است دین در گادها و همچنین در یشت های اوستا به معنای وجدان به کار رفته است در دین یشت میتوان خواند هووی پاک و دانا که خواستار زرتشت بود او را ستود تا در زندگی با او بهروز شود و دینی بیاندیشد دینی سخنگویت و دینی رفتار کند اینجا آشکارا همسر زرتشت هووی برای اندیشه، گفتار و رفتار وجدانی با زرتشت زندگی مشترک را آغاز نموده و روشن است که دین در این جمله بار معنایی کیش و مذهب نداشته است. زرتشت را نخستین کسی میدانیم که هستی را از دریچه اخلاق نگریست و معیارهای اخلاقی برای سنجش هستی و پدیده‌های آن تعیین نمود. نیچه زرتوش را نخستین آفریننده جهان اخلاقی که ما در آن زیست می نماییم آیین آین زرتوش آین مسئولیت پذیری برای انسان بود و طبیعتاً به دنبالش آین قائل شدن حقی که به دنبال مسئولیت همراه انسان می آید. زرتوش در جهان بینی خود که بر بنیاد نبرد نیکی با بدی استوار است، انسانی را میدید که در رویارویی همیشگی نیروهای نیکی و بدی، نظارگر و بیکاره نیست، بلکه میتواند با پیکار با های گیتیایی و مینوی، در بهتر ساختن جهان یاور اهورامزدا باشد. او سرچشمه این خیشکاری انسان در زندگی را دین می نامید. در بندهش درباره آفرینش گیتی آمده است که اهورا مزداد در ششمین مرحله از آفرینش کیومرث را آفرید که وظیفه این مرد دیندار از میان بردن اهریمن و دیوان بوده است اینجا وظیفه کیومرس خیشکاری دینی این نخستین انسان نبرد با اهریمنیان شناخته می شود از این وظیفه انسان دینی هیچ ردپایی از مذهب سازی و شریعت مداری آشکار نمی باشد. اخلاق در انسان در عنصر روان نمایانگر می شود. پروریدن روان همان نیک اخلاقی است. رسیدن همزمان به پرورش روان به همراه نگهداری از تن در متون کوهن سفارش شده است. بگونه ای که روان پرورش یافته آموخته است که به گرسنگان و درماندگان کمک کند و بیداری خرد پارسایان و نیک رفتاران باشد. روان؟ در برابر تنان گونه ترتیب یافته است که همچنان که تن را آرزوست که خوراک خورد و جامع پوشد، آن روان را آرزوست که به وسیله تن خوراک به گرسنگان و جامع به برهنگان دهد. همچنان که تن را آرزوست که در شبان روز بخوابد روان را نیز آرزوست که به وسیله تن شبان روز خرد پرهیزکاران را خواستار باشد. بار اخلاقی روان در این گزیده کتاب زادسپرم آشکار است. در جهانبینی ایرانی بیدینی به معنای زوال منش و اخلاق بود و زوال منش با خود فروپاشی کشور را به همراه می داشت. بنیادگذار ساسانیان به درستی به زوال اخلاق ایرانیان در عصر اسکندر اشاره می کند و گسست ایرانیان از همدیگر و گسیختن هنجارهای جامعه ایرانی را پیامد زوال اخلاق میداند. کاری که اسکندر در تباه ساختن کارمان و پراکند ساختن هم داستانیمان و ویران ساختن کشورمان کرد، برای آن چیزی که او آرزو داشت، سودمن بود تاریخ تن خون ما در یک گرد همایی پس از سخنرانی اردشیر بابکان برای گروهی از مردم یکی از باشندگان در بیان احوال ایرانیان در هنگام رسوخیز اردشیر این گونه داد سخن داد تو ما را پس از آن که پراکنده بودیم همدست ساختی و سخن سخنمان یکی کردی و دلهای من را که از کینه یکدیگر لبریز بود به هم پیوستی و آتش‌هایی که در میان ما زمان می‌کشید را خاموش ساختی این همدل شدن و همسو شدن ایرانیان در زیر چتر باوری که اردشیر و رای زنانش بر فراز ایران شهر گستراندند دیندار شدن جامعه ایرانی در آن روزگار معنا داد اکنون ببینیم منش و نظام ارزشی ایران شهری چگونه تعریف می شد. زبالاورنده منش از دیدگاه بزرگان این مرز و بوم جا افتادن دروغ البته در معنای گستردهتری از معنای امروزین آن در اخلاق فردی و نتیجتن در عرف اجتماعی بوده است. داریوش بزرگ به فرزند و جانیشینش خشایاشا می گوید تو که از این پس شاه خواهی بود؟ دوست مردی که دروغگو باشد و یا آنکه که تبهکار باشد مباش به سختی آنها را کیفرده ویژگی های زد اخلاقی مانند آز، نیاز، خشم، رشک و غیره در سراسر متون ادبی ما در داستان ها و گزارش ها مورد انزجار قرار گرفتند در یکی از متون کهن پهلوی آز به عنوان سپه ترسیم شده است که سرداران راست و چپ او گرسنگی و تشنگی هستند. این نمونه ها به روشنی بیانگر ویرانی و تباهی انسان در پی دنبال روی از بی اخلاقی همچون آز است. بدخویی و سیاه اندیشی ایرانی و انیرانی نمی شناسد و ناپسند و اهریمنی است. اردشیر پاپکان بی اخلاقی را سبب پریشانی و شکست کشور میداند زمانی که میگوید پیش از آن که با خویهای زشتی که در مردم خودتان است پیکار نمایید پیکارتان با ملت‌های دشمن نه از رهبری نیکو که از زیانکاری است چگونه میتوان با دل‌های ناهمداستان و دستانی که دشمن یکدیگرند به پیکار دشمنان شتافت از آغاز از ویژگی های آشکار اندیشه سیاسی ایران شهری اخلاقگرا بودن یا دینی بودن آن بود در این زمینه داریوش می گوید نواهی که میان آنها جنگ بود و همدیگر را می به یاری اهورا هر یک را من به جای خود نشاندم و آنها تصمیمات مرا اجرا کردند و دیگر هم دیگر را نکشتند، زیرا که نیرومند ناتوان را نمیزند و قارت نمی کند. پس هدف از شهریاری نیک یا اخلاقگرا پایه سامان و هنجاری برای آسایش شادی و همزیستی بوده است، نه ابزاری برای ایجاد خفقان و فرمان برداری. تاریخنگار نامدار یونانی استرابون میگوید که اسکندر در آرامگاه داریوش سنگ نوشته ای دید که فرمودان را به زبان یونانی برگردانند. این نوشتار از زبان داریوش چنین بود؟ من دوست دوستان خود بودم. اینجا نگاهی متفاوت با گفته آن سیاستمدار نامدار باخترزمین زمین می بینیم که می گفت ما فاقد دوست و دشمن هستیم. و دوستان و دشمنان ما را منافع ما تعیین می کنند. برخلاف سیاست بازان جهان کنونی و حتی جهان آن روز دوستان و دشمنان ما را تنها منافع ما معین نمی است پایبندی به اصولی که در همه زمانها ارزش اخلاقی به شمار می روند در مرام و منش بزرگان این سرزمین جای داشتهاند. این نیز در فرهنگ ایران شهری نگرش دینی به شمار می آمده است در راستای همین نگاه و مرام انسانی خیردمندانه و منصفانه به دوستان همراهان و همسنگران انوشیروان نیز در پشتیبانی از امیر عرب هیره که کارگزار و خادم ایران ساسانی برای چندین نصب بود به امپراتور روم که در پی نابودی حکومت هیره بود هشدار می‌دهد و ایران را اخلاقاً ناگوзир به پشتیبانی از اعراب هیره میداند توگر قیسری روم را مهتری، مکن بیش با تازیان داوری، وگر میش جویی ز چنگال گرگ، گمانی بود کج و رنجی بزرگ. وگر سوی منظر فرستی سپاه، نمانم به تو لشکر و تاج و گاه، توزان مرز یک رش مپیمای پای، چو خواهی که پیمان بماند به جای؟ وگر بگذریز این سخن نگذرم، سر سرگاه تو زیر پی بسپرم، درود خداوند دیهی مزور، بدان کونجویت به بیداد شور. در شاهنامه جایی که جنگ دراز ایرانیان و تورانیان برای کینخواهی سیاوش و یارانش به گامهای پایانیش نزدیک می شود و افراسیاب درمانده و فرسوده به کیخسرو پیشنهاد دریافت گنچهای توران به ازای گذشتن از پیگرد خیش را می دهد کیخسرو نمونه دیگری از رویکرد اخلاقی در اندیشه سیاسی ایران شهری را به نمایش می گذارد. بدان خواسته نیست ما را نیاز که از جور و بیدادی آید فراز که خسرو دارایی‌های افراسیاب را فراهم آمده از جور و بیداد وی بر مردمان میداند و بنابراین دریافتان اموال را نیز غیر اخلاقی می انگارد و نمیپذیرد پس در نگاه بزرگان این مرز و بوم اینکه ثروت از کجا و چگونه گردآوری شده در ارزشیابی آن و پاک یا ناپاک شمردنش ملاک بوده است این نگاه وجدانی در جهان آن روز که بسی ارزنده پیشرو و غیرمعمول بود برخواسته از دینی بودن یا اخلاقی بودن مقوله شهریاری و کشورداری در جهانبینی ایرانی بوده است. بیازاری شهریار و مهرورزی او به مردم به دلیل بزرگ داشتن انسان و ستایش نفس نیکی است. شهریار آرمانی ایرانیان در شاهنامه کیخسرو در مسیر راهش به توران سپاهیانش را از آزار و تهدید کشاورزان یا پیشبرانی که نمیخواهند رخت رزم بپوشند بر کنار میدارد تا نشان دهد حتی برای هدفی اخلاقی یعنی گرفتن کینه ایرانیان از بیدادگران تورانی کنش غیراخلاقی یعنی رعیت را به زور به میدان جنگ بردن را نکوهش می مینماید نیازورد باید کسی را به چون است آین تخت و کلاه. کشاورز گر مردم پیشور. کسی کو بلشکر نبندد کمر. نباید که تازد بر او باد سرد. مکوشید جز با کسی هم نبرد. نباید نمودن به بیرنج رنج که بر کس نماند سرای سپنج. دولت دینی یا دولت دیندار اکنون پس از بیان اخلاق گرابودن شهریاری در ایران به روی دیگر همراهی دین و دولت که به معنای امروزین دین یعنی کیش و آین نزدیک است میپردازیم اردشیر پاپکان بنیادگذار شاهنشاهی ساسانی این گفته نامی را دارد که دین و دولت برادر یکدیگرند و هیچ کدام از دیگری بینیاز نیست دین شالوده پادشاهی است و پادشاهی نگهبان دین است. هرچرا پایه نباشد از میان برود و هرچه نگهبان نداشته باشد تباه شود. بر پایه این باور ریشهدار در جهان بینی ایرانی، پیدایش دولت ساسانی در گزار از درون کنش ها و واکنش های پیچیده در درازای بیش از 500 سال روزگار سلوکیان یعنی جانشینان یونانی و مقدونی اسکندر و عشکانیان توجیه می شود، کیش زرتشتی دوران ساسانی که آمیخته ای از آیین زرتشت و بنی های باورهای کهن آریایی بر پایه برداشت ویژه موبدان نزدیک به اردشیر پاپکان بود دین مورد پشتیبانی حکومت گردید. پانویس 190 حتی خانش دولت ساسانی از آیین زرتشت و اندازه حضور باورهای کوهن ایرانی در آن در درازای چهار سده حکومت ساسانی یکسان نبود و با تغییراتی همراه بود اندیشه های یک پارچگی ایران شهر و پدافند از دین بهی یعنی کیش زرتشتی حکومت ساسانی که آبشخوران آینی نظام ساسانی بودند، نخستین حکومت ملی دینی جهان را پیافکند. ملیت و دینی که از یک آبشخور سیراب میشدند و خواستگاه آنها یک سرزمین و یک ملت بودند و بنابراین نرقی به یکدیگر که هم دوش و هماهنگ یکدیگر بودند در همین راستای پیوند دولت و دین ایرانی هنگامی که زرتوش به پیشگاه گشتاس می رود وی را از پرداختن باج به تورانیان باز میدار و باجرهی به دشمنان ایران را ضد ملی و زد دینی می داند. به شاه کیان گفت زرتشت پیر که در دین ما این نباشد حجیر که تو باج بدهی به سالار چین نه اندر خور دین ما باشدین نباشم بدین نیز همداستان که شاهان ما در درگه باستان به ترکان ندادی که از باج و ساو که او گشت بیدین و بیزور و تاو برخلاف برداشت برخی مفسران، در اندیشه سیاسی ایران شهری شاه تنها در پی این نبود که با قبض کردن نهاد دین قدرت خیش را استوارتر نماید و از فرمانبری مردم آسود خیال شود، از همان آغاز به قدرت رسیدن اردشیر پاپاکان وی از موبدانی چون تنسر و ابرسام برای یک دست کردن و تهوری نمودن آین زرتوش در راستای ایجاد یک سپر باوری نیرومند و یک پارچهگر ایران شهر بهره گرفت. کنشی از اردشیر به روشنی نشانگر آن است که به هیچ روی پشتیبانی چشمگیر او از آین زرتوش از روی تعصب و یکسونگری دینی نبوده است بلکه جرفتر از اینها همسو کردن مردم و توانمند کردن کشور با گسترش یک ایدئولوژی مشخص بوده است تنسر در پاسخ به گشانس فرمانروای تبرستان که شکوه کرده بود چرا اردشیر شیر برخی از آتشکده ها را خاموش کرده است؟ مینویسد دیگر دیگران چه یاد کردی که شاهنشاه آتش ها از آتشکده ها برگرفت و بکشت و نیست کرد و چون این دلیری هرگز در دین کسی نکرد پس از دارا ملوک و توایف هر یک برای خیش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که بی فرمان شاهان قدیم نهادند پیداست که در دوره اشکانیان با پشتیبانی دولتهای محلی در هر ناحیه یک خانش از دین مزدی پدید آمده و برکشیده شده و کیش چیره در آن ناحیه گشته بود. این نه تنها در فرایند یک پارچه کردن ایران شهرانی نیرومندسازی آن سودمند نبود بلکه مردم را در پراکندهی و سرگشتگی فکری و آینی با هم رقیب و چه بسا دشمن می ساخت. اگر اردشیر تنها به دنبال پشتیبانی از آتشکده ها و گسترش نفوز آنها بود میشد او را متاسبی دیندار از سرشت شاه اسماعیل صفوی دانست. ولی هواداری وی از آتشکده ها کاملا دار و به منظور یک پارچه کردن فضای باوری جامعه برای توانمند سازی آن بوده است. این گونه دریافت می شود که اردشیر و یارانش از دین بهی یک مکتب اجتماعی با سامان اعتقادی استواری ساختند که برای تا نزدیک چهار صده کارای خود را به نمایش گذاشت. در اصر كهن در مصر، سومر، بابل، چین و دیگر بخش های نسبتاً متمدن جهان راهبری جامعه با سلطان کاهنی بود که هم رهبری سیاسی سرزمین را دارا بود هم مدعی نمایندگی خدا بر روی زمین بود. در برخی جاها خود این سلطان کاهن به عنوان خدا پرستش می شود. در نگاه ایران شهری دین و دولت همزاد بودند ولی یکی نبودند. دو نهادی بودند که باید همراه و همدوش هم گیتی را می ولی از هم جدا بودند. هیچگاه در همه تاریخ ایران پیش از اسلام شاهی را نمیابیم که مدعی رهبری دینی هم شده باشد. داریوش در اوج اقتدارش به هنگام گسترش شاهنشاهی ایران و فراهم نمودن امنیت و آن گستره بزرگ ادعای بودن نداشت. و شاپور یکم ساسانی در اوج فرازش به هنگام شکست دادن پشت سر همه سه امپراتور روم خود را رو موبت نخواند. با اینکه دولت ساسانی دین زرتشتی را به عنوان چتر آینی و باوری کشور برکشید ولی دولت خود را پشتیبان همه شهروندان آن شاهنشاهی پهنابر میدانست و رهبری سیاسی که در دست شاه بود، کوشش در چیرشدن شدن بر نهاد دین، نکرد. در روزگار ساسانیان نیز، حتی اگر دولت دین اکثریت را به عنوان هنجار و عرف جامعه به عنوان بال مینوی و خواستگاه اندیشه ی خیش به همراه داشت، حقوق پایه دیگر شهروندان ایران شهر را از آنان دریغ نمینه مود. پیگرد مسیحیان در سده چهارم میلادی دلایل سیاسی داشت که در کتاب نشیبی دراز است پیش فراز به آن پرداخته هم. بدین گونه دولت ساسانی به هیچ روی نمیتوان دولت دینی نامیده شود ولی می آن را دولتی دیندار شناسایی نمود با اینکه خود اردشی از خانواده موبدان استخر فارس برخواسته بود سامان دادن به بال دینی کشور را به دیگران سپرد تا به سنت ایران شهری جدا بودن نهاد دین از نهاد دولت پایبند باشد در شاهنامه جمشید بران میشود که هنجار یکی نبودن دین و دولت را بشکند و همراه با تاج و تخت شاهی جایگاه موبدی را نیز از آن خیش کند منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی، بدان راز بد دست کتخ کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. فرکیانی از جمشید دور شد و ایرانیان او را رها کرده و از وحاک تازی را برای فرمانروایی به ایران فراخواندند، این سرانجام شاهی بود که به میثاق یکی نبودن نهادهای دین و دولت پشت کرده بود. در پهنه استورهی مکتب ایران شهری، سوشیانت تنها فردی است که چون در روز واپسین اهریمن را نابود کرده و رستاخیز را در گیتی انجام پذیر می‌سازد. دارنده هر و فر یعنی فر دینی و فر پادشاهی خواهد بود. بنابراین گرد آمدن رهبری دینی و دولتی در یک نهاد نه تنها سازگار با اندیشه ایران شهری نیست بلکه با باورهای بنیادین این مکتب نوهمخانی آشکاری دارد. اردشیر بابکان کسی که خود نظریه همراهی دین و دولت را به عنوان مرام دولت نوین پیریخت به روشنی میگوید گوید که دستگاه فرمانروایی به هیچ روی حق مهار و چیرگی بر باورهای قلبی مردم و دامنه زندگی خصوصی آنها را ندارد و تنها بر تن مردمان در کشور فرمان می راند. حکومت و سلطنت ملوک دنیا نیست، مگر بر بدنها و ظاهر امور رعیت بنابراین بر پادشاهان سزاوار نیست که رعیت را جز آن چه آشکاره است از احوال ایشان معاخذ کنند پس دولت به هیچ روی حق دخالت در زندگی خصوصی مردم و جستجو در امور آنان برای مطمئن شدن از دینی بودن آنها و یا وفادار بودن آنها به حکومت را نداشت تنها میار برای ارزیابی افراد کارنامه اجتماعی آنان بود از دیدگاه یک متن دینی زرتشتی دولت دیندار این گونه تصویر گشته است بنا به آموزش دین همچنان که خیشکاری شاهان است تا فرمان روایی و چیرگی ان ایرانیان و دشمنان و گجستگان را از کشور دور دارد باید مردمان خیش را نیز از بینوایی، نگرانی، نیاز، بیماری و کاستی های تنی برهاند. آشکارا هرانچه از وظایف دولت دیندار در این متن آمده از وظایف یک دولت دلسوز ملی در روزگار کنونی می باشد. آنچه در اینجا اصلا مورد نظر قرار ندارد، نقش شریعت مهور دولت است. همراهی میان دین و دولت در بیشتر دوره ساسانی به شکل دین رسمی نمودیافته است و نه دین دولتی. تفاوت چشمگیری است میان دین رسمی و دین دولتی. دین رسمی میتواند در رواداری با دیگر های موجود در کشور باشد و کوششی برای از میان بردن آنها ننماید. پانویس 196 سخگیری بر مسیحیان در حد فاصل میان شاهی بهرام یکم و گزدگرد یکم واکنش حکومت نفوذ معنوی روم شرقی در ایران با گیری از مسیحیت بود. سرکوب مزدکیان نیز پس از سالهای همزیستی و رواداری پیامد از همپاشیدگی جامعه و زوال رکن خانواده در کشور بود، تاریخ نگار ارمنی سده پنجم میلادی الیزه وارداپت از فرماننامه یاد میکند که مربوط به شاپور است و در آن دستور داده شده که مقها یهودیها، پیروان مانی و هواداران همه کیشهای دیگر را در هر نقطه از ایران که باشند آزاد بگذارند و جلوی انجام مراسم دینی آنها را نگیرند در دوران شاپور دوم ایرانیان یهودی با دادن وامهای کلان به دولت ساسانی در جنگهای ایرانیان بر ضد رومیان همراهی و سرمایه گذاری هم میکردند و این خردمندانه جلوه نمی کند مگر اینکه غیر زرتشتیان ایرانی مانند یهودیان دولت ساسانی را بیش از یک دولت صرفا دینی شناختند. در صده چهارم برادر شاپور یکم پیروز که استاندار خراسان بود سکه هایی ضرب کرده بود که بر روی آن نه تنها اهورام که خدای بودا هم ستایش شده بود. این چه به منزله بودایی شدن برادر شاه و چه از روی بزرگمنشی بی برای ارج گذاشتن به همیهنان بوداییش باشد فرضیه وجود دین دولتی و نه دین رسمی در اینا شهر را رد می نماید. در همین زمینه، در پایان سده ششم، هرمز چهارم در پاسخ به برخی هیربودان بودان که خواهان سخت گیری بر مسیحیان شده بودند، گفت همچنان که تخت پادشاهی ما تنها بر دو پایه پیشین و بی دو پایه پسین نیستد، پادشاهی ما نیز با تباه ساختن ترسایان و پیروان کیشهای دیگر استوار و پایدار نباشد. پس دست از ترسایان کودا کنید و به کارهای نیک روی آورید تا ترسایان و پیروان دیگر آن را ببینند و شما را بر بران بستایند و از جان هواخواه کیش شما باشند. زمانی که دین دولتی در کشوری پدیدار می شود وابستگی مالی روحانیان آن دین به دولت نیز پیش میآید. چه بسا حقوق و درآمد دستگاه دینی هم توسط دولت پرداخت میگردد در ایران ساسانی آتشکده ها استقلال مالی از دولت داشتند و از دهشمندی مردم اداره می شدند. بنابراین هیربودان حقوق بگیران دولت نبودند و از این دیدگاه نیز کیش زرتشتی گرچه دین رسمی بود ولی دین دولتی به شمار نمی رفت. همچنین دین رسمی الزامن روحانیان خود را در عریک قدرت سیاسی جای نمی نهد و آنها را دارای منصب نمی کند. پانویس دویست جای گرفتن موبدان در مقام داوری در نیروی دادگستری کار حکومتی شمرده نمیشد. چه اصولاً در اعته باستان رسیدگی به دعواهای حقوقی میان پیروان یک دین بر دوش روحانیان آن دین بود همچنان که دعواهای یهودیان و مسیحیان نیز توسط بزرگان آنها حل و فصل میشد. روحانیان دین دولتی نه تنها در دستگاه های حکومتی دارای جایگاه می شوند، بلکه نیازمند بودجه دولتی نیز می گردند. بنابراین ارباب دین حقوق بگیران دولت می باشند. دین رسمی می تواند در پاره ای از تاریخ کشور به یک پارچگی و توان ملت بیافزاید، ولی دین دولتی با کوشش برای تولید انسان های یکسان و یکجور تبعیضات و ستمهایی را پدید می آورد که بیشتر به کینه و دشمنی در میان مردم می انجامد تا همبستگی و همدلی دین دولتی فضا را برای پیروان دیگر دین ها تنگ می کند و به شدت موضوع خودی و غیرخودی را در کشور پیش می کشد در حالی که در ایران حقومنشی و اشکانی گرایشی به برکشیدن دین ویژه ای به عنوان دین رسمی دیده نمی شود، در ایران ساسانی دین رسمی با کیش زرتشتی تعریف می شود و تا بایان ایران ساسانی به جز دوره استثنائی کوتاهی این دین رسمی دین دولتی نمیگردد. افزون بر بهره گرفتن دولت از دین برای پیریختن یک ایدولوژی نیرومند برای بیمه کردن کشور در برابر آفندهای بیگانگان و دشمنان، چه حجوم فرهنگی و چه یورش نظامی بهره حوشمندانه دیگری در همراهی دولت و دین برای فرمان با وجود داشت. برای دولت نگه‌داشتن دین در کنارش این سود را داشت که دین سالاران بیرون از دستگاه دولت توانستند با برانگیختن احساسات دینی مردم آشوبی در کشور برپا کنند خود اردشی که پرچمدار همزادی دین و دولت است می گفت بدانید بیمناکترین گزندها که بر شما رسد نیرنگ دینی است شاه نباید بگذارد تا زاهدان و نیایشکاران و گوشگیران بیش از او هوا دین نمایان شوند و نگهدار آن جلوه کنند. نگاه پخته یردشیر به کارایی های سازنده و ویرانگر دین در جامعه چان را بپسندیم و چان را نعف نماییم در زمان خودش بسیار سنجیده بوده و از آگاهی او و یارانش به روحیات جوامع انسانی به ویژه جوامع شرقی نشان دارد. اردشیر با دورندیشی و ژرفنگری مانندی دین را ابزار نیرومند دشمنان دولت برای آسیب زدن و سرنگون کردن شهریاری می داند. هر که آرزو دارد بر شهریار گزندی رساند برای رسیدن به این آرزو پلکانی کوتاهتر و بسیار پیروفدارتر و خللناپذیرتر ناپذیرتر و در مغز مردم رخت کننده تر از دین نیابد. در دین کرد این نکته نیز گوش زد می شود که همچنان که دین در کنار دولت بال مورد نیاز کشور برای پرواز انگاشته می فساد روحانیان و کجنجیشی آنان نیز زوال دهنده و تباه کننده مردم قلم داد می شود. دیگر نشانه تباه کننده کشور روحانیان نسنجید و گفتار باشند. یعنی که چیزی از روی دانایی نگویند. از این رو باشد که کسانی که راست نمیگویند به این روحانیان میگروند آنان تباه کننده کشورند و بدان سبب زوال دهنده خاندان و آبادی و شهر و کشور و همه سرزمینها. به هر روی آن پیامد آموزشی است که از تباه کننده کشور رسد. مرد بینای فرزانه با نگاهی که دارد کشور را چنانچه در منش اوست آگاه میسازد. از سوی دیگر بنیادهای مالی که در اختیار آتشکده ها بودند، از سوی همه مردم به ویژه توانگران پشتیبانی میشد، و ورمقانهایی دریافت می نمودند. شاهان ساسانیم بارها از غنایم جنگی به آتشکده ها دهشمندی نمودند تا در کوشش های نیکوکارانه از آنها بهره گرفته شود. اردشیر باپکان، پس از شکست دادن اردوان چهارم گنج‌های وی را به آتشکده‌ها بخشید همچنین بهرام گور پس از شکست دادن خاقان ترک گنج‌های وی و غنایم ارزنده ای را با آتشکده‌ها پیشکش نمود آتشکده‌ها از این دارایی‌ها به نیازمندان وام بی برگشت می‌دادند و همچنین برای آباد کردن زمین‌های بایر به کشاورزان پول می‌دادند آتشکده منابع طبیعی مانند جنگل ها را از مالکان که خیال فروش چوب آنها را داشتند خریداری می کردند تا به جنگل ها آسیب و گزندی نرسد و درختان آنها بریده نشود و از دارایی های ها برای باز خریدن اسیران جنگی ایرانی از دشمن و بازگرداندن آنان به میهن نیز بهره گرفته می شود. در مجموع بیشتر دارایی آتشکده ها در راستای تأمین اشتماعی و رفاه شهروندان به کار گرفته میشد که چیزی برابر با خدمات بهزیستی و صندوق های کمک به نیازمندان در امروز روز می باشد. خیر یا نیک خواهی همگانی؟ یونانیان در صده های پنجم تا سوم پیش از میلاد حقوق سیاسی فرد را تعریف نمودند و به آن بها دادند هرچند که همه افراد در گروه حقداران سیاسی گنجانده نشدند زیرا زنان، بردگان و توهیدستان سزاوار دارندگی این حقوق نبودند در آتن تنها مردان آزاد و دارای سرمایه یعنی دست کم یک خانه حق ری داشتند زنان یونانی جمعیت بردگان و آنانی که در آتن زاده نشده بودند شهروند به شمار نمی آمدند و نمی توانستند دهند در آن دسته از دولت شهرهای یونانی که دموکراتیک اداره می شدند، از آنجایی که همه افراد حق ری نداشتند می توان پی برد که حقوق سیاسی آبش خورش حق انسان نبود. در حقیقت بر بنیاد یک قرارداد اجتماعی مردان آزاد و دارای ملک در تصمیم گیری های عمومی شرکت میکردند و رأی زنی می نمودند. در برابرش نگاه ایرانیان به حق انسان را میتوان در گاتهای زرتشت دید. پس بهترین گفته ها را با گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید. سپس هر مرد و زن از شما برای خود از یکی از این دو نیکی و بدی راهی را برگزیند، گوهر این نگاه متفاوت با نگاه آتنی بود در ایران برای انسان به خاطر انسان بودنش حق طبیعی قائل می شدند. از این رو همه مردان و زنان در گزاره بالا گنجانده شدند ولی در آتن چون انسان با شدن شدنش سزاوار حقوق طبیعی انگاشته نمیشد با یک قرارداد اجتماعی تنها بخشی از جامعه یعنی مردان آزاد دارای سرمایه دارای حق گزینش شدند اگر انسان تنها به دلیل انسان بودنش سزاوار به گزینش راه و روش زندگی خیش می بود دیگر نباید تفاوتی میان مردان آزاد دارای سرمایه و زنان و مردان غیر آزاد و یا مردان غیر مالک می بود پس حق گزینش انسان در نگاه ایران شهری از حقوق طبیعی به شمار می آمد. در حالی که در نگاه آتنی حق گزینش زیر مجموعه قوانین موضوعه و بنابراین یک قرارداد اجتماعی به شمار می رفت. ایرانیان موضوع مسئولیت فرد را پیش کشیدند و آن را به عنوان نگرانی اصلی جهانبینی ایرانی برجسته کردند. زرتشت نه تنها آدمیان را مسئول بهروزی و رستگاری خودشان میدانست بلکه آنها را یاوران مزدا در شکست دادن اهریمن و نیروهای بد و زیانبار میشمرد. فراموش نمی کنیم که همیشه همراه مسئولیت حقی هم ایجاد می شود، نمی شود به کسی مسئولیت داد بدون آنکه حقی برایش در انجام کارش بایل شد. ایرانیان با مختاردانستن انسان برای گزینش میان نیک و بد او را تا همدستی و همیاری کانون هستی یعنی اهورامزدا گرامی داشتند. این خیشکاری انسان در برابر خود و جهانی که در آن میزیست اهمیت مصالح جامعه و گیتی که به باور زرتشت آباد کردن آن بزرگترین نیکی بود را به همراه داشت. در حالی که رقیبان فرهنگی ما یونانیان نگرانی حقوق فرد و شناسی فردی را در جامعه داشتند و به آن بها میدادند در جهانبینی ایرانی جامعه و مسالح آن در جایگاه نخست اهمیت بود انصر ایرانی همچنین به نگهداشت حقوق ردههای گوناگون اجتماعی حساسیت داشت و این حقوق را پیوسته بازشناسی مینمود نگاه هلنیستی در بررسی مناسبات فرد و اجتماع به دادن اصالت به فرد تعبیر شد هرچند بزرگانی چون افلاطون نیز فرد را مهمتر از اجتماع نمیدانستند و بر فرد سالاری آتنی نقدهای تندی وارد میکردند در برابر نگاه آتنی که اصالت را به فرد میداد نگاه ایرانی به جامعه و مسلحت آن برتری میداد چندین سده بعد رویارویی این دو نگاه به مکاتب نوین فلسفی و سیاسی اروپایی هم رسید و در سده 20 گرانیگاه بسیاری از جستارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردید. تکیه بر اراده عمومی که شرط لازم و کافی برای گرفتن حقانیت فرمانروایی در نزد یونانیان بود، در دموکراسی نوین در باختر زمین گرانیگاه اندیشه سیاسی شد. البته همچنان که گفته شد این عموم در یونان چندان فراگیر نبود و محدود به مردان دارای سرمایه میشد. ولی در اصر نوین به آرامی مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت را در شکل حق حضور در همه پرسی ها یافتند. در نزد فرزانگان ایرانی به جای اراده عمومی این خیره همگانی بود که ملاک و معیار ارزیابی فرمانروایی میگردید می گردید. حقانیت شهریار برای فرمانروایی از کوشش او برای صلاح کشور و نیخواهی مردمان، دیگر جانداران و زیست آن ریشه می گرفت. بنابراین در حالی که برای جهانبینی یونانی، دلواپسی اندیشه سیاسی، فرایند گزینش فرمان روا بود، در نگاه ایرانی پیامد و فراورده کار نهاد شهریایی، پایه داوری درباره آن بود و چگونگی به قدرت رسیدنش فرع مسئله بود. پانویس زحاک با اراده عمومی به تاج و تخت ایران رسیده بود و اهریمنی از آب درآمد. کیخباد با وجود مخالفت بیشتر بزرگان و با سفارش کیخسرو به شاهی رسید و فرهمندی از خود نشان داد. در هر دو مورد اراده عمومی اشتباه کرده بود. این ویژهی برجسته اندیشه سیاسی ایران شهری یعنی نیکخواهی همگانی بود که مسلحت کنونی همگان یعنی انسانها، جانداران و زیستموم و دوراندیشی برای آیندگان را در خود می گنجاند، حتی افلاتون هم در رساله قوانین خود شهریاری کروش بزرگ و داریوش بزرگ را ناظر بر مصالح همگان می دانست و بنابراین آن را فرمان پسندیده و آرمانی میدید. پس از افلاتون در کارهای عرستو نگرش بیشتری به مسلحت عمومی شد که نشانگر رسوخ اندیشه سیاسی ایرانی در مکتب یونانی سیاست ورزی در آن روزگار می باشد. پانویس، ارسطو فراهم کردن مسلحت عمومی را با ذابطه شمار فرمان روایان توام می آورد و نظام سیاسی درست را بیشتر از آنکه از مجرای شمار فرمان تعریف کند بر پایه مسلحت عمومی می شناسد که اگر فرمان یگانه همه یا گروهی از مردم مسلحت عمومی را برتر از سود شخصی بدانند نظام حکومتی درست خواهد بود هرچند که این نظام سیاسی صورت حکومت پادشاهی، اشرافی یا جمهوری به خود گرفته باشد. اگر سود شخصی برتر از مسلحت عمومی نشانده شود، حتی اگر مانند حکومت جمهوری بیشتر مردم فرمان روا باشند، نظام سیاسی منحرف خواهد بود. به نقل از جواد تباتبایی. این ویژگی نگاه انصار ایرانی یعنی برتری دادن به نیک‌خواهی همگانی در سده نوزده از سوی اروپایان نیز گرانیگاه اندیشه سیاسی نوین شد. شهروندان در پایان فرایند تشکیل دولت ملت یا نیشن ستیت به مرحله‌ای رسیدند که مساله کشور را به عنوان برترین خیر می و سوی وفاداری برای آنان از سازمان مذهبی و یا ایل و قبیله به سوی کشور چرخید و منافع ملی ایار سنجش و ارزیابی کار کرده دولت گردید تفاوت چشمگیر دیگر میان اندیشه سیاسی آتنی بر پایه‌ی اراده عمومی که امروزه با دموکراسی غربی یا همان مردم سالاری شناسایی میشود و اندیشه سیاسی ایران شهری بر بنیاد نیک‌خواهی همگانی که میتوان آن را میهن سالاری نیز نامید در کاربری دو واجه عمومی و همگانی است در دموکراسی اراده اکثریت که میتواند حتی پنجاه و یک درصد جامعه باشد در تصمیم گیری های کلان و در تعیین رهبران کشور ملاک است ولی در اندیشه سیاسی ایران شهری همگان به جای عموم یا اکثریت مد نظر هستند. مصلحت کشور و نخواهی همگان و حتی نسل های آینده ملت در دستور کار فرزانگان و خردمندان سرزمینمان بود. در اینجا دیگر قرار نبود یک اکثریت برنده و یک اقلیت بازنده در صحنه پدیدا دایند. در نمود اراده عمومی، گاهی حتی جلوگری عموم با داشتن اکثریت جامعه نیز همراه نبود. ما آماری در دست نداریم که در انقلاب فرانسه و یا انقلاب اسلامی ایران چند درصد، مثلا سی درصد و یا هفتاد درصد مردم برای سرنگونی حکومت به خیابان ها آمدن. آنچه آشکار بود، حضور آن دست از مردم فعال در صحنه بود که اراده آنان را به گونه ای اراده عمومی جلوه گرنه مود. کیخسرو شهریار آرمانی در اندیشه سیاسی ایران شهری به لهراست میگوید که از پیشینیان چونید به ما رسیده است که شاهان گذشته را خدایگان می نامیدند. از آن رو که در کارشان دادگری بود و مسلحت گذاری، هر که برازنده این نام است، بایست که در کارهای مردم که به دست اوست به شیوه خدایی چاره ساز کند. اینجا به روشنی صلاح کشور و مصلحت مردم در کنار داد به عنوان بنیادی ترین ملاحظات فرمانروایی و سرپرستی کشور مطرح شده اند. در پیوند با جای دادن سلاح کشور در نخستین ردیف فعولویت های سیاسی و اجتماعی تحمورس پیشدادی میگوید همه کوشش های خود را در آنچه شما را به مصلحت و رستگاری برساند به کار خواهم گرفت. رفاه به شما روی خواهد آورد و داد و نیکویی در میان شما گسترده خواهد شد. در پیشینه سرآمدان اندیشه سیاسی در ایران شهر مانند تنصر به روشنی برتری دادن مسلحت کشور بر هر ملاحظه دیگری را میتوان دید. در این پیوند در نامه تنصر به پادشاه مازندران که در آن آرماننامه سیاسی نظام نوپای ساسانی بیان گشته است اصالت دادن بندیشه ای ایران شهری به صلاح کشور و نیکخواهی همگانی به روشنی بیان گشته است. شاه نباید به گمان ستم کاری از کاری که به صلاح همگان است چشم بپوشد زیرا اگر ستم بر برخی از رعایا برای اصلاح باقی مردم و برای پاییدن شهریار و زیردستان دستان از تباهی و فساد باشد به هیچ کار نباید چندان شتاب کرد که به آن ستم. یعنی نیک خواهی همگانی در دراز مدت می تواند در گروه دست دادن به اقدامات تند و کننده در کوتاه مدت باشد. برای نگهداشت تندرستی ایمنی و منافع همگان دولت اگر ناچار شود باید شماری از مردم را که موجب فساد و زوال میشوند سرکوب نماید در این باره ادشیر پاپکان جمله اندیشه برانگیزی دارد شاه نباید بگوید که از بکار بردن زور بیم دارم کسی از بکار بردن زور بیم دارد که از بکار بردن زور به زیان خیش همی ترسد بکار بردن زور در باره دسته ای از مردم در چنین حالی به مسلحت باقی ملت است در این دو سفارش به مانده از تنسر و اردشیر نگاه برتری منافع و حقوق جامعه به منافع و حقوق فردی یا گروهی بسیار چشمگیر است اردشیر به کارگیری مقطعی مشت آهنین بر علیه سرکشان و گناهکاران را برای نگهداشت داشت دراز مدت کشور به جانشینانش سفارش می نماید. بدانید که شهریار را جز به رهبری درست بزرگ ندارند. برترین رهبری گشودن دو در در برابر مردم است. یکی در دلسوزی و مهروف و, و بخشندگی و دوستی کردن، و نواختن و دلجویی و نزدیکی و خوشرویی و چشپوشی و گشاده و گشاده دلی و دیگری در تندی و بیم دادن و آزردن و پافشاری و سختگیری و دور کردن و راندن و دشمنی و بازداشتن و غیره بر ابرو افکندن و ترشرویی و تنگ گرفتن و کیفر دادن و کوچک کردن تا به کشتن رسد بدانید که من از این دو در یکی را در مهر و دیگری را در خشم ننامیدم، هر دو را در مهر مینامم. هم او در بخشی دیگر از وصیت سیاسی خیش به از میان بردن فساد و فتنه در مردم حتی به بهای نابود کردن گروهی که سرچشمه تباهی هستند سفارش میکند. بدانید، هر فرمان روایی که به نیکو راه بردن زیر دستان سخت دل بسته است، گاهی برخی از ایشان را تباه سازد و از روی مهر ورزی گاهی سخت گیری نماید و چون جان مردمش را دوست دارد کسانی را میکشد کشد همزمان مهر و ترس در دل مردم دادن پیام های از سوی شهریار به ایرانیان نبود پایه و بنیاد بر مهر بود مگر شرایط ویژه‌ای آن روی دیگر سکه را که مشت آهنین بود نمایان میساخت مشت آهنینی که تنها برای نگهداشت صلاح ملک و ملت ناگزیر مینمود. تن کردار اردشیر درباره مردم را بر پایه نمونه مادر و پزشک توجیه کند. مادر با فرزندش مهربان است و درد و رنج او را نمیتواند ببیند ولی به خاطر تجویز پزشک آماده است تا داروی تلخ و بدمزه به فرزندش به زور بخوراند. سرانجام فرزند به تندرستی و آسایش می رسد و مادر بر پزشک آفرین میگوید. گوید. نیز بر این منوال ناچار از سختگیری بر برخی مردم است چون نیکخواه آنان است و در دراز مدت این سختگیری به سود ملت خواهد بود. آشکار است که آرزو و خاست نیکی برای همگان عرج انسان را نیز در خود داشت. برای نمونه در سالهای آغازین ساسانیان قصاص با جریمه مالی جایگزین گردید تا از خار کردن بزهکاران در جامعه پیشگیری شود و دست بریده یا دندان شکسته پدید آمده از قصاص آنان جامعه را بیش از پیش با زشتی و خشونت همراه نسازد. در آغاز دوره ساسانیان تنصر درباره جلوگیری از انجام قصاص می نویسد کیفری در خور است که چنانچه ظالم را از آن برنجاید و مظلوم را منفعت و آسایش رسد نه اینکه ظالم برنجاید و سودی به مظلوم نرسد دیگر هیچ عضو که قوت ناقص شود جدا نکنند تا همیشان را آر نباشد و هم به کار شاد باشند بدین روش از بردن آبروی بزهکارانی که نخستین بار خلافی انجام داده جلوگیری میشد و برایشان امیدی برای بازگشت به جامعه و جبران گذشتهشان بر جای می ماند. همچنین از نقص عضوی که ناتوانی و از کارافتادگی افتادگی را به بار می آورد، پیشگیری می و این گونه به ذهکار به جای اینکه جبران گناه خود را با خدمت گزاری قربانی انجام دهد، خود به قربانی دیگری که ادارهش بر جامعه تحمیل می تبدیل می گشت. این نگاه تنسر، سرچشمهش، همان در نظرگیری نیکخواهی همگانی برای کشور بوده است. پیروز از شاهان خوشنام ساسانی زمانی که خشکسالی و بخشی از کشور چیره گردید دستور داد نه تنها مالیاتی از مردم دریافت نشود بلکه دارایی‌های ها نیز به مردم داده شود تا مردم با کمترین تلفات و آسیب از آن سالهای سخت گذر کنند بدین گونه شاه دادگر ایران در عمل نشان داد که آتشکده ها و این گونه کانونهای دینی برای مردم هستند و در خدمت مردمی باشند. نه اینکه دوکانی برای بهره از مردم رنج دیده باشند و نیم نگاهی هم به نیازهای آنان نداشته باشند. در اینجا صلاح کشور یا همان نیکخواهی همگانی در بخشش دارایی‌های نهادهای دینی در میان مردم و جلوگیری از مرگمیر ایرانیان در خشکسالی جلوگر شده است. پیوند شهریار و توده اگرچه پیوند دو دوست نبود و همیشه فاصله ای میان این دو نگه داشته میشد، ولی شاهان ایران به ویژه در دوره اشکانیان که چشم و گوش شاهی در استانها فعال نبودند، امور استانها و مناطق را در سفرها به آن نواهی در همانجا انجام می دادند، نه از پایتختی تختی دوردست، رایا شاه را با تشریفات پیشواز می کردند. این گونه شهریار به خیشکاری خود در برابر مردم پیمان داشت و برای درمان دردهایشان مرهمی در اندازه و توان ممکن بود. در یکی از اندرزنامه هایی که در برگیرنده سنت و آین کشورداری ایرانیان است، می پادشاهان گفتند که شاه می باید تا خیر و خوبی ملت خود را از خداوندگار خواستار شود چون نیایش خسروان دادگر و نیک نیکخواه است که به اجابت نزدیکتر است. نیکبختی کشور آنچنان اهمیتی را داراست که بر هر ارزش دیگر حکومت و جامعه مانند مالکیت خصوصی برتری دارد. مالکیت فرد بر دارایش از اصول پذیرفته شده و پشتیبانی شده ی عرف ایرانی بود و دین ایرانی زرتشتی هم آن را عرج می نهاد. بهرام گور در اشاره به مردی خصیص و تنگ نظر که با داشتن مال و دارایی فراوان زندگی پستمنشانه را پیش کرده بود به همراهانش میگوید از آنجا که دارایی مرد خسیص ولی توانگر از خونریزی و دزدی به دست نیامده است نمیتوان آزارش داد و یا ثروتش را از او به زور ستاند نبشتانک گردادگر بودمی همین مرد را نیز نپسودمی. نیاورد گرد این زدوزدی و خون نبود هم کسی را به بد رهنمون همین بود که این مرد بود ناسپاس زی یزدان نبودش به دل در حراس ولی همین سامان فرمانروایی در زمان بلاش ساسانی ارج به مالکیت خصوصی را به خاطر ارزش والاتری یعنی نیکخواهی همگانی به کناری می نهد. بدین گونه که شاه دستور می دهد که اگر به دلیل توهیدستی و نداری خانواده ای از دهکده خیش کوچ نمایند کت خدای ده را باید کیفر داد. که در کمک مالی و خوراکی به آن خانواده کوتاهی کرده است صلاح کشور نیکخواهی برای همه مردم و جلوگیری از گسترش ویرانی و بینوایی به دلیل خشکسالی و بلایای طبیعی آن اندازه در اهمیت بودند که کت خدایان ناگزیر می‌شوند تا از مال خیش به تاهیدستان و گرفتاران کمک نمایند در سخنان قباد، شاه ساسانی در پاسخ به پرسش مزدک بار دیگر پا گذاشتن بر مالکیت خصوصی افراد به ویژه اگر پای مرگ و زندگی دیگر شهروندان به میان آید آشکار می شود. اینجا نداری و بینوایی به مارگزیدگی مانند شده و خوراک و ثروت انبوه به پادزهر یا تریاک همانند شدهاند و قباد بر این باور است که اگر کسی از دادن پادزهر خود برای مارگزیدگی کس دیگری سرباز زند جنایتکار است و سزایش مرگ است بدو گفت کان کس که مارش گزید همی از تنش جان بخواهد پرید یکی دیگری را بود پادزهر زهر، گزیده نیابد ز تریاک بر. صدای چونین مرد گویی که چیست که تریاک دارد درم سنگ نیست. چنین داد پاسخ ورا شهریار که خونیست آن مرد تریاک دار. به خون گزیده به باید کشت به درگاه چون خسمش آرد به پشت. اردشیر پاپکان در نامه به کارگزارانی که به استانهای دور و نزدیک کشور میفرستاد مینوشت در هر ماه برای بینوایان مقرری به گردن گیر و سامان آن پرداختها را آشفت مساز همه این نمونه هانیکوکاری های بنیادینی هستند که در جوامع امروزی تأمین اجتماعی و خدمات بهزیستی نامیده می شود که از سوی دولت به شهروندان ارائه می گردن. بزرگ مهر فرزانه نیز گفته است بهترین شادی پادشاه باید به سبب نیکی باشد که از او به مردم رسیده است او پیامد آزمندی شهریار را رنج و آزار زیر زیردستان و مردم میداند و بدین گونه گرایش شاه به گردآوری مال را نکوهش می کند. اگر پادشاه آز گنج آورد تن زیردستان به رنج آورد از دیدگاه قباد ساسانی پادشاهی که سیاست و پرورش ملک و قمخاری مردم به نیکویی می کند و در زمان پادشاهی او همه مردم در رفاه و آسایش و فراغت و آفیتند از پادشاهان دیگر برتر است. اینگونه دولت آرمانی آن است که در روزگارش آب خوش از گلوی ملت پایین رود. شهریاران برجسته ایران کوهن در دهشمندی و دستگیری از گرفتاران و مستمندان بارها نمونه های از خیشتن بر جای گذاشتند. مردم استخر آبادترین شهر فارس در زمان ساسانیان از نیامدن باران شکایتی به دست اردشیر دادند. زیر آن نوشت اگر آسمان از باریدن بخل ورزیده ابر ما خواهد بارید فرمان دادیم شکست شما را جبران و بی را با برگ و نوا کنند در شاهنامه شاپور یکم در وسیعت سیاسیش خزانه کشور را از آن همگان به ویژه توهیدستان دستان مرا گنج دینار بسیار هست بزرگی و شاهی و نیروی دست خورید که دارید و آن را که نیست بدانید با گنج ما او یکیست. سر بدره ما گشاده است باز نباشد نشستن کزندر نیاز. اردشیر پاپکان یکی از خدمات اجتماعی کارآمد را بر جای نهاد و از یتیمان و بیوه زنان توحیدست پشتیبانی نمود. در این بانه می که بر خلایق ناظران برگماشت تا چون کسی متوفی شود و مالی نداشته باشد غم تجهیز و عقاب او بخورند بهرام گور با اعلام بخشایش گسترده برای پشتیبانی از ردیهای آسیب پذیر بهترین تامین اجتماعی را از سوی حکومت به نمایش میگذارد و ورشکستگان با آبرو، سالخوردگان از کار افتاده، کودکان بی بیوه زنان بدون پشتوانه مالی و نیازمندان آبرومند را شامل های دولتی میداند. تون گرد کن هرچ هست ببخشم ما بر سوی یک موی دست کسی را که پوشیده دارد نیاز گر از بد همی دیر یا بد جواز کسی را که درویش باشند نیز ز گنج نهاده ببخشیم چیز کسی کوبه میرد نباشدش خیش و او چیز ماند ز انداز بیش به درویش بخشم نیازم بگنج نبندم دلندار سرای سپنج همان نیز پیری که بیکار گشت به چشم گران مایگان خار گشت دگر هر کرا چیز بود و بخورد کنون ماند با درد و با باد سرد کسی را که نام است و دینار نیست به بازارگانی کسش یار نیست دگر کودکانی که بینی یتیم پدر مرده و منده بی و سیم زنانی که بی شوی و بی پوششند که کاری ندانند و بی کوششند بر به این همه خواسته بر افروز جان روان کاسته به فرمان عنوشی روان دولت پشتیبانی خود را از آسیب دیدگان در زمان انجام کار و همچنین بدهکاران با بازپرداخت بدهی آنان اعلام نمود که این خدمات به راستی از خدمات اجتماعی دوران امروزی والاتر بود هر آنکس کس که از کار دیده است رنج بیابد به اندازه ی رنج گنج بگویید یک سر به سالار بار که از ما کند موزد را خاستار وگر وام خواهی بیاید زرا درم خواهد از مرد بی دستگاه نباید که یابت توحیده است رنج که گنجور وامش بتوزد زگنج گنج در دفتر چهلوشیش، دفتر سوم دین کرد، های نهگانه شهریار مانند رسیدگی به زنان از کار افتاده، کودکان ناتوان، بیماران درمان ناپذیر، ساخت درمانگاه، نمونه های روشنی در دهشمنی دولت می اینها وظایفی فیست که در این زمان زیر عنوان مسئولیت های سازمان های بهزیستی و تأمین اجتماعی بر دوش حکومت هاست. نه تنها بنیاد تصمیم گیری های کلان کشور باید بر پایه نیکخواهی همگانی برای همروزگاران باشد، بلکه نیکخواهی آیندگان نیز می در آن گنجانده شود. نظریه پرداز اندیشه سیاسی سالهای آغازی ساسانیان یعنی تنصر می نویسد که هر پادشاه که برای خوش آمد امروز خیش قانون عقل جهانداری را فرو گذارد و گوید چون اثر این فساد صد سال دیگر ظاهر خواهد شد منم روز تشفی نفس خود فرو نگذارم به خطا میرود حکما پادشاه با تمکین آن را خوانند که صلاح روزگار آینده بهتر از آن گوش دارد که غم زمان خیش را این گونه اندیشه سیاسی ایران شهری چند نسل را در چشم‌انداز خود میگذارد و نه تنها در برابر اکنونیان که درباره فرداییان نیز دولت فرمانروا را ناگزیر به پاسخگویی می‌داند در همین پیوند نگهداشت منافع کشور و صلاح ایرانیانی که در سالهای آینده در ایران زمین خواهند زیست منوچهر پیشدادی که از دستندازی تورانیان به میهن آزرده و است، این گونه به ایرانیان همروزگار خیش هشدار می دهد. ای مردم، شما همه مردم را نزاده اید. مردم، مردمان تا هنگامی که از خیشتن پاس دارند و دشمن را از خیش برانند. تورانیان به پیرامون شما دست انداخته اند. و این نیست مگر از آن که شما دشمن را باز نداشته اید و کار را آسان گرفته اید. خداوند کشور را به ما داده است تا ما را بیازماید که اگر سپاس گوییم فزونی بخشد و اگر نا سپاسی کنیم کیفر دهد؟ انوشیروان در سخنانی که اندیشه کشورداری وی را باستاب می دهد، خیر همگانی را حتی به نیکخواهی غیر ایرانیانی که در ایران شهر زندگی می نمایند می و برای آنان نیز از بزرگان ایران آسایش آرامش و داد می جوید. با توحیدستان هم دردی کنید و بینوایان را بنوازید و پاس همسایگان بدارید و با بیگانگانی که در میان شما زندگی می به نیکی رفتار کنید که آنان در پناه و زنهار من می باشند نامیدشان مکنید بر ایشان ستم مکنید زورگویی مکنید در تنگ نایشان منهید که سختگیری سرپیچی آرد اگر آزاری از ایشان ببینید شکیبایی کنید و زینهار و پیمانتان را پاس دارید او حتی از این هم فراتر رفته و این نیک خواهی همگانی را نه تنها برای ایرانیان امروز و فردا و زیست بوم ایران شهر خواستار می شود بلکه تا جای ممکن غیر ایرانیان را نیز شامل می گرداند چون قیصر به من نیرنگ زد و من به کشور او لشکر کشیدم، او خار شد و خواستار آشتی کردید. برای من خاستهایی فرستاد و پرداختن باج و قرامت را پذیرفت. ده هزار دینار از آنچه فرستاده بود را به بی نوایان و برزگران روم بخشیدم، اوج بزرگ منشی را در عریکه قدرت اردشیر پاپکان به نمایش گذاشت که در را بر روی همه ایرانیان برای دادخواهی نمودن باز نگه داشت و در این میان حتی این حق را به مخالفان خود نیز داد که برای گرفتن حق خیش به بارگاه شاه بروند. جهان سر به سر در پناه من است پسندیدن داد راه من است گشاده است با هر کس این بارگاه زبت و از مردم نیک خواه. در زامیاد یشته عوستا افزون بر پاسخگویی شهریار در برابر مردم از خیشکاری وی در برابر دیگر جانداران سرزمین ما نیز گفتگو می شود. فرکیانی، پناه تیرهای ایرانی و جانوران پنجگانه و یاری رسان راست مردان و دین مزداپرستی است. در نمونه تاریخی دیگری هم ارجگزاری به زیستبوم که در پهنه نیکخواهی همگانی جای میگیرد از سوی ایرانیان به نمایش درآمده است و هم برتری دادن صلاح کشور بر هر چیز دیگر از جمله پاسداشت زیستبوم جلوگر شده است داستان این گونه بوده که اردشیر دوم حخامنشی با لشکریانش که برای سرکوب شورشی در کادوس یا تالش به سر می در کوه و دمن گرفتار سرما و تاریکی شب می شون. ولی با وجود پروانه شاه به بریدن درختان برای برافروختن آتش ایرانیان دل به بریدن درختان نمی دهند تا آنکه از سر ناچاری و برای نجات جان سربازان خود شاه انداختن در درختان را آغاز می کند. سپاهیان به جایی رسیدند که از نشیمنگاه های خود پادشاه بود و در آنجا باغ بزرگی پر از درخت های زیبا و آراسته بود هوا بسیار سرد بود و شاه به سپاهیان اجازه داد که از درخت های آن باغ ببرند و برای گرم شدن خود به کار برند و بر درخت های سنوبر و سرو دریغ نگویند ولی چون درختها زیبا بودند سپاهیان را دریغ آمد که آنها را براندازند و سختی سرما را بر خود آسان سازند. این بود که خود شاه تبری به دست گرفته و نخست چند درختی را از بزرگترین و زیباترین آنها برانداخت تا پس از وی سپاهیان تیشه برندهرختها بنهادند و آتشهای بزرگی پدید آوردند تا شب را به آسانی بگذرانند. در کمتر جایی در جهان آن روز این چنین مهر و ارجی برای زیست بوم از سوی ملتی دیده شده است سربازان از سرما به خود می‌لرزیدند و خطر مرگ را بیخ گوششان حس می‌کردند ولی دست به تبر برای انداختن درختان نمی‌بردند این نشانه ای از آن همگانی همگانیست که گروه های آدمیان و چهارپایان را در نوردیده و گیاهان را نیز در بر میگیرد. با وجود این، نجات جان ایرانیان در آن شب سرد بر هر کار دیگری از جمله نگهداری از زیستبوم برتری داشت و بزرگترین مسلحت کشور در آن زمان بود. از این رو اردشیر دوم حقامنشی برای انداختن درختان نخست خود دست به کار شد. پذیرفتن ارزش انسان و ارزگذاری به جان و زندگی وی در دیدگاه و در کاربرد و همزمان شناسایی خیشکاری آدمی در جهان جانمایه نگاه ایران شهری به جامعه و سرپرستی آن بود. افزون بر اینها رواداری عرفی و دینی ایرانیان به همه شهروندان نه تنها تن و جان که روان انسانها را نیز ارجمند می نمود. در همین زمینه کارکرد ایران حخامنشی در کارتاج همان تونس کنونی که توسط زندیاد داریوش همایون بررسی شده را بازخانی می کنیم. مردم کارتاج یک پیکر مفرقی به نام ملخ را می پرستیدند. که هر از چندگاهی کودک بیگناهی را برایش با انداختن در آتش قربانی می کردند. زمانی که آن بخش از کارتاج جزو امپراتوری حخامنشی شد، داریوش دستور داد که این رسم را براندازند و از آن پس دیگر آدمها را قربانی نکردند. قربانی کردن انسان در آن ناحیه پیوندی به اداره شاهنشاهی پهناور حخامنشی نداشت. داریوش می توانست بی اعتنا از کنار این زشتکاری بگذرد و کارش را بکند و برای خودش و شاهنشاهی گستردهش هم گرفتاری برپا نکند ولی شاهنشاه ایران این رسم زشت را برانداخت و به این کیش ضد انسانی بهایی نداد این مداخله دولت در کاری که سودی برایش نداشت در حالی که می توانست به شورش کارتاجی ها بیانجامد نشانه چربش جهانبینی ایرانی بر آفیت طلبی و سیاست بازی های مرسوم است. یعنی در فرهنگ ایران شهری قربانی کردن هیچ انسانی در هیچ جا روا نیست و باید از آن جلوگیری شود بدون هیچ اگر و امایی. با اینکه که رواداری از ویژگی های آشکار منش ایران شهری بود ولی اینجا دیگر باور و آرای اکثریت مردم ناحیه در کارتاج ارجمند نیست خود انسان است که ارجمند است این چیرگی نیخایی همگانی بر اراده عمومی بود که در تصمیم‌گیری فرزانگان و خردمندان ایرانی نمود یافت جلوی نادرستی و انسان ستیزی باید گرفته میشد حتی اگر رأی و باور اکثریت بر انجام آن کار نادرست بود. هنگامی که سخن از تفاوت نگاه ایران شهری با نگاه آتنی مبتنی بر مردم سالاری می شود، به هیچ روی به منزله بی بودن مردم در پهنه تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی نیست، همچنان که در سخنان منوچه شاه رو به بزرگان و اشراف کشور به روشنی اهمیت مردم و خواسته های آنان آشکار می شود در کارهای مردم بنگرید که نان و آبتان از مردم است در میان مردم اگر داد بگسترید به آبادانی رویارند و این باج یا مالیات را فزونی بخشد و روزیتان را فراوان کند و اگر بر ایشان ستم کنید از آباد کردن روی بگردانند و بیشتر زمین را بیکار گذارند و این از باج بکاهد و روزیتان کاستی گیرد پس با مردم به داد رفتار کنید دموکراسی آتن آزادی بنیادی انسانی را نیز در مواردی کاملا زیر پا می‌گذاشت. همین دموکراسی اقواگر و فریبا چهره ای مانند سقرات را به دلیل داشتن باورهای خلاف عرف وادار به نوشیدن شکران نمود و از بین برد. کم نبودند کسانی که به دلیل اختلافهای سیاسی و یا فکری از دولت شهرهای یونانی شهر بند یا نفی بلد شدند، بیرون راندن افراد از زادگاه و خانه و کاشانه پا بر روی ساده ترین حقوق انسانی بود. دموکراسی بحرکش و سودگرایانه آتن اقلیتی را بر سرنوشت همه چیره گردانده بود تا به خاطر داشتن اکثریت آرای بخشی از مردم شهر حقوق طبیع دیگران را زیر پا بگذارد. در پی برپایی دولت دموکراتیک در شهر افسس از شهرهای یونانی نشین اندیشمند سرشناس یونانی هراکلیت در نامه‌ای که در آستانه قدرتگیری عوام در این شهر نوشته است با افسوس و اندوه از قدرتگیری توده میگوید بزرگان شهر باید یک به یک خود را به دار آویزند و حکومت را به کودکان واگذارند مخالفت با آنگونه گونه های دموکراتیک محدود به هراکلیت نمیشد. سرشناسان این فیلسوف یونانی تبار افلاطون حکومت دموکراتیک را گونه مبتزل جمهوری یا همان حکومت قانون می‌شناخت. همان گونه که خودکامگی را نسخه منحط شاهی می‌انگاشت و اولیگارشی یا حکومت گروهی محدود را حالت زوال یافته یا حکومت سرآمدان میدانست. در پی این افلاتون در نامه هفتم خیش می نویسد سرانجام دریافتم که همه شهرهای کنونی به طور مطلق دارای نظامهای سیاسی بدی هستند کشتن سقرات به دست سیاستبازان فاسد سیاهکاری بازیگران دموکراتیک در آتن و فروریزی آتن دموکرات در برابر اسپارت غیر دموکرات و به آتش کشیده شدن آن شهر افلاتون را آن داشت که نظریه ادالت خود را که فرزانگان را در فراز حرم جامعه جای میداد را احتمالاً از روی شهریاری ایران شهری نسخه برداری نماید و نام آن را فیلسوف شاهی بنهد او بحران دموکراسی در آتن و نیز های دیگر شهرهای یونانی را بیش از یک زوال سیاسی میدانست و آن را ناشی از نبود داد در سامان اجتماعی مینگاشت پس برای کنکاش در آن به فلسفه چنگ زد در پیوند با دلسردی و ناامیدی بزرگان درباره نظام سیاسی دموکراتیک دیوژن درباره هراکلیتوس میگوید که وی هنگامی که از دست همشهریان خیش رنجیده بود با فرزندانش به گوشه ای رفت و با ایشان به بازی مشغول شد و چون مردم گرد و او آمدند به مردم گفت ای شور بختان از چه عجب دارید بازی با کودکان در نظر من سزاوارتر از آن است که با شما در سیاست شرکت کنم خود دیوژن آنچنان از جو اجتماعی شهر خود بیزار بود که روز روشن با چراغ به دنبال انسان می‌گشت. حتی در عصر پسا اسلامی تاریخ ایران در صده های 8 تا 10 میلادی که نهضت ترجمه در جریان بود، ایرانیان گرایشی به نوشتارهای سیاسی یونانیان نشان ندادند. مرتزا ساقف فرد درباره این بیمحلی جامعه فرهیخته ایران به دانش سیاست یونانیان بر این باور بود که ایرانیان با آنکه به ترجمه تمام آثار فلسفی و علمی مهم بزرگان یونان پرداختند ولی به نوشته‌های سیاسی آنها هیچ گونه توجهی نداشتند و تردیدی در برتری نظام پادشاهی بر نظام دموکراسی از نوع یونانی آن نداشتند از این رو در آن روزگار اثری از ترجمه کتابهایی مانند جمهوری افلاتان و یا سیاست ارسطو نمی‌بینید فقط با تغییرات شدید علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در غرب و پیشرفت نظامهای مردم سالار در آن کشورها از یک سو و تبایی شدید جامعه قاجاری از توی دیگر بود که در نخستین سالهای صده 20 میلادی ایرانیان به فکر محدود کردن قدرت استبدادی شاه افتادند و نهزت مشروطه پدید آمد. این رویه زد و بندهای پشت پرده، راهندازی دسته های سیاسی که پیش زمینه احزاب سیاسی امروز هستند و قربانی کردن مساله همگانی در پای سودجویی فردی و یا گروهی که از یونان به روم نیز و ارس رسیده بود در دوره پارتیان نیز چشم اسفندیار امپراتوری روم در برابر ایران اشکانی بود. آن اندازه نفوذ ایران اشکانی بر تصمیم گیرندگان سیاسی در روم بالا بود که صدای سکه های سیمین ایرانی در جیب سناطورهای رومی به زبان زدی به معنای رشوه سیاست سیاستمداران رومی از دولت اشکانیان بدل شد اشکانیان با رشوه دهی سرداران برجسته روم را که بیش از خدمات رزمی به های قدرت گرفتار بودند به جان هم انداختند و یا از رشک و رقابت میان آنان برای دشمنی افکندن و راه انداختن جنگ داخلی در روم سود میجستند. نمونه روشن آن پشتیبانی ایران اشکانی از پومپی بر ضد جولیوس سزار در نبرد فیلیپی بود. همین راهکار را رومیان برگزیدند تا شاهزادگان ایرانی را بر علیه شاه برانگیزند و در ایران جنگ خانگی راه بیندازند. وارثان اندیشه سیاسی آتن و پدران معنوی دموکراسی امروز یعنی دولت روم به ویژه مجلس سنای آن نشان دادند که مشارکت نااهلان در تصمیمگیری های کلان کشور خیلی بیشتر از یک حکومت فردی میتواند به فساد بیانجامد و دستاویزی برای قدرت خواهان سوجو در راستای منافع گروهی و محفلی به جای منافع و مسالله کشور باشد. از دیدگاه محدودیت که دموکراسی برای آزادی انسانی ایجاد می کند نیز آن را به نقد کشیدند. آزادی پیشنیاز منطقی برای طرح مسئله دموکراسی در باختر زمین بوده است. از دیدگاه تاریخی نیز آزادی پیشگام بر دموکراسی بوده است دموکراسی در جوامع غربی در آغاز به گونه مجالس نمایندگی یا پارلمان به عنوان ناظر و کنترل کننده حکومت پدیدار شد در آغاز پارلمانها برخاسته از گزینش مردم نبودند و کمتر از اکنون وظیفه قانونگذاری را بر داشتند آنها نمایندگی از رده بزرگان جامعه یعنی زمینداران، شاهزادگان، بازرگانان، وابستگان کلیسا و سرداران سپاهی را داشتند. در پی آن مسئله تنها از محدود کردن قدرت نهاد سلطنت فراتر رفت و انسان غربی در کوشش برای دستیابی به آزادی و پاسداری از آن در جامعه به فرمول پیروی از اراده عمومی یا دموکراسی رویاورد. از نگاه لیبرال ها هم به دموکراسی نقد های جدی وارد شده است. ژان ژاک جا روسو دموکراسی را حاکمیت مردمی میداند و برپایی چنین حاکمیتی را با قرارداد اجتماعی میان انسان آزاد توضیح میدهد. او میگوید که انسان آزاد و مختار است ولی چون موجودی است اجتماعی و در جامعه زندگی میکند حق خودش را به جامعه واگذار میکند. از دید وی دموکراسی یا حاکمیت مردم از راه قرارداد اجتماعی بنا می شود که در آن افراد همه حقوق و آزادی هایشان را به پدیده برتری به نام اراده عمومی واگذار می کنند بدین گونه انسان ها به گونه اندام های یک پیکر که اراده عمومی نامیده می شود در می آیند. روسا آزادی انسان‌ها را در گروی نهادینه‌شدن دموکراسی کامل می دانست که در آن انسانها به جای آداب و سنت‌ها که سرچشمه ای دارند از اراده عمومی فرمان می‌برند گرچه اراده عمومی براینده حق تک تک افراد اجتماع است ولی برتر از حق فردی هر انسان است برای اینکه فرد انسانی در یک کلیتی به نام جامعه آب می‌شود از اینجاست که روسو را پدر توتالیتاریسم صداهای 19 هم و 20 میشناسند چون از استبداد فردی میگریزد ولی پیامد نسخه آرمانیش میتواند تواند بر پایه استبداد توده باشد رومیان میگفتند انسان حق دارد خودش را برده کند و به دیگران بفروشد روسو هم در نسخه مدرن آن میگوید انسان حق دارد که اراده خودش را به عموم واگذارد اگر دموکراسی را حاکمیت مردم بیانگاریم و حاکمیت مردم را واگذاری بیقید و شرط حقوق فردی به اراده عمومی که به شکل جامعه ژلوگر می شود بدانیم، به گونه ای حکومت مطق مردمی خواهیم رسید که بلغوه قدرت بیمرزی دارد. چنین حکومتی چون مدعی نمایندگی اراده عمومی است بدون رویارویی با اعتراضات گسترده ای میتواند دست به محدود کردن آزادی های فردی بزند. اگر دولت دارای قدرت مطلق بر همه هموندان جامعه باشد، آزادی های مدنی و حقوق شهروندی پیرو اراده دولت می شود. پس آزادی و حقوق انسان ها در قدرت مطلق حکومت دموکراتیک یا اراده عمومی ناپدید می شود. یعنی افراد آزادی های خود را از دست می دهند تا به جای آنان حکومت برگزیده مردم آزادی و اراده مطلق به دست آورد این فشرده ای از نقد لیبرال ها به دموکراسی بود. هر حکومتی تنها با همراهی اکثریت در برآمدن آن حکومت قانون نخواهد بود. جامعه می تواند در چیرگی دارندگان زر و زوری که با آسانی اصحان توسع نیفته عوام را در اختیار گرفتهاند باشد. به گونه یکی از بنیادی ترین بنمایه های دموکراسی یعنی برابری انسان ها در برابر قانون رخت می بندد. برابری تنها در وضعیت حکومت قانون انجام پذیر است. پس از اینکه اراده عمومی جای قانون را بگیرد هرچند با اراده اکثریت بیدرنگ افزون بر آزادی داد نیز از میان میرود. یکی از آشکارترین و برجست ترین نمونه ها در این زمینه انقلاب فرانسه است. آماج آغازین انقلاب به ظاهر سرنگونی خودکامگی و پایان نابرابری ها و امتیازهای جامعه اشرافی و کلیسا بود ولی به آهستگی حاکمیت مطلق مردمی جایگزین این اهداف شد و حکومت ترور به نام اراده عمومی و حاکمیت مردمی آزادی های فردی را از میان برد بیداد حکومت مردمی ابعادی بسیار گستردهتر از ستم حکومتهای فردی یا اشرافی دارد اگر دموکراسی به مردم سالاری بیمرز و افسارگسیخته تبدیل شود استبداد با فشار بیشتری بر آزادی‌ها و حقوق افراد سنگینی می‌کند. زمانی که حکومت مردم سالارانه با زیر تاثیر گذاشتن افکار عمومی با شعارهای پپولیستی یا آمه پسند مهار مردم را در اختیار بگیرد دیگر هیچ مانعی بر حکومت متصور نیست چون حکومت خود مردم است. در این سیستم کسان جداگانه هیچ حقی برای خود ندارند که در برابر آن کل یعنی حکومت مردمی ارزندام نمایند. اندیشمندان فرانسوی همچون توکویل و مونتسکیو خودکامگی اکثریت را دستاورد نظام دموکراتیکی می‌دانند که در آن نهادهای مدنی شکل نگرفتهاند و بخش خصوصی نیرو نیافته است در این دیدگاه نگاه این دو نفر عمدتاً به انقلاب فرانسه و آمریکا بود هرچند در صده 19 هم و به ویژه 20 هم که نهادهای مدنی جا افتاده مانند احزاب جمعیتها، و بنیادهای غیر دولتی نیز در کشورهای دموکراتیک موجودند به نظر میرسد رسد که نبز جامعه در اختیار دارندگان رسانه ها و عربابان ماشین های تبلیغات می باشد رفتار غیر انسانی، فساد و سواستفاده، استفاده، حوچیگری، فریبکاری و بیداد در یک نظام دموکراتیک هم مانند یک نظام استبدادی فردی پیش می آید حکومت حکیمان و خیردمندان نیست حکومت پاکیزگان و پارسایان هم نیست و آنان که بر مسند قدرت جای میگیرند آموزگاران نیکمنشی و اخلاق نیز نیستند تفاوت دموکراسی با نظامهای خودکامه آن است که در دموکراسی شاید بتوان راههایی برای افشای فساد زد و بند و جنایت پیدا و با بهرهگیری از دادگستری نسبتا مستقل تبهکاران را تحت پیگر قرار داد البته همزمان با آن میان هم برای دور زدن قانون و به کارگیری قانون علیه قانون موجودند گواه آن نمونه آمریکاست که خیلی بزرگی از وکیلان و لابیگران به این کار مشغولند دموکراسی آمریکایی که برای دهه های درازی عوام گرا بوده است اکنون به گونه آشکار عوام زده شده است برای داشتن یک جامعه مدنی دادگستر و خردمدار مدار خود آگاهی ملی و مهر به میهن یک پیشنیاز است وگرنه حکومت دموکراتیک می شود حکومت بازیگردانان اقتصادی که دارندگان سرمایه هستند و بازیگران سیاسی که به ساز ثروتمندان می رخصند. اینگونه به جای فرمان روایی اراده ملی گواه چیرگی رندانی هستیم که با در دست گرفتن رسانه‌های گروهی افکار عمومی و در پی آن های رأی را دارا میشوند. در جامعه از دادگری آزاد گذاشتن افراد در میدان رقابت اقتصادی تنها به سود کسانی پایان می‌یابد که در مسابقه برای دستیافتن یافتن به قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی از برکت زیرکی و فریبکاری سوداگرانه یا پیوندهای خانوادگی چندین گام از مردم ساده و بیخبر پیش باشند. بدین روی نیاز به یک نظارت جدی از سوی دولت بر کنش های اقتصادی و تأثیر آن بر تصمیمات سیاسی خیردمندانه و دادگرانه می باشد. آبادسازی در باورهای ایرانی زرتشتی، هستی به دوزیر مجموعه گیتی و مینو بخش می شود. گیتی به معنی جهان محسوس فرایافتی است در برابر مینو به معنی هستی غیرمادی. آبادسازی گیتی در برگیرنده بالاتر بردن تراز زندگی مردم و سازندگی در پیرامونمان از خانواده کوی و برزن گرفته تا روستا، شهر و کشور و جهان می شود. برپایی اندیشه ایرانی، رسیدن به رسایی منوی و پالایش روح و روان در شرایطی که فرد و جامعه از دید رفاه و آسایش در تنگ نباشند، شدنی نیست. از دل کشوری ویران و ناتوان و مردمی مصمد و نیازمند، جامعه‌ای والا، سرفراز، آبرومند و خوشبخت بیرون نمی آید. پانویس در اصر نوین نیز برخی سرآمدان جامعه بر فقدان نگاه آبادگر و رفاهساز در کشور به عنوان یکی از بنیادهای زوال و انحطاط ایران تأکید کردهاند یکی از روحانیون آگاه و نیکسرشت دوران قاجار ممقانی در کتاب خود مسالک مینویسد استقلال و احیای ایران هیچیک درست و تامین نخواهد شد مگر اینکه ایران قوه هربیه و استعداد اسکریش مرتب بشود و او هم مرتب نخواهد شد مگر اینکه مالیه و ثروت ایران مرتب بشود از این رو آباد کردن گیتی نگرانی محوری عنصر ایرانی و پیش نیازی برای فرزانگی و فرهیختگی گردید در دین چیره بر ایران شهر یعنی کیش مزدی سه تن در زمره گناهکاران شمرده می شدند. کشاورزی که در آبادی کشتزار خیش خفلد می قاضی بد و انسانی که مردم را میآزرد. نفر نخست آشکارا از آبازسازی گیتی روی گردانده است و با ویران شدن یک کشتزار آلوده گناه بزرگی شده است. در اندیشه ایرانی زندگی در گیتی ارزشمند بوده است و اهمیت دادن به آن و بهتر نمودن آن به هیچ روی غرق شدن در مادیات و امور دنیاوی انگاشته نشده است. آینی که کیفیت زیست انسان در این جهان را مهم نداند چگونه میتواند برای زندگی مینوی انسان جایگاهی قائل باشد. طبیعی است که فرمانروایان در یک آین دنیا ستیز و یا کیش دنیاستیز پاسخگو نخواهند بود که چرا رفاه و آبادانی در جامعه وجود ندارد چه اصولا خیشکاری فرمانروا بهبودی زندگی این جهانی مردم نیست در داد که یکی از دفترهای دینی بازمانده از اصر ساسانیان و بازنویسی شده در دوره اسلامی است آمده است دستی که گندم میافشاند افشاند اشویی راستی و درستی می افشاند. در هیچ مرامو آینی، این چنین آبادگری و سازندگی ستایش نشده است و به ارزشی والا در پیکر اجتماع تعبیر نگشته است. همچنین، نرسیدن به کشتزار و باغ که ویرانی و خشکی آن را به دنبال داشته باشد وجدان فرد و اجتماع را به درد می آورد و افسوس خردمند را برمی انگیزد. بدحال است زمینی که زمان درازی در انتظار بذر بزرفشان و کشاورزی مانده است. در دین مزنی اسنا بی و بدبختی از کرده های است ولی توانگری و رفاه و آسایش ستایش شده اند. خانهی که بی تر است، دیو دروغ و دزدی و بدکرداری آسانتر در آن راه میابد، این دین بیان که بی آنکه دشمن بینوایان باشد، دشمن بینوایی است و دستگیری از بینوایان را سفارش می‌کند. همچنین در این پیوند در اوستا می‌خوانیم که سروش پاک را می ستاییم. کسی که از برای مرد و زن بینوا پس از فرورشتن خورشید خانه‌ای استوار بناکند را می ستاییم. دولت پسندیده در نزد نیاکان ما دولتی بود که در راستای رفاه مردم و افزایش ثروت ملی گام برمی داشت که خسرو کیانی آرمانشاه شاهنامه می گوید که چون این سزات که مردم را به آبادانی وادار کنیم تا به آن روی زیرا که توانمندی کشور و مردم به مال است که خداوند آن را وسیله بهسازی رستاخیز کرده است داریوش بزرگ از احورا شادی شادی آرامش برای ملتش آرزو میکرد و هزاره پس از آن بهرام گور برای شادابی آسایش ایرانیان هزاران نوازنده و رقصنده کلی را از هند به ایران آورد. خشایار شا به عمران و گسترش آبادانیش می و آن را در کارنامه میگنجاند. می گنجند. انگامی که من شاه شدم بسیار ساختمان عالی بنا کردم. آنچه را که پدرم کرده بود، آن را نگاه داشتم و با آن افزودم. آنچه من بنا کردم و آنچه را که پدرم بنا کرد، همه آنها را به خواست اهورامزدا مزدا کردیم. داریوش بزرگ هخامنشی آن انداز مقوله آبادانی را جدی دنبال می‌نمود که شخصا نامهای به فرمانروای یکی از نواحی شاهنشاهی می‌نویسد و وی را به خاطر انتقال و کش درختان میوهدار به آن سوی رود فرات ستایش می‌نماید این توجه دقیق و گرایش یک شهریار به آبادانی برای خوشنودی هوس و یا سلیقه اون نیست بلکه پیامد سیاست اقتصادی برای افزایش گسترش کاشت در همه سرزمین‌های شاهنشاهی است آبشخور این نگاه آبادگرانه نظام اعتقادی ایران شهری بوده است توسعه و پیشرفت که در اثار گذشته بیشتر در بخش کشاورزی نمایان میشد تا در صنعت در ادواری از تاریخ ایران پیش از اسلام به اوج ممکنه خود رسید در خوزستان، بختیاری، لورستان و فارس، گستری زمین زیر کشت در زمان انوشیروان روان سه تا چهار برابر زمین های امروز بوده است، ساخت کاریس یا قنات هایی که گاه درازای آنها به پنجاه کیلومتر می رسید، ایجاد بند ها یا ست کندن چاه ها و کانال ها برای آوردن آب به شهرها برای آشامیدن و آبیاری زمین های زیر کشت آبی از کوشش های اقتصادی سازنده در زمان ساسانیان بوده است. اما هنگ نمودن سکه ها از دید وزن و نما و به گردش در دوباره چک، سفته و برات در ایران ساسانی، پس از پیدایش آنها در دوره هخامنشی، نشانگر استواری و شکوفایی اقتصادی کشور در آن سالها می باشد، پرداختن به همه سازندگی های کهن ایران از سیستم بانکی و پستی زمان حقامنشیان تا شهرسازی و بازرگانی شکوفای زمان ساسانیان از حوصله این نوشجار بیرون است. شاید این مطلب خود گویا و بسنده باشد که نزدیک به دو هزار سکه ساسانی در اسکاندیناوی، آلمان، انگلستان و روسیه یافت شدند که نشانگر حجم بالای داد و ستد این سرزمینها با ایران در آن روزگار بوده است. در آغاز دوره ساسانیان، نظریه پرداز نظام اعتقادی نوین ایران شهر یعنی تنسر در بیان کوشش‌های اردشیر پاپکان می‌نویسد که در درازای تنها چهارده سال در جمله بیابانها، آبها روان گردانید شهرها بنیاد نهاد و روستاها پدید کرد. هوشش برای آبادسازی کشور و افزایش تراز زندگی مادی و معنوی مردم نه تنها خود ارزشی والا برای بهتر ساختن گیتی بود، بلکه از بیکارماندن ماندن فرمانروا و فرمانبر که پیامدش فساد و زوال است نیز پیشگیری کرد. تباهی حکومت در بیکارگی شاه است و تباهی کشور در بیکار ماندن مردم شیر در وصیتنامه سیاسی خیش نه تنها نفسابازی را که ارزشی والا ستوده و سفارش نموده بلکه دست کشیدن از سازندگی را عامل فروپاشی و حتی فرو افتادن دولت‌ها میداند بدانید که بر افتادن حکومت‌ها نخست از بیکار رها کردن مردم و سرگرم نساختن ایشان به کارهای سودمند آغاز شده است همچنین اردشیر می افزاید. شهریار خردمند و خوشبخت و پیروزگر و توانای بیدار دل و ژرف بین همواره می دمی از بهبودی بخشیدن به کشور خیش باز نیستد گواه دیگری بر اینکه در اندیشه ایران شهری آبادسازی از ارزشهای کانونی فرد و جامعه بوده است و همچنین از بنیادی ترین خیشکاری شهریاری به شمار می آمده است مهرهای حکومتی ایران ساسانی است. مسعودی وجود چهار مهر را در زمان شاهی انوشی گزارش می کند که شاه فرمانها را برپایه موضوع آنها با یکی از این مهرها ابلاغ می نموده است. مهر فرمانها برای امور مالیاتی که بر آن واژه داد کنده شده بود دیگری برای زمینها و داراییهای کشور که واژه آبادی بر آن نقش داشت سومی برای کمک و یاری رسانی که واژه شکیبایی را دارا بود و چهارمی که برای پک و چاپار کاربرد داشت و بر آن واژه شتاب نوشته شده بود چه زیبا در این چهار گونه مهر پیامی در خور و کوتاه در پیوند با درون مایه فرمان گنجانده شده است. داد برای کارگزاران مالیاتی، آبادی برای کسانی که در کار اداره امور کشور بودند، شکیبایی برای مصیبت زدگان و گرفتاران و شتاب برای کسانی که نقاط گوناگون کشور را به هم پیوند می دادند. در فرهنگ ایران شهری ویرانی به مرگ همانند می شود پس سازندگی تنها یک ارزش اخلاقی نیست بلکه برای عنصر ایرانی خود زیستن است می گفت آبادانی چون زندگی است و ویرانی مانند مرگ است کشتن یک تن با رها کردن یک سرزمین بدون کشت یکسان است و آن کس که توانایی آباد ساختن زمین خود را ندارد به سبب آنکه که دستش خالی است از خزانه کشور به او وام می دهیم تا بتواند زندگی خود را سامان دهد. در شاهنامه که خسرو را در زمینه آبادگری نیز مانند دیگر ویژگی های ستوده آرمانشاهی شهریار پیشتاز و نمونه می بینیم. همه بوم ایران سراسر بگشت به آباد و ویرانی اندر گذشت هران بوم و بر کن بود تبه بود و ویران ز بیداد بود درم داد و آباد کردش ز گنج ز داد و ز بخشش نیامدش رنج فردوسی در شاهنامه سردودمان کیانیان یعنی که قباد را کسی میداند که با به کارگیری داد و دهش آباد کننده گیتی است شاهی که همین گونه شهریاری را به پسرش کاووس نیست سفارش می نماید و آن رف یاد کرد به داد و دهش گیتی آباد کرد. سر ما کاووس ک را بخواند، ضداد و دهش چند با او براند آبادسازی از کنش های ستده است که نه تنها شهریاران ناگزیر به انجام آن، در بودند بلکه شاه آرمانی شاهنامه یعنی کیخسرو حتی در کشور شکست خورده توران نیز با جلوگیری از ویرانگری و تباهسازی آنجا به دست ایرانیان به اصل آبادانی دوستی حتی در سرزمین دشمن پایبند بند ماند هران کس که جوید همی رای من نباید که ویران کند جای من و دیگر که خوانند بیداد و شوم که ویران کند محتر بوم. اینجا دیگر ویرانسازی سرزمین دوست و دشمن نمیشناسد نفس ویرانسازی زد درزش و شوم است. خود بیداد است. در جایی دیگر در بخش تاریخی شاهنامه انوشیروان در پیوند با همیت آبادانی و سازندگی سخنی میگوید که به روشنی خیشکاری فرمان را در آبادانی ایران شهر می رساند. نباید که آن بوم، ویران بود که در سایه شاه ایران بود چو ویران بود بوم در بر من نتابد در او سایه فر من در فرازی دیگر از بخش تاریخی شاهنامه انوشیروان در سخنی به وزیر خود ویرانی و خرابی را نه سازگار با خرد و حکمت و نه هماهنگ هنگ با رادمردی و انصاف می داند نمانیم که بوم ویران کنند همی قارت شهر ایران کنند زشایی و وز روی فرزانگی نشاید چون این هم ز مردانگی نخوانند بر ما کسی آفرین چو ایران بود بوم ایران زمین انوشیروان نگرانی خودش را از نبود آبادسازی و کشت و کار این گونه بیان می‌دارد اگر پاییدن دشمنان و پاسداری از مرزها نبود کار باج یا مالیات و مردم را در ده بده کشور خود به دست میگرفتم. لیک ترسیدم که کارهایی که از آن بزرگتر است تباه گردد کارهایی که جز من کسی از پس آن بر نیاید و نتواند چون من استوار کند و مرا از آن آسوده بدارد افزون بر آن دشواریهایی در رفتن به روستا روستای کشور با سپاهیان و یارانی که از همراهیشان ناگزیر باشم برای مردم نهفته است. نیز خوش نداشتم که مردم را به درگاه فراخانیم چه بیم از آن داشتیم که باجگذاران یا مالیات دهندگان از آباد کردن زمینهایشان باز مانند یا کسانی باشند که رنج راه و آمدن به درگاه ما بر آنان دشوار آید، چه در آن هنگام؟ کار روستاها و کشدارها و آبها و کارهای ناگزیر دیگر که در همه هنگام سال رسیدگی نیازمنده است بر زمین خواهد ماند. آباد کردن گیتی گرچه پیامده نهادین شدن خرد و جاری شدن داد در زندگی انسان است ولی در گوهر خیش، است زندگی ساز و که ریشه در عرف ایران شهری داشته است. انوشیروان به درستی تأثیر داد بر آبادانی را دریافته بود. پس درست آن دیدم که باجگزاران یا مال یا دهندگان را از کارخیش بیش از آنچه زندگی بدان برپای دارند و به آبادانی شهرهایشان پردازند نباشد. نیز روانه داشتم که به سود کشور و پاسداران کشور دست آبادگران را توی سازم و درماندهشان کنم که اگر چنین کنم به سپاهیان و مالی دهندگان یک ستم کردم چه؟ اگر آبادگران مالیا تباه شوند آبادی نماند و آبادی جز به کشور و مردم نباشد اگر مالیا دهندگان را مایه زندگی و آبادانی نماند، جنگجویان که نیرو از آبادانی و آبادگران دارند نابود گردند که کشور جز از فزونی داشته مالیا دهندگان آباد نگردد. کهنترین اندیشمند سرزمینمان زرتشت یادگارهایش برای ایرانیانی که در صده های پس از وی زاده میشدند های ارزنده چون درختان سرو کاشمر و سرو اسفراین بود درخت نماد زندگی و آبادانی است اینها نمادهای تابناکی در ارج‌گذاری به ارزش والا آبادگری در فرهنگ ایران شهری بودند کریستیانسن سن درباره نگاه ایرانی زرتشتی به آواسازی و عشق به زندگی و سوی دیگر زوال و کمرنگ شدن تدریجی این نگاه در پایان دوره ساسانیان چنین می نویسد. در تحت تأثیر افکار نوین آن خوشبینی نخستین که بنیاد دین زرتشتی و محرک مردمان به کار و کوشش بود پژمرده و گسیخته شد. میل به زهد و ترک زندگی که در فرقه مخالف آین زرتشت مانند مانویان، رواجی به سزا داشت، رفته رفته وارد آین زرتشتیان نیز شد و بنیان این دیانت را برانداخت اقتدار و دولت متمرکز از زمانی که ایران هخامنشی در زمان داریوش بزرگ به پایداری و ثبات سیاسی و نظامی رسید، گرایش به تمرکز قدرت در دولت موجود پایتخت و آگاهی یافتن بر شرایط گوشه و کنار کشور با فرستادن بازرسان و چشم و گوش شاه افزایش یافت. به دنبال آن اقتدار سیاسی ایران بر منطقه و همچنین گسترش بیمانندی در پهنه بازرگانی، راهسازی، بانکداری، پست و چاپار، ارتش و کشاورزی به بار آمد که از ویژگی یک دولت متمرکز بود. پانویس حسین کازمزاده در نشریه ایران شهر هنگام سخن گفتن از الزام یک دولت متمرکز و مقتدر در ایران، حکومت داریوش بزرگ هخامنشی را به عنوان دولت نمونه در این زمینه معرفی می‌نماید. در گستره شاهنشاهی حخامنشی، به دلیل وجود ملتهای گوناگون مانند بابلی، یونانی، سندی و غیره، ساتراب که کارگزار شاهنشاه در آن ناهیه بودند، در گرداندن منطقه خود از اختیاراتی بحرمند بودند. حدود قدرت کارگزاران بومی به آهستگی کاهش میافت و حضور کارگزارانی که فرستادگان شاهنشاه به این مناطق بودند به آرامی، color تر در ادامه هنگامی که شناسای ایرانی از بافت قومی دینی و فرهنگی به ساختار هویت ملی دگرسان گشت دولت‌های محلی کم اختیار نیز از میان برداشته شدند و پخش جغرافیایی قدرت نیز ناپدید گردید گرایش به داشتن دولت مقتدر که زامن نگهداشت کیان کشور بود در صده های پسین در پیکر ایران ساسانی نمود یافت. دولت ساسانیان که بر پایه تمرکز و اقتدار برپا شد واکنش ژرفی به عدم تمرکز ملوک و توایف عشقانیان به شما می رفت. پانویس. روشن است که تمرکز قدرت و دولت مقتدر یک شبه در ایران پای نگرفت و فرایندی بود که از زمان اردشیر بابکان آغاز شد و در زمان انوشیروان به اوج خود رسید. حکومت غیرمتمرکز اشکانیان در پی یک اندیشه سیاسی و یا آینی شکل نیافته بود. بلکه برایند ویژگی های ایلیاتی و کوچنشین قبایل پارسو و سکا بود که پیکر اصلی پشتیبانان دودمان اشکانی را تشکیل میدادند. زندگی ایلیاتی و کوچنشینی قبیلهی در گوهر خود گرایش به عدم تمرکز و حتی گاهی تمرد از دولت را در خود داراست، پخش قدرت در گستره جغرافیایی که به پدید آمدن دولتهای کوچک محلی در دوره یشکانیان انجامیده بود، در صده پایانی این دودمان چشم اسفندیار ایران زمین شد. رقابت های زهراغینی که میان شاهزادگان و سرداران منطقی برای به چنگ آوردن تاج و تخت در می و البته در بیشتر موارد با برنگیختگی از سوی رومیان همراه بود کشور را در رویارویی روی با دشمن بیرونی آسیب پذیر ساخته بود به گونه ای که در 100 سال پایانی دوره اشکانیان پایتخت یعنی تیسفون سه بار به دست رومیان افتاد از سوی دیگر پیامد نبود دولت متمرکز و مقتدر در آن روزگار و نبردهای درونی قدرت فرسوده شدن اقتصاد و ناامنی راههای کشور برای بازرگاران بود از آنجایی که فلسفه وجودی دولت، فراهم آوردن امنیت برای ملت و زمین سازی انجام کار اقتصادی یعنی کشاورزی صنعت یا بازرگانی است، برای مردمان سرزمین دولت غیر متمرکز نتوانست در دهه های پایانی عمر خیش، خیشکاری یه حکومت مختدر را به انجام برساند و به آرامی حقانیت خیش را در نزد بخشی از ملت از دست داد، هم ایران هخامنشی و هم ایران ساسانی دو هستی تمرکزگرا نگاه ویجه ای به فراهم کردن امنیت دشت های شمال خاوری ایران شهر داشتند این دشت‌ها مسیر گذر کاروانهای بزرگ بازرگانی میان خاور و باختر بود که جاده ابریشم نام داشت و بودن دولت مقتدر و متمرکز در پایتخت ایران مهار و کنترل این سرزمین را شدنی مینمود یاداوری می‌شود که کوروش بزرگ به روایت هرودوت به نبرد با بیابان نشینان همین ناحیه کشته شد و همچنین در دوره ساسانیان از هنگام بهرام گور تا پایان آن دوره توان بالایی از دولت و ارتش ایران برای زدن هپتالیان و تورکان هزینه شد در شاهنامه نشانه های روشن از تمرکز حکومت را در زمان شهریاری که خسرو میتوان دید. آنجایی که پیش از کنارگیری خود از تاج و تخت و پیشنهاد کردن کهی لحراسب به بزرگان کشور برای جانشینیش فرمانداری استانهای کشور را به سرداران شایسته خود واگذار می کند. که خسرو رستم را بر سیستان، توس را بر خراسان و گودرز را بر قم و اصفهان میگمارد در حقیقت نفوذ محلی این بزرگان نیست که به آنها حقانیت فرمانروایی بر آن استانها را میدهد، دهد بلکه فرمان داشتن از شهریار یا دولت است که آنها را سزاوار حکومت بر آن استانها مینمایَد گفتنی است كه در بندهای چهل و یک و چهل در اوستا نیز دو بار از كیخوسرو به عنوان پهلوان سرزمین های ایرانی و فراهم کنندهٔ همبستگی در کشور یاد شده است بنابراین شاهنامه و اوستا به عنوان دو سند ملی و دینی ایرانیان در این زمینه همخانی و هماهنگی آشکاری دارند دولت آرمانی ایران شهر که شهریاری که خسرو نماداش کاران است، دولتی است متمرکز و مقتدر که ایرانشهر را یک پارچه و همبسته می خواهد. در تاریخ مدون سرداران جای پهلوانان شاهنامه را گرفتند. در دوران اشکانیان که ساختار دولت حکومت غیر متمرکز بود، خانواده پرنفوذ و نیرومندی همچون سورن، اسپندیار، کارن، مهران، اسپهبود و زیک در بیشتر کنش های سیاسی و سپاهیان روزگار حضور داشتند. پس از برپایی دولت متمرکز در زمان ساسانیان، این خانواده های از ساختار پادشاهان محلی به کارگزاران دستگاه کشورداری دگرسان شدند، برخی از این بزرگان این خانواده ها سرپرستان دستگاه دولتی گشتند مانند مهرنرسی، وزیر یزگرده کم و بهرام گور که از خاندار اسپندیار بود یا سوخرا، وزیر پیروز و قباد که از خاندان کارن بود. برخی چهره ها از فرماندهان ارتش ایران شدند مانند شاپور رازی از خاندان مهران که سالاره قباد بود و بهرام چوبین باز هم از خاندان مهران که سپهبده هرمز چهارم شد بر یک دولت نیرومند ایرانی در راستای یک پارش کردن ایران زمین که برنامه و آرمان ساسانیان بود به روشنی در این گزاره در کارنامه اردشیر پاپکان آورده شده است چون یک یکام به خداوندی یا شاهی رسید، همگی ایران شهر باز به یک خدایی توانست آوردن و سرخدایان کسته کسته یا استان به استان را حرمز به فرمان آورد. تک خدایی به معنی وجود یک دولت و یک درفش در همه پهنای ایران شهر بود. مرام اردشیر و یاران نظریه پردازش همچون تنسر و عبرسام رویاروی با تهاجم فرهنگی باخترزمین زمین که در آن زمان رومیان پرچمداران به شمار می و براندازی پاچهان منطقی با هدف یک پارچه نمودن سیاسی کشور بود. یک پارچگی که از یورش اسکندر به ایران شهر از دست رفته بود. خود اردشیر پاپکان هوشمندانه دریافت بود که برکشیدن هویت و فرهنگ ایرانی نیاز به ارائه یک آین ایرانی ریشه و پذیرفتنی دارد از این رو همه کوشش خود را به کار برد تا بتواند دین بهی بهیرا پویا نماید و آتشکده ها را رونق بخشد او میدانست که به پشتیبانی این آین ایرانی می تواند یک پارشگی و همگرایی دوباره ای در میان ایرانیانی که برای سالهای دراز زیر نفوذ و حجوم فرهنگ بیگانه به سربرده بودند پدید آورد. تاریخ نگاران اصر اسلامی ایران زمین نیز عدم اقتدار و نبود قدرت مرکزی در کشور را ترفند دشمنان برای ناتوانسازی ایران و چیرگی آسان بر آن میدانستند سالبی می نویسد؟ برای اینکه ایران زمین روی آبادانی نبیند و با شتاب به سوی تباهی رود اسکندر هیچ ترفندی را بهتر از آن ندانست که میان حاکمان آن دگانگی و اختلاف افکند هر یک را در ناهیهی پادشاه ولایت خواند تا از دیگری فرمان نبرد. آنچه سالبی از ترفند اسکندر برای ناتوانسازی ایران بازگو می کند، در نهان نبوده و ابن بلخی هم به آن می‌پردازد. اسکندر به سوی استاد خیش عرستو نوشت که این فتح که مرا برآمد از اتفاقات نیک بود ولی اکنون که این شاهزادگان را گرفته مردانی هستند، سخت مردانه، و ارجمند و دانا و از ایشان میترسم که زمانی خروج کنند و در کار من وهنی افکنند و میخواهم که همگان را بکشم تا تخم ایشان بریده شود تو پاسخ نوشت که اگر تو ایشان را هلاک کنی آب و هوای بابل و فرس یا ایران شهر امسال ایشان را تولید کند هر کدامشان را به طرفی بگمار و هیچ یک را به دیگری فضل ننه تا به هم دیگر مشغول شوند و همگان اطاعت تو خواهند کرد. بروشنی همان راهکار تفرقه بیانداز و حکومت کن به سفارش عرستو و فرمان اسکندر در ایران شهر پی گرفته شد. ابن بلخی هم مانند سعالبی دریافت که نبود یک دولت مقتدر و متمرکز در ایران شهر رمز چیرماندن بر ایرانیان و ناتوان نگه داشتن آنان است، بر پایه بندهش انوشیروان به خاطر پیروزی‌هایش در نبرد با هپتالیان، ترکها و رومی ها و همچنین به دست آوردن یمن، دستور ساخت سکه هایی با این ها را داد. ایران شهر بیبیم شد و ایرانیان نیرومند شدند. برگرداندن آرامش به ایران شهر و چیره شدن بر آشفتگی‌های های برامده از همسایگان خابری و باختری و همچنین پایان دادن به آشوب های خیزش مزدکیان انوشی را در جایگاه شاه ایران شهر از دور کردن خطرها و تهدیدهای همه سویه نموده بود. گور پس از شکست دادن خاقان ترک که به خراسان دست اندازی کرده بود چکامه ای سرود و چامه او چنین بود. زمانی که لشکر او را پراکنده کردم به خاقان گفتم که گویا قدرت بهرام را نشنیده بودی من نگهبان همه ملک ایرانم و ملکی که نگهبان ندارد به چه کار آید بهرام چوبین سردار برجسته یسر ساسانی است که نخستین فرمانده سپاهی است که در آن دوره بر علیه شاه میشورد و پس از گریختن خسرو پرویز تاج شاهی بر سر میگذارد و پس از بازگشت خسرو به ایران با نزدیکان خود به پناهندگی نزد خاقانه می سپس با دستیسه همسر خاقان ناجوان مردانه از میان میرود در هنگام مرگ به سپاهیانش و خواهرش سفارش می کند تا پیکر او را به ایران زمین برگردانند و کاخش را در ری ویران کنند. کاخی که بر پایی آن به گونه ای از خودمختاری و بیعتنائی به دولت ساسانی تعبیر شده بود. پانویس هرچند هدف بهرام تشکیل دوباره حکومت ملوک و توایفی نبود و تاجگزاری وی در تیسفون نشانه از اراده او برای تغییر دولت شاهی، ولی نگه داشت دولت متمرکز بود پیامد شورش وی بر علیه ساسانیان میتوانست به گسیختگی شیرازه کشور و برهم خوردن موازنه قدرت در ایران شهر بینجامد که البته این گونه هم شد. بر این بوم دشمن ممانی دیر که رفتیم و گشتیم از گاه سیر مرا دخمه در شهر ایران کنید به ری کاخ بهرام ویران کنید اینجا بهرام چوبین از برخواستن بر علیه یگان دولت ایران شهر و راه انداختن جنگ درونی در کشور ابراز پشیمانی میکند سفارش وی به ویران کردن کاخ بهرام کنایه از کنار زدن قدرت ها و دولت های محلی و ابراز وفاداری به پایتخت کشور و تنها دولت مشروع آن است. چند دهه پیش از وحرام گور شاپور دوم در پی پیروزی بر امپراتور روم و در بند کردن او وی را به خاطر دست اندازی به ایران شهر ویرانی کشتار و سیر کردن خانباده های ایرانی نکوهش می کند. شاه مقتدر ایران در پی کینخواهی ایرانیان و نگهداشت آبرو و سرفرازی کشور نکشتن امپراتور را مشروط به جبران همه خسارت ها و ویرانی ها می و در برابر از میان رفتن هر ایرانی خواستار کیفر دیدن ده رومی می شود به گفت ای بد بد هنر چرا کردی این بوم زیر و زبر کنون هرک بردی از ایران اسیر همه باز خواهم تو ناگزیر. دگر خواسته هرچ بردی به روم نبادا که بینی تو آن بوم شوم همه یک سر از خانه باز آوری بدین لشکره سرفراز آوری از ایران دگر هرچ ویران شده است کنام پلنگان و شیران شده است سراسر براری به دینار خیش به یابی مکافات کردار خیش. دگر هرک کشتی از ایرانیان به جویی به روم از نژاد کیان به یکتن ده از روم تاوان دهی و آن پس فراوان گروگان دهی. این اقتدار و سربلندی ایران شهر که در یکی از برجسته ترین جایگاه اندیشه سیاسی ایران کوهن یعنی شاهنامه به چشم میخورد در رامه تنصر به پاچاه تبرستان درباره وضعیت ایرانیان در پیش از حجوم اسکندر یعنی دوره هخمانشی نیز بسیار زیبا و آشکار گنجانده شده است. آسوده و آرامیده بودیم و محسود اهل جهان و فرمانروای روای هفت اقلیم، اگر یکی از ما گرد هفت کشور آمدی، هیچ آفریده را از بیم شاهان ما زهره نبود که نظر بی احترام بر ما افکند. اقتدار ایران شهر و امنیت شهروندانش و که در درازای دولت سلوکیان حتی تا اندازه دولت اشکانیان به زوال رسیده بود مورد اشاره تنسر است. افسوس وی از کمجان شدن ایران شهر و ناتبانیش برای دستیابی به روزهای خوش گذشته در این گزاره به روشنی به چشم می‌آید. هستی ایرانی شامل دو رویه یا دو پاره در درصده گذشته بوده است یک روی آن تمرکز کوشش های آبادگری و تدبیر امور کشور طرح و برنامه هدایت شده از قدرت مرکزی رونق کشاورزی امنیت راههای بازرگانی افزایش ثروت ملی بالارفتن تولید صنایع. پایداری اجتماعی ولی از سوی دیگر سرکوب های مخالف و کنترل فکری جامعه بوده است دوره‌های شاه عباس صفوی و شاهان پهلوی از این دست بودند روی دیگر عدم تمرکز پخش بودن قدرت هرج و مرج درگیری نابودی، تجاوز، کشتار و غارت، پسرفت، انحطاط شهری، کاهش جمعیت و قطع شدن راههای بازرگانی و رکود شدید اقتصادی بوده است. بیشتر دوران هزار سال گذشته تاریخ ایران کمابیش به این رویه هستی ما تعلق داشتند. نگرش بزرگان ایران شهر همواره به یک پارچگی و اقتدار دولت با حساسیت بوده است. ایران سرزمینی است مشاع میان همه ایرانیانی که در هر گوش و کنار آن زیست می‌نمایند. مردمش همچنان که از نعمات آن در سراسر سرزمینش بهره می شوند، در رنجها و پیش آمده در هر سامان و استان آن نیز شریک و همراهند. در این چنین کشور تاریخی، حاکمیت یعنی سوبرنیتی و حکومت یعنی گابرمنت بخش پذیر نیست. سازشکاری و نداشتن قاطعیت در این زمینه می تواند به فروپاشی کشور در پی تحرکات بیگانگان بیانجامد. شایست سالاری سرآمدگرایی یا عوامگرایی تاریخ و ادب ایران زمین پر است از سفارش به نسپردن تدبیر امور کشور به عوام همچنان که هم است از اندرس هایی بر پایه نکردن کارهای بزرگ به فرومایگان و حتی میان مایگان. هرگاه ایرانیان از این سرآمدگرایی و نخبه سالاری دور شدند کار کشور به زوال و ویرانی کشید حتی فرهیختگان روزگار کهان رفتار و کرداری که انسان باید در برابر عوام از خود نشان دهد را متفاوت با رفتار و گفتار آدمی در برابر نخبگان میدانستند. در ادب صغیر از ابن مقفع یا روزبه دادبه بر برخاتمند است که مردم را در دو طبقه جدا قرار دهد و برای هر طبقه پوششی جداگانه بپوشد برای طبقه آمه باید که در هر سخنی که میگوید و هر گامی که برمیدارد پوششی از احتیاط و خودداری پوشد و بیپروایی نکند. لیکن برای طبقه خاصان و نزدیکان باید که پوشش سختگیری از تندور کند و پوششی از انس و الفت و بزلگوی و همزبانی پوشد. گرایش در بکارگیری خردورزان و دانشمندان و پارسایان از همان تاریخ استوره ای ایران شهر رخ می نماید. زمانی که می بینیم فریدون، اهل فضل را حرمتی تمام داشتی و جز از اهل فضل ندیم و همنشین او نبودی. سیرتی بنهاد در عدل و انصاف که از آن پسندیدهتر نباشد. سفارش و وسیعت چهره درخشان سنت سیاسی ایران شهری یعنی اردیشیر پاپکان به جانشینانش خردمند سالاری بود. او می گفت اهد من با آیندگان آن است که مصالح خود به خردمندان سپارند اگرچه کارهای حقیر باشد. سپردن کار به خردمندان نه تنها در کارهای بزرگ که در کارهای خرد هم باید در دستور کار شهریار می بود و این یعنی دوری گزیدن از بیخردان و فرومایگان برای کشورداری و گیتیارایی. اردشیر به پسرش شاپور یکم سفارش می که نه تنها عوام را در پیرامون خود گرد نیاورد تا در تصمیم های کشوری نقش داشته باشند بلکه چشم راستی و درستی نیز از آنان نداشته باشد. به فردا ممان کار امروز را بر تخت منشون بداموز را مجوی از دل آمیان راستی که از جستجو آیدت کاستی نخوسرو پرست و نه یزدان پرست اگر پایگیری سرایت بدست چون این باشد اندازه ای عام شهر تو را جاودان از خرد باد بر این سنت خجسته همنشینی و رایزنی شهریار با شایستگان و اهل خرد در میانه دوران ساسانی نیز در دستور کار شهریار بود. شاپور دوم در عدل چنان بودی که بر فرزند خیش ابقا نکردی و مشیر و ندیم و مونس او کسانی بودند که هم به عقل هم به فضل و زکا و زباندانی و آداب نفس حتی برای ماموریت ویژه نظامی دست چین کردن سپاهیان برجسته از خانواده های آبرومند و خوشنام رمز پیروزی می بود. شاپور دوم برای سرکوب اعرابی که برای چندین سال ایران شهر را غارت کرده بودند و به جان و ناموس مردم دسترازی نموده بودند سه هزار سوار برگزید. هنگامی که به مرز سرزمین های عربی رسیدند، به خیش گفت شما را برگزیدم از بهر آنکه شما معروفان و توانگرانید و از غارت کردن ننگ دارید. نام و ننگ را در پیش من باور پیکار نمایید و سوی غنیمت ننگرید این سخن در ایشان تأثیری عظیم کرد. همگان گفتند فرمان برداریم. به کارگیری افسران و سربازانی که در آن نبرد مهم به جز ناموننگ و, و سربلندی و امنیت کشورشان دلواپسی دیگری نداشتند، کلید پیروزی شماره کم آنان بر دشمن پرشمار بود. اردشیر آنچنان بر کشیدن عوام و برتر نشاندن آنان بر نخبگان را ناپسند و نابخردانه می داند، که آن را همسان با بیداد شاه و یا پولپرستی شاه موجب زوال دولت و سرنگونی آن می انگارد سر تخت شاهان بپیچد سه کار نخستین ز بیداد گر شهریار دگر آنکه که بیسود را برکشد ز مرد هنرمند برتر کشد سه دیگر با گنج خیشی کند بکوشد که دینار پیشی کند بزرگمهر در همین زمین انوشی روان را پند می دهد. بدان گه شود تاج خسرو بلند که دانا بود نزد او ارجمند. به نادان اگر هیچ رای آوری سر تخت خود زیر پای آوری. بی می میگوید که در کتاب آیین آمده است که برتری مردم بر یکدیگر در روزگار جمشید بر سالهای عمر بود یعنی هر که تر بود ارجمندتر بود در روزگار آژیده یا کیا برتری به مالداری و ثروت بود در ملک فریدون، برتری با مالداری و پیشینگی یا سابقه خدمت و در زمان منوچه بر بنیاد اصالت و قدمت بود بروزگار روزگار كیکاووس برتری بر خرد و حکمت بود به روزگار كیخسرو بر دلیری و شایستگی بود به روزگار لهراست برتری به دیانت و پاکدامنی بود و پس از او در زمان پادشاهان دیگر برتری به شرافت ذاتی بود و پس از همه آنان در روزگار انوشیروان برتری به مجموع منش های گفته شده بود بجز دارندگی و بینیازی از مال که انوشیروان آن را به شمار نمیآورد. به نظر میآید که با پخته شدن و بلند شدن اندیشه ایران شهری و فراهم شدن بستر فکری درست برای تعریف فرد شایسته در جامعه شناسایی ویژگان و سرامدان در اسرانوشی روان به بلوغ راستین رسید و مجموعه ای از فروزه های پسندیده ملاک شناخت نخبه در کشور گردید. رایزنی و همنشینی با فرومایگان سرانجامش تباهی کارها و فروریزی دولت است. این نگرش در برخی از چهره های برجسته دوره اسلامی ایران نیز بر جای مانده بود. در سیاستنامه نامه خاج نظام الملک دادن مشاغل مهم دولتی به عوام بی اصل و نسبها و بی فضلان را خلاف داد و موجب فروپاشی جامعه و دلیل بر نادانی شاه و وزیرش می دانست. یکی از آسیبهای جدی که جوامع را تهدید می کنند، عوامزدگی و سرپرستان دولت است. چه این عوامزدگی از روی آمی بودن و سطحی بودن فرمان و کارگزاران کشور باشد و چه به آماج سواستفاده از توده ها و همرنگ شدن با آنها باشد، فروریزی و تباهی کشور را در پی دارد؟ عوامزدگی و عوامگرائی هیئت فارمان کشور از خشونت و تند آن نیز بدتر ارزیابی می شود. برای رعیت شهریاری که از او بترسند بهتر از شهریاری است که از رعیت بترسد. ترس شهریار از رعایت پیامد عوام زدگی است وگرنه شهریار باید به دنبال نیکخواهی همگانی باشد نه اینکه خود به رهبر فرومایگان جامعه فرو افتد این متفاوت است با مهرورزی به مردم و کوشش در راستای نیکبختی آنها داریوش در سنگ نوشته بیستون ای اندیشه برانگیز دارد داریوش داد را تنها جلوگیری از ستم توانمند به ناتوان نمی داند بلکه بد کردن ناتوانان به توانمندان را نیز خود بیداد میداند به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم، نمرا میل است که شخص ناتوان از سوی توانمند بدی ببیند، و نه آن کام من است که شخص توانایی از سوی ناتوان می بیند. همان گونه که نباید دست توانمندان برای سرکوب یا خوردن حق ناتوانان را باز گذارد بر کشیدن فرومایگان بر بلند پایگان و سرآمدان گونهی دیگر از بیداد است اینجا داریوش بزرگ خیش را بیزار از هر دو گونه بیداد میداند اردشیر بابکان در ویتناه سیاسی خیش که دارای نکات ارزنده در پیوند و امور کشورداری و راهبری جامعه است به اهمیت نقش سرامدان کشور برای اصلاح توده و نیکپختی ملت میپردازد. شهریار تا آنگاه که راست آوردن ویژگان را نیاغازد، نباید در اندیشه راست آوردن توده براید. روشن است که ویژگان همان سرآمدان و یا نخبگان کشور هستند. با روشنفکران و یا فنسالاران یا همان تکنوکرات های فاسد و بیمهر به میهن، اصلاح امور کشور و پرورشی مردمی در خور زندگی شایسته نشدنی است. از سوی دیگر خود سرامدان و نخبگان نیز باید خیردمندانه گزینه شوند تا کارهای کلیدی را در کشور در دست گیرند. گوزینش بخردانه ویژگان در هر کاری به گونه‌ای که یکی یک ویژگان بهره و پایه‌ای سزاوار کاردانی خود دریافت دارند تا کارها سزاوارانه و به خوبی سازماندهی و آرایش داده شوند شایسته سالاری تنها محدود به کسان نیست و برگزیدن برترین اندیشه ها و آین ها را نیز در بر می‌گیرد عنوشیروان در پی بررسی سامانهای اجتماعی و اقتصادی دیگر کشورها همچون روم و هند برآمد تا از میان آنها آنچه سودمند و كارآمد است را برای ایران ایرانشهر نیز برگیرد در شیوه های نیاکان از گشتاسپ تا شهریاری قباد نزدیکترین پدر خیش نیک نگریستم و آنچه درست بود برگرفتیم و آنچه نادرست بود از آن روی گردانیدیم و در این کار مهر پدران هرگز ما را به پذیرفتن شیوه های ناسودمند بر ننگیخته است که مهر یزدان و سپاس و فرمانبرداری او را برتر داشته ایم چون از نگریستن در شیوه های نیاکان بیاسودیم از پدران آغازیدیم که سزاوارتر بودند و هیچ راستی را فرو نگذاشتیم و همواره به کار بستیم چه راستی را نزدیکترین خیشاوند یافتیم از آن پس به شیوه های روم و هند پرداختیم آینهای آنان را با سنجه خرد بسنجیدیم و سدوده های آنها را برگزیدیم و از میان آنها بدان چه زیور شهریاری من بود چنگ زدیم و آن را شیوه خیش کردیم و هرگز بدان چه خواهش های درون به سوی آن میکشید نگره بیدیم. رومیان و هندیان را نیز از آن آگاه نمودیم، از شیوهایشان و آنچه خوش نداشتیم به آنان نوشتیم و از آن بازشان داشتیم. جز این که ما کسی را به چیزی جز شیوه و آینش وادار نساختیم و آنچه که خود داریم نیز از آنان دریغ نورزیده با این همه از آموختن آنچه آنان داشتن نیز ننگ نداشتیم چه سرفرود آوردن در برابر راستی و دانش و پیروی کردن از آن بزرگترین زیور شهری آران است؟ به روشنی در این گفتار انوشی روی باز و ذهن آماده به پذیرش اندیشه ها و نگرش های ارزشمند و سازنده دیده می شود. فارق از اینکه که سرچشمه آنان از ایران شهر بوده و یا از هند یا روم. از سوی دیگر پیورزی یا تعصب و خشک اندیشی برای ستایش هر آنچه از نیاکان به ما رسیده است، نابخردانه و نکوهیده است. زمان این ارسیه تاریخی سرمایه به شمار می آید که به گفته یعنو راستی و درستی از آن بیرون آید. در غیر این صورت، زیان و ویرانی به همراه دارد و چه سرچشمش ایرانی و چه هندی می باشد، سزاوار و در نگهداشت و پیروی نمی باشد. به روشنی نگاه شایسته سالاری به جای تود سالاری و یا مردم سالاری در معنای عام آن در اندیشه سیاسی ایران شهری دیده می شود، انگامی که از سپردن کارهای کلان کشور به ویژگان یا همان کارشناسان خردمند سخن می رود، گزینش هیئت فرمانروایی و سرپرستان اداره کشور از جمله آن امور کلان به شمار می رود. پس گزینش دولتمردان رده بالای کشور و سیاستهای آن، باید در دستان نه همه مردم که در دست بخشی از مردم باشد که توان تشخیص صلاح از تباه کشور را داشته باشند. بر این پایه عموم مردم می توانند در تصمیم گیری های روزمر و جاری خیش رأی و نظر بدهند ولی سکانداران رهبری کشور را کاربلدان و آگاهان برمی گذینند. در میان ایرانیان مانند دیگر ملت‌ها بخش نه چندان بزرگی از مردم هستند که تنها به خود و پیرامون محدود خود نمی‌انباشند و نگرانی‌های بیشتری از مسائلی چون گرانی کالا، اجاره مسکن و یا مارک کفش و یا مدل خودرویشان دارند. اینها آن بخشی هستند که در بزنگاه‌های تاریخ در هر کشوری سرچشمه خدمت و شاید خیانت شوند. بقیه ملت یا در بیتفاوتی مطلق به سر برند و یا در هنگام ورود به امور اجتماعی بیشتر نقش سیاهی لشگر را دارا می شوند. بسیار شنیده می شود که مردم خودشان میدانند که چه کنند و چه نکنند. مردم بسیار هوشیار و آگاه هستند. این سخن گرچه نمای زیبایی دارد ولی در عمل چه معنی دارد؟ کدام مردم در اینجا مورد نظر هستند؟ به گفته زنده یاد داریو شومایون آیا می باید منتظر مانده ترین لایه های جمعیت از جمله آن چند میلیون قربانی فساد اجتماعی بنشینیم یا گوش به روشنترین ترین اناصر جمعیت بسپاریم و چاره را در بحث‌ها و تلاش‌های آنان جستجو کنیم؟ آن بخش کوچکی از مردم که می دامنه گسترده تری از پیرامون کوچک بسته خیش را ببینند، در سرنوشت کشور تاثیرگذار و تعیین کننده خواهند بود. در یک فرهنگ سیاسی استبداد زده که از سویی به فرمانبری کورکورانه از حکومت و از سوی دیگر به دشمنی بیمنطق با همه چی و همه کس گرفتار است، منظور از حوال دادن همه چیز به مردم و آرای آنان چیست؟ نخست آیا مردم فرصت برای خودسازی، مطالعه، رشد فرهنگی و بالندگی منش در یک فضای سطحیگرا و یا خیرت ستیز را یافته اند تا صاحب نظر شوند و در تعیین سرنوشت خود و نصهای آینده دخیل شوند؟ برای مردمی که برای فراهم نمودن نیازهای پایی خانواده و پرداخت حزینه های کمرشکن زندگی نه زمانی و نه توانی برای پرداخت به مقولههای جدی در پهنه اندیش و اخلاق دارند و میانگین سرانه سالانه مطالعه آنان بیش از هفت دقیقه نیست سخن از دیدگاه مردم و ریانان اگر عوام فریبی نباشد بیگمان عوام زدگی هست. چرچیل نخست وزیر نامدار بریتانیا می گفت اگر می خواهید از دموکراسی ارزیابی واقع بینانه داشته باشید کافی است با یکی از هزاران رأی دهنده در همه پرسی پنج دقیقه گپ بزنید از سوی دیگر هر طیف و گروه فکری دیدگاه مردم را همسو با دیدگاه خودشان میدانند. مردم تا نظرشان دانسته نشده است، تعبیری انتظایی هستند و آرای آنان پیشبینی پذیر نیست. درست آن است که هر کس سخن خود را بگوید و خیشتن را نماینده همه مردم نداند. در یک جامعه، لایههای گوناگون اجتماعی و فرهنگی در کنار هم و در کشاکش با هم هستند و همه آنها هم مردم به شمار می آیند. درست است که لایههای فرهنگی پایین اکثریت دارند ولی یکم اکثریت داشتن آنها وجود اهمیت و نیاز به دیگر لایه ها را نفی نمی کند و دوم آن اکثریت ناگزیر نیست هم به همان حال نگه داشته شبد. آدمی رو به رسایی و کمال دارد. مردم باید با آن درجه از آگاهی برسند که هم بخواهند هم بتوانند بالاتر روند. این خیشکاری لایه‌های فرهنگی بالاتر است و در اینجاست که اهمیت بحث عوامگرایی و سرآمدگرایی بیشتر روشن می‌شود. گورویدال نویسنده پرآوازه آمریکایی که در سال 2012 درگذشت می‌گوید که امروزه سخنرانی‌های رؤسای کشورها و گردانندگان سیاسی جوامع را برایشان می‌نویسند. حالا این به کنار در شگفتم که میبینم اینها می متن آن سخنرانی ها را از رو بخوانند در دموکراسی های امروز رای دهندگان گرایش دارند که نمایندگانشان در رده سواد و شعور خودشان باشند سرآمدگرایی امروزه کمتر هواخواه دارد مردم آسان پسند و سطینگر در کارهای پایه‌ای کشور در گزینش دولت و در قانونگذاری نیز کش سلیقگی خود را به نمایش می‌گذارند. بنابراین این به جای شایستگان و کاربلدان، رهبری جامعه به دست میان یا کمایگان میافتد، می‌افتد. اصولا نخبگان حتی دیگر نامزد سرپرستی دستگاه دیوان سالاری کشور هم نمی‌شوند. دسترسی نامحدود تودهها به آگاهی قربال شده و هدفمند چیده شده از سوی رسانه های پرشمار جهتدار مردم را در جهان آسان پسند، سطحینگر و تا اندازه مبتزل پسند کرده است. این را از مقایسه ساده موسیقی، فیلم و حتی پوشاک این زمان با دهه گذشته میتوان دریافت. تفسیر و آنالیز جرف و سنجیده و اندیشیدن بر روی جستارهای بنیادی و تأثیر گذار جای خود را به پرگویی و بیهودگویی پیرامون موضوعات پیش و پا افتاده داده است. پهلوانان، سرآمدان و نخبگان تاریخ و هماسه ملی در گذشته کوهن در تاریخ حماسی ما، نهاد پهلوانی نمود آن رده ویژگان در سپهر سیاسی و اجتماعی روزگاران بود. نهاد پهلبانی که خیش را پاسدار ایران شهر و کانون یکپارچگی آن، یعنی سامانه شهریاری میدانست به هنگام تندی و درشتخوی شاه در برابر اومیز داد و استقلال خود را به او یادآوری می نمود. آنچنان که رستم، در پاسخ به درشتگویی هایی که کاووس میگوید چخش شاه کاووس کیست چرا یازد به من توس کیست پیش از آن رستم نماینده نهاد پهلوانی در واکنش به تهدید کاووس یعنی نهاد شاهی در بردار کردن رستم سزاواری ویرا برای شهریاری ایران به پرسش می کشد تهمتن برآشفت با شهریار که چندین مدار آتشن در کنار همه کارت از یک بدتر است تو را شهریاری نه اندر است دیگر پهلوانان شاهنامه نیز در برهای از زمانها همزمان با نیک خواهی و مهرورزی به شهریار در برابر خیرسری و تندروی های وی میز دادند و نشان میدادند نه خود شاه که نهاد شاهی را دارای ارج و جایگاه ویژه ای این پهلوانان غیرمستقیم تعدیل کننده قدرت شهریار در کشور بودند و به انجام موازنه نیروها در پهنه سیاسی و سپاهی کمک می‌نمودند. در های تاریخی پهلوانان برای نگاهداشت کشور و برای آسودگی ملت با هماهنگی با یکدیگر پا به میدان میگذاشتند و سررشتهٔ کار را در دست میگرفتند تا کشور را از بحران گذر دهند اینان با گرفتن تصمیمات درست در زمانهایی با تعیین جانشین به جای شاه مرده و یا جایگزین نمودن شاه بیدادگر با جانشینی شایسته در بازگرداندن پایداری آرامش به کشور نقش چشمگیری ایفا می نمودند. نمونه های آن کوشش های رستم در نجات کیکاووز، در مازندران و هاموبران و همچنین بر تخت نشاندن زو پس از کشته شدن نوزر شاه بود. هنگامی که پس از گریز و پرویز از ایران و نبود شهریار و تخت شاهی بهرام چوبینه بزرگان را به رایزنی برای تعیین سرنوشت کشور و پادشاهی احتمالی خودش فراخواند دبیر خردمندی که شور بهرام چوبینه را برای نشستن بر تخت شاهی دیده بود گفت نیکوست این دانش و رای تو به کجی خرامت همی پای تو بسی بود که بیکار بود تخت شاه نکردن در او هیچ که تر نگاه جهان را به مردی نگه داشتند یکی چشم بر تخت نگماشتند نبودند یازان به تخت کیان همی بندگی را کمر برمیان بدین سان آن دبیر فرزانه به بهرام چوبینه یادآور میشود که پیش از او سرداران و سپه سالارانی که در جریان برخی روداتهای سیاسی تخت شهریاری را بی صاحب دیدند، به بازگرداندن آرامش به کشور و رسیدگی به کارها کوشیدند بدون آن که چشم آزمندی به تاج شاهی داشته باشند. هنگامی که سخن از سرآمدان و بلند پایگان می رود، منظور تنها خردمندان و حکیمان کشور نیستند، بلکه دلاوری و گذشت نیز نخبگان را از دیگران برتر می نشاند. نمونه های از بودن رادمردان و بزرگمنشان در دستگاه دولتی و سرپرستی شهرها در پایان دوره ساسانی به چشم می آید که نشانگر آن است که این سنت پسندیده سپردن کارها به بزرگواران به هنگام لازم چه زیبایی ها و حماسه هایی را در تاریخ کشورمان آفریده است در یورش اعراب مسلمان به ایران و در هنگام محاصره شدن شهر سرخص در خراسان پس از ایستادگی جانانه مردم شهر برای زمانی دراز فرماندار شهر زادویه پذیرفت که شهر را تسلیم نماید به شرط آنکه مسلمانان دستکم 100 نفر از مردان شهر را زنده بگذارند فرماندار جوان مرد و فداکار نام خود و خیشابندانش را در فهرست سطنی که جانشان باید در امان می بود، نگنجاند تا در روز بلا و سختی همشهیانش را تنها نگذارد. بدین گونه عرب مسلمان وی و دیگر مردان شهر را که هنوز زنده مانده بودند به استثنای سطن را کشتند. رویدادی تقریبا همانند با این رخداد از شوشتر در خوزستان گزارش شده است. در آنجا پس از اینکه پدافند کنندگان شهر از پای افتادند و بزرگ شهر شاپور پسر آزرماهان ناچار به کنار آمدن با عراب شد، فهرستی ده نفره که می توانستند از عرب مسلمان اما نام دریافت کنند از سوی شاپور به فرمانده سپاه اسلام داده شد که نام خود شاپور در آن نبود. به فرمان ابو موسا عشعری فرمانده سپاه اسلام گردن شاپور را زدند. سرنوشت اندیشه سیاسی ایران شهری پس از اسلام سال نخست پس از اشغال ایران شهر توسط عرب مسلمان نخست به برخوردهای سپاهی میان ایرانیان و مهاجمان گذشت و سپس در پی آن شورشهای ملی دینی در جاهای از ایران زمین به ویژه در خراسان بزرگ و فرارود رخ داد. پس از سپری شدن تلخی شکست از مسلمانان و مرهم گذاشتن بروی زخمهای کاری پیش آمده از این رویداد در صده های و دهم ده میلادی، نوزایش شعر و ادب پارسی، بازنگری و بازنویسی هماسه ملی یعنی شاهنامه و بازیابی دامنه ای ایران شهر نشانه آشکاری از پدیدار شدن خداگاهی ملی بود. همواره در چنین شرایطی ایرانیان دریافت خود از پیش آمدن بحرانی ژرف را به جرفای خداگاهی دگرسان کردند. یک بار پیش از آن در میانه دوران اشکانی، گردآوری اوستا و پردازش حماسه یادگار زریران واکنش خداگاه ایرانیان به یونانی معابی و بحران فرهنگی پدید آمده از آن بود، نزدیک به یک هزار پس از آن خداگاهی ملی خود را در جریان شاهنامه نویسی نشان داد و در شاهنامه فردوسی به فرازی دست نیافتنی رسید. تا صده دوازده میلادی زبان فارسی برکشنده ی های ملی و اندرس های بزرگان درباره کشورداری بود و این گونه فرهنگ ایران شهری شامل خرد، داد، آبادسازی و بنمایه های منش ایرانی، همچون شادزیستی، دهشمندی، رواداری و آزادگی به نسهای از راه رسیده شناسانده میشد. از آن پس تنها اندرزنامه ها جلوگاه زبان فارسی برای بیان فرهنگ ایران شهری به ویژندیشه سیاسی آن بوده اند ولی شعر تا به راهی دیگر رفت. چنین می نماید که بازگویی اندرس‌های ایرانی همچون داستان‌های بزرگ مهر و مهروانوشیروان در کانون خلافت جهان اسلام و دربار‌های ناامن سلاطین ترک تبار دوره اسلامی دستاویزی برای یادآوری و برکشیدن ارزش‌هایی چون داد و خیرد در شیبه زمامداری و فرمانروایی بوده است. ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که مسلمان شدنشان به عرب شدنشان نیز انجامید، عرب نشد. اندیشه های ایران شهری که در ساختار شعر و نصر فارسی زنده نگه داشته شدند، شاید استوارترین سنگر پایداری تبار ایرانی در آن صدها بود. بدین گونه زبان فارسی سپر پدافندی هویت ایرانی در برابر آفند عربگرایی و ایرانزدایی گردید. در صده های سیزده و 14، ترکان سلجوقی در ایران به قدرت رسیدند. تقریبا از آن پس فلات آناتولی یعنی بیزانس پیشین و ترکیه پسین با آرامی ترک زبان شد در حالی که ایرانیان ترک زبان نشدند و زبان ملی خود را نگه داشتند. اگر زبانی در برگیرنده و منتقل کننده ای نباشد، نمیتواند پیوستگی و مندگاری داشته باشد. زبان پارسی که در ایران پس از اسلام از خوراسان بزرگ روان شد و سراسر ایران را فرا گرفت بر جای ماند چون اندیشه ایران شهری را در خود به همراه داشت. زبانی که اندیشه را بیان نمی کند، حتی اگر برای زمانی هرچند بتواند در برابر زبان مهاجمان استادگی کند، نمی تواند پایدار بماند و کارای خود را نگه دارد. آنچه در برابر عرب مابی دستگاه خلافت عموی و در مقاطعی هم خلافت عباسی پایداری کرد اندیشه ایران شهری بود که پس از کنار رفتن زبان پهلوی در بافت زبان فارسی که نقش شگفتانگیز در ماندگاری ایران ایفا کرده است بیان گردید در درازای صداهای های تا هیجده پارسی زبان فرهنگی و درباری هند، عثمانی و سلطان نشین ازبک در فرارود بود، در حالی که همزمان با این عثمانی ها و ازبک های سنی مذهب دشمنان سرسخت صفویه شیعه مذهب بودند. گرچه زبان سپاهیان قزلباش صفویه ترکی و زبان آخوندهای وارداتی از جبل آمل لبنان عربی بود، ولی شعر و عدب فارسی در قاره هند، فلات آناتولی یا ترکیه کنونی و آسیای میانه ابزار نخبگان و سرامدان جامعه برای بیان اندیشه ها و احساساتشان بود. پانویس درباره ترک زبان شدن آذربایجان و اران که استثنایی بر این قاعده است، پژوهشگران کارهای ارزنده ایرانی اند که از حوصله این کتاب بیرون است. در پاره زمانها جلوگاه دیگری از اندیشه های ایران شهری در زبان فارسی افزون بر اندرزنامه ها شعر فارسی بوده است و هرچند این بدان معنا نیست که نصر فارسی در این زمینه کم اثر بوده است و البته بدان معنا هم نیست که همه شعر فارسی در برگیرنده فرهنگ ایران شهری است در صده های ده تا 15 میلادی ادب پارسی جایگاه اندیشیدن تبار ایرانی شد و ایرانیان در شعر پارسی اندیشه خود را بیان کردند سرآمد این موارد شاهنامه فردوسی بود که میراث خردورزی، دادخواهی و منش ایران شهری از دوران باستان را به شکل سروده‌های شورانگیز و اندیشه برانگیز به نصح های پرشماری از ایرانیان ارمغان نمود حامی سروده بودن و داستانی بودن شاهنامه میلیون‌های ایرانی را در این هزار سال خواننده و خواننده‌اش نمود در حالی که دفترهای فلسفی و های اخلاقی و سیاسی در این صده ها خانندگان و هواداران بسیار کمتری داشتند حتی دیوان حافظ نیز با روشی متفاوت از شاهنامه در همه این 700 سال گذشته در انتقال برخی از های ایران شهری نبوده است حافظ به زیبایی سرو که درخت نمادین و سپنتایی در فرهنگ ایرانی است را در های مینوی ایران کهن می‌نگرد و در این باره زبان پهلوی را ابزار دریافت آن آموزه‌ها میشناسد. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی می‌خوان دوش درس مقامات معنوی او یکی از ویژگی های اندیشه سیاسی ایران شهری را سالاری سالاریست به زیبایی در چامه های خود باستاب می دهد. خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی تا نشینت هر کسی اکنون به جای خیشتن. سعدی شیرین سخن به گیتی به چشم یادمان ارزنده بزرگان ایران زمین می نگردد و سلاتین زمان خیش را متوجه زیست نخبگان و ویژگان تبار ایرانی در گذشته می نماید. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و روی تن اسفندیار تا بدانند این خداوندان قوم که خلق بسی است دنیا یادگار. شیخ عجل آتش آتشکده را به مسابه گرمای درونی جان و روان ایرانیان مینگارد و آن را بلای جان دشمنان میداند نرنجم ز خسمان اگر بر تپند که این آتش پارسی در تبند. نظامی به میان بودن ایران شهر در هستی که ریشه در متون کهان داشت اشاره می کند و باور خود به برگزیده بودن این سرزمین را بی پروا به زبان می آورد. همه تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل چون که ایران دل زمین باشد دل زتن بهبود یقین باشد. نظامی در روزگار این چنین شورانگیز و شیفته بار از ایران میگوید که ایران از روی نقشه جغرافیا ناپدید شده و هستی خود را تنها در یاد و جان ایرانیان پی میگیرد ناصر خسرو قبادیانی آموزه آزادگی که ریشه در منش ایران شهری دارد را در بی به زورمندان روزگار خیش بیان می کند و مرواریت های زبان پارسی دری که ستونی از شناسه است را بالاتر از آن می داند که برای فرومایگان هدر نماید. منانم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را. منوچهری امید میدهد که روزگار سختی از فراز ایران میگذرد و دیگر بار کشور روی آسایش و خوشی را میبیند. زود شود چون بهشت گیتی ایران بگذرد این روزگار سختی ایران. اینجاست که زبان پارسی در نقش پلی میان ایران, ایران کوهن و ایران پس از اسلام به کار آمد. در این میان فردوسی شکوه کوهن را به شعر آراست. این نقش چنان مهم است که میان جوزف هامر هامرپورگشتال و هگل دو فیلسوف بزرگ آلمانی گفتگویی پیش میآید که آیا فردوسی با سرودن شاهنامه توانست بنیاد دولت ایرانی را بگذارد یا نه؟ در همه درازای تاریخ پس از اسلام ایران، در کنار اسطوره ها، حماسه های ملی، آین های ایرانی و زبان پارسی یادمان ها و یادگارهای های ایران پیش از اسلام نیز همبستگی و همدلی دیرینه ایران که در میان اهالی فلات ایران پدید آمده بود را پیوستگی داد. خاقانی شروانی که از ایرانیان قفقاز نشین بود، در سوی ایران باستان بر ویرانه های ایوان کسرا در تیسفون مدائن اندوه می سراید. هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مداین را آینه عبرت ای دان بر من خندی كیینجا چه میگرید گریان بر آن دیده كیینجا نشود گریان خود دجله چنان گرید صد دجله خونگویی که ك از گرمهٔ خونابش آتش چکد از مژگان گهگه گه به زبان عشق آوازده حیوان را تابو که به گوش دل پاسخ شنوی زیوان گوید که تو از خاکی ما خاک تو مکنون گامی دو سه برمانه اشکی دو سه هم بفشان آری چه عجب داری کندر چمن گیتی جغده است پی بلبل نه است پی الهان ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر تا خود چرست خزلان. و هنگامی که گذر شیخ بلخی به برج و باروهای ویران شده توس خراسان که به گونهای پای تخت ایران است می افتد با افسوس می دوشم گذر افتاد به ویران توس دیدم جغدی نشسته جای تاووس گفتم چه عجبداری از این ویرانه گفتا خبری است که افسوس افسوس حس سوز و گداز، سرگشتگی، افسوس و خسران در واژگان خاغانی و شهید بلخی آشکار است یکی ایران کوهن را تاووس می و دیگری بلبل و هر دو عصر همروزگار خیش را جغد می انگارند. منوچهری آرزوی بازگشت آرامش و شکوه گذشته ایران را دارد و از ویران شدن معنوی و مادی ایران شهر اندوکین است زود شود چون بهشت گیتی ویران بگذرد این روزگار سختی ایران استاد توس نیست که در بیان درد جانکاه افتادن از فراز به فرود برای یک ملت تاریخی پیشتازه است با کنایه ای میگوید می است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود همه جای جنگی سواران بودی نشستنگه شهری آران بودی کنون جای سختی و جای بلاست نشستنگه تیز چند با ورود کامل به دوره اسلامی تاریخ ایران اندیشه سیاسی ایران شهری به گوشه ایرانده می شود و ایران در آشوب زمانه صده های هفتم تا یازده میلادی را می پیماید به غیر از جلوهگاه زبان فارسی که در بالا درباره آن گفتگو شد، نمودهایی از اندیشه ایرانیان باستان در بزرگان فلسفه و حکمت ایرانی نیز پدیدار شد. خبرنه یا همان فر و فروغ مفهوم بنیادین حکمت اشراق سهروردی است و از این رو پیدایی حکمت اشراق را باید به عنوان یکی از نقاط عطف پیوستگی اندیشه ایران شهری در دوره پس اسلامی ایران بررسی نمود سهروردی خیشتن را دنبال روی فرزانگان ایران از جمله زرتشت، جاماسپ، فرشوشتر و بزرگمه میدانست او در دفتر کلمت و تصوف خود را زنده کننده اندیشه حکیمان پارس می شمارد. اندیشه فلسفی صحروردی که بر پایه نور یا اشراق بیان شده در اندیشه سیاسی او با عنوان فر ایزدی یا فر کیانی یافته است. بدین گونه صحروردی را می توان بزرگترین مفسر مفهوم فر کیانی در دوره اسلامی دانست. این چنین وی به بازیابی حکمت خسروانی شاهان آرمانی ایران باستان پرداخت. این حکمت خسربانی به راستی همان فرزانگی باستانی ایران شهری است که شاه آرمانی در کانون اندیشه آن جای دارد. از سوی دیگر، هنگامی که بیشتر دانشمندان ایرانی در صده های 11 تا 14 میلادی کارهایشان را در زمینه فلسفه، ستار شناسی و پزشکی به عربی که زبان دانشی روزگار بود می نوشتند، اندیشمندان همان روزگار، اندرزنامه هایشان را به فارسی مینوشتند زیرا آنان مخاطب این نوشتارها را سلاتین و امیران و سرداران غیر عربیدان و در اون مایه این نوشته ها را رگههایی از اندیشه سیاسی ایران شهری که باید برای دولتمردان نوشته شود می‌دانستند با به گوش رانده شدن اندیشه سیاسی ایران شهری در دوره اسلامی نهاد وزارت یگانه نهادی بود که گاهی با نیم نگاهی به مسائل ملی پیگیر سیاست خیرهمگانی همگانی بود و سلطنت را که جانشین نهاد شاهی گذشته بود به فراهم نمودن و نگه مسائل وادار می نمود. نقش وزارت در مهار قدرت و در تدبیر کارهای کشور از ایران باستان به میراث مانده بود. ولی در دوره اسلامی با سلطان شدن شاه، اهمیت این نهاد برای تعدیل خودکامگی سلطان و مساحت اندیشی کارهای ملک و ملت حساس تر شد. برای نمونه جواد تبا سیاستنامه سیاست نامه نظام توسی را نوشتهی در راستای اندیشه سیاسی ایران شهری می داند. جنبه هایی از نقد از وضع آن روزگار و به ویژه از کارکرد سلطان و دولت ترکان که در جاهایی از کتاب سیاستنامه اشاراتی به آن را می توان پیدا کرد، دلیلی بر این مدعاست که خاج نظام در دیدگاه و کاربرد به عنوان نماینده تبار ایرانی در دستگاه دیوانی کوشش می کرده است. سکوت او درباره دستگاه خلافت یعنی اینکه آن نهاد چنان بیره است که از روزن اندیشه سیاسی شایسته بررسی نیست. نشانگر این است که خاجه در سیاست خلافت را دارای حقانیت نمیدانست. دانست. طبع همچنین خاجه نظام الملک را خواهان حکومت یک پارچه و متمرکز و بسان ساسانیان می داند که ویژگی دیگری از اندیشه سیاسی ایران شهری است. خوجه از دشمنان سرسخت جریان‌های واگرا و استقلال ترب که کنش آنان به پراکندگی سامان کشور می‌انجامید به شمار می‌آمد. وی می کوشید تا با پشتوانه جایگاه سلطان سلجوقی و سایر نهادهای تمرکزگرا از قدرت قبایل ترک و ترکمن گراینده به گریز از مرکز بکاهد. اندک شماری از فرمان روایان پسین همچون شاه عباس صفوی با ایجاد ارتشی به سامان که در برگیرنده تیره های ایرانی بود و گماشتن چشم و در سراسر ایران برای آگاهی یافتن از کارهای کشوری راهی را که نظام ملک سفارش کرده بود پیمودند. تا برآمدن رضاشاه شاه در صده بیستم چه در پهنه دیدگاه و چه در دامنه کاربرد دوره معینی را از برکشیده شدن فرهنگ ایران شهری در این هزار سال گذشته سراغ نداریم. اگر سردار تاجوری چون نادر با فداکاری و شایستگی ایران شهر جغرافیایی را زنده نمود به دلیل نبود نگاه آبادگرانه و خردمندانه فرحمندی را که نیاز شهریاری آرمانی ایران شهری بود از خود نشان نمیداد. در عصر رضاشاهی، گامهایی برای نوزایش ایرانی برداشته شد که گرچه بسنده نبود ولی بر پایه ابزار و شرایط زمان در خور ستایش و دلگرمی بود از ساخت بناهای تازه با نمادهای ایرانی تا پارسیگویی و پارسی در آموزشگاه ها و ارتش و از اعمال حاکمیت ملی بر گوش و کنار کشور تا پیش گرفتن سیاست خارجی بر پایه استقلال کشور از بیگانگان میشد بیدار شدن وجان ملی برای برکشیدن ایران شهر را آشکارا دید. خوش درخشید ولی دولت مستجل بود. این دوره با وجود کتاهیش که به 20 سال هم نرسید چوله هایی برفروخت که در گرمایش فرهنگ ایران شهری پر هوادار و دارای پایگاهی نیرومند برپا ماند. زوال اندیشه سیاسی در ایران فریدون آدمیت می نویسد در تعقل تاریخی تاریخ جریان است در توالی حوادث حوادثی که نه در خلق وقوع می آبند. و نه اسرار را هر حادثه تاریخی حادثه تاریخی دیگری را به دنبال می‌آورد تنها از این نظرگاه است که قضیه و واقعه‌ای می‌تواند محتوم و پرهیز ناپذیر باشد وگرنه هیچ واقعی اجتناب ناپذیر نیست این پیشگوفتی بود برای آنکه یادآور شویم آنچه امروز درو می‌کنیم پیامد آن چیزی است که دیروز کاشتیم اگر امروز در بیشتر دامنه ها ملتی گرفتار و شرمسار هستیم به دلیل کمکاری و بدکاری پیکر ملی ما در صده های گذشته و به ویژه در چند دهه گذشته بوده است. هیچ رویدادی اشتناب پذیر نبوده و هیچ رخدادی بر پیشانی سرنوشت ملی ما نوشته نشده بوده است. هر افت و زبالی علت یا علل مشخصی را داراست. رویداد تلخ و یا شیرین تاریخی ناگزیر در همان نقطه که احتمالا در درازای چندین سال پیش از آن بزرش پاشیده شده و نموف کرده است. هنگامی که شرایط بیرونی و درونی یک مجموعه همسو و هماهنگ بیننده یک رخداد بزرگ و تأثیر گذار خواهیم بود. بر این پایه حتی فروپاشی ایران ساسانی و چیرگی عراب مسلمان بر ایران زمین نیز اجتناب ناپذیر نبود و سرنوشت ایران و ایرانی از پیش رقم نخورده بود. پراکندگی و همدل نبودن بزرگان ایران سرچشمه اصلی فروپاشی ایران ساسانی بود. باندازی اختلاف و چند دستگی در پایان دوره ساسانیان به ویژه در سالهای تازش عرب به ایران آشکار و برجسته بوده است که درباره آن در مقدمه شاهنامه عبو منصوری که یکی از کهن‌ترین نوشت‌های زبان پارسی است این گونه سخن رفته است چهارم گروه ساسانیان بودند و اندرمیان گاه پیکارها و داوری‌ها رفت از آشوب کردن با یکدیگر و تاختن‌ها و پیشی کردن و برتری جستن که از پادشاهی ایشان این کشور بسیار تهی و بیگانگان اندر آمدندی و بگرفتندی این پادشاهی چنان که بگاه جمشید بود و بگاه نوذر بود و بگاه اسکندر بود و مانند این افسوس و اندوه نویسنده پیشگفتار شاهنامه ابو منصوری از این پراکندگی، آشفتگی و خودخواهی در این چند سطر بسیار روشن است. ولی آنچه مهم است بیان علت فروریزی کشور می باشد که بر دیدگاه نویسنده نسرنوشت، چرخ و فلک و دست روزگار قدار یا جبر تاریخ که رقابتها ها، رشکا و تفرقه های موجود میان ایرانیان دارای نفوز در آن روزگار بوده است. زوال اندیشه سیاسی در ایران جدای از سراشی به سراسری اندیشه برزی در ایران نبوده است. کمرنگ شدن فرهنگ ایران شهری در پهره زمین ورشکستگی همه سویه مردم این سرزمین گسترده را به همراه داشته است. با همین نگاه و روی کرد زوال اندیشه سیاسی و پیامده آن پسرفت کشور را در همه زمینه ها به دنبال داشته است. گرچه موجبات فساد و تباهی در کشورداری و ملکارایی که شما رو پیچیده هستند ولی نویسنده این سطور موارد زیر را علل برجسته بگل نشستن اندیشه سیاسی و پیرو آن نبود تدبیر در کشورداری و سرانجام زوال نسبی کشور در هزار سال گذشته میداند یکم پیدایش سلطنت به جای شاهی ورود قبایل ترک آسیای میانه به ایران که پیش از دستیافتن سلطان محمود قزنبی به قدرت آغاز شده بود با رسیدن های دیگر ایلات ترک و ترکمن قفچاقی و قوز پی گرفته شد. از آمیختگی نگاه ترکی مغولی به فغوله فرمان با پدیده خلافت عربی اسلامی فراورده تازه‌ای به نام سلطنت که ای در ایران نداشت پا به میدان قدرت گذاشت. برایند بینش ایلی قبیله ای ترکان و مغولان اسویی و همچنین ایده مذهبی خلافت خدا بر روی زمین که در امیر مؤمنان نمود می به پیدایش یک نهاد نوین قدرت در ایران به نام سلطنت انجامید بنابر این دیدگاه یک فرمانروای دارای حقانیت سلطانی است به هیچ محدودیتی اختیار جان و مال رعیت را داراست و اراده او بالاتر از هر اصل و ارزشی جای میگیرد دو ویژگی شایسته سالاری و همچنین تمرکز جغرافیایی قدرت که در سرشت نظریه شهریاری ایران بود در ساختار دولت این دوره رنگ باخت برخی از کسانی که اختیار جان و مال مردم را در دست گرفتند تا چندی پیش از آن قلام یا غلامزاده بودند و نه تنها از آموزش و پرورش درستی برخوردار نشده بودند بلکه گاهی اغده ها و زخم‌های روانی سنگینی نیز از دوران کودکیان و جوانی خیش به همراه داشتند گرچه خشونت هایی که از چیره شدن این قبایل و فرات ایران تا همین صده گذشته از سوی دولت ها نصده به مردم اعمال شد پیرو سیاست حراسفکنی در کشور برای نگه قدرت بود ولی نمی شود بخشی از آن دو و خونریزی های چندشاور را زاییده بیماری های روانی و شخصیتی برخی از زمامداران ندانست پانویس تنها بیست وزیر و دبیر گرانپایه در دوره فرمانروایی روای ترکمنان سلجوقی از میان رفتند. در پیش از آفند مغولان که خلافت عباسی را سرنگون نمود، سلطان با فرمان و خلعتی پشتیبانی معنوی را از خلیفه وقت مسلمانان دریافت می‌نمود و در برابر این پشتگرمی بخشی از دارایی‌هایی که از مردم به هر گونه میستاند به کانون خلافت می‌فرستاد. پس از حمله مغل، تصرف بغداد و کشتن خلیفه وقت عباسی نظریه خلافت به گوشه رانده شد ولی سلطنت همچنان به عنوان سنتی نهادین شده بر جای ماند. همین سلطنت بی اصل و ریشه که پایبند هیچ قانون و ای نبود و خود را ناچار به مراعات هیچ ارزشی نمیدانست، در صداهای پسین در نزد غربیان چهره بیدادگرانه از فرمان روا و فرمان روایی در مشرق زمین ارائه نمود. از این روست که چهره یک سلطان شرقی در نزد اندیشمندان، نویسندگان و دولتمردان باختر زمین با خودکامگی، سرکوب، فساد و ترس و تهدید همراه شد. آنچه در درازای یک دوره 900 ساله از غزنویان تا انقلاب مشروطه گواه بوده این بیشتر یک خودکامگی افسار گسیخته بر بنیاد ایجاد ترس و حراس از سوی فرمانروا بر جامعه بوده است. حتی سخن از یک استبداد ساماندار و قانونمند یا حتی بدقانون از سوی دولت و دستگاه دیوان سالاری آن نبود بلکه اوج ناامنی و ناپایداری پدید آمده از سوی سلطان سردار و یا امیری بود که خود بزرگترین شکننده عرف و هنجار جامعه بوده است. از این رو سلطان در این دوره از تاریخ ایران نه فقط قدرت قانونگذاری بلکه قدرت مطلق اعمال بیقانونی را نیز در انحصار داشته است. میرزا فتلی آخونزاده از پیشتازان جریان نوآینی یا مدرنیته در پیش از انقلاب مشروطه در نامه‌ای که به جلال دی میرزا می نویسد به روشنی این ویژگی سلطنت را بیان می‌دارد. به اصطلاح اروپایی واژه پادشاه به کسی اطلاق می شود که تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکر تربیت و ترقی ملت باشد در مملکت ایران پس از غلبه تازیان و زوال دولت پارسیان سلطنت حقیقی نبوده است. در مدت تاریخ هجری فرمان این مملکت کلن دیسپوت و شبیه حرامیان بودند. در اینجا آخونزاده نه تنها تفاوت گوهرین پادشاه مشروطه اروپایی و سلطان خودکامه شرقی را به روشنی بیان می کند بلکه شاهی در پیش از زوال دولت‌های ایرانی را کاملاً متمایز از سلطنت‌های پس از اسلام می‌داند دیگر روشنندی آن زمان میرزا آقاخانی کرمانی با تیزبینی ستایش‌آمیز تفاوت شاه در فرهنگ ایران شهری و سلطان دوره اسلامی ایران را دریافته و این گونه می‌نویسد از استیلای عرب بر عجم که قانون پادشاهی پارس و نظام و فرهنگ از میان رفته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 در نبود نظریه شهریاری یا شاه آرمانی در دوره اسلامی نهاد وزارت یگانه نهادی بود که میکوشید در زمانهای آشفتگی کشور بر پایه مساله ملی عمل نماید و سلطنت را که جانشین نهاد پادشاهی گشته بود به پاسداشت مساله کشور وا دارد وزارت در ایران باستان نقش پررنگی در کشورداری و تدبیر کارهای مردم داشت با بهرهگیری نیروهای کارآمد و نخبه در نهاد وزارت به عنوان عقل منفصل شهریاری امور کشور از دانش آگاهی و دوراندیشی توهی نبود. گزنفون در کتاب آموزش کوروش بر آن است که در زمان حخامنشیان تصمیمات مهم در شورای ریشسفیدان که گردهمایی از وزیران و دبیران و سرداران کارازموده بودند گرفته میشد و شاهنشاه هم پیرو رایزنی های آن شورا بود. در دوره کیانیان از فرزانه ای به نام اوشنر در فروردین یشت اوستا به عنوان وزیر کاردان و هوشیار کیکاووس یاد شده است که با کارهای نادرست کاووس مخالفت می کرد. همچنین در شاهنامه اوستا از وزیر خردمند گوشتاس به کیانی یعنی جاماسپ یاد شده است. در ایران ساسانی، وزیران کاردان و خردمندی را سراغ داریم که نشان می دهد سنت ایجاد توازن نسبی قدرت در ایران پیشینه درازی دارد. اردشیر پاپکان با گماردن ابرسام به عنوان وزیر بزرگ نشان داد که به این سنت خجسته پایبند و باورمند است. بهرام گور به وزیر توانمند خود مهر نرسی وابسته بود. شاه قباد مرد شایستهای چون سخرا را در جایگاه وزارت خیش گماشته بود و روان دانشمند فرزانهای چون بزرگمهر را در کنار خود داشت ابن خلدون اهمیت جایگاه وزارت را از نگاه این اینگونه بیان میکند کشور به سپاه و سپاه به دارایی و دارایی به خراج و خراج به آبادانی و آبادانی به داد استوار گردد و داد وابسته به درست کرداری کارگزاران و درست کرداری کارگزاران وابسته به راست کرداری وزیران است. و برتر از همه، پژوهش پادشاه از چگونگی زندگی مردم به تن و توانایی وی بر رهبری کردن است تا او فرمانروای روای مردم گردد نه آنان بر او چیره شوند. در کتاب جاویدان خرد رایزنی با وزیر راست کردار پیش نیاز انجام درست کارهای کشور است و یکی از ویژگی های اندیشه سیاسی ایران شهری است. حکم این سخنان راست نمی شود جز به تدبیر ثواب و تدبیر ثواب به هم نمی رسد جز به مشورت کردن و ری زدن و رأی زدن باید با وزیران مخلص و ناسه باشد. نقش وزارت در کنترل قدرت و در کشورگردانی از ایران باستان به میراث مانده بود ولی در دوره اسلامی با سلطان شدن شاه اهمیت این نهاد برای تعدیل خودکامگی سلطان و نیکندیشی کارهای ملک و ملت آشکارتر شد. پاره ای از اندرس های فرمان در دوره اسلامی رنگ و بوی جایگزین شدن شاه با سلطان را آشکارا نشان میدهند. خاجر نظام الملک در فضای سیاسی موجود در زمان سلطان سلجوقی این چنین پند می دهد. ندیم باید موافق پادشاهان باشد و هرچه پادشاه گوید و کند احسنت بر زبان آرد و معلمی نکند که سلاطین را دشوار آید و کراهت کند به آن نباید کرد و آن چرا کردی. این پندی بود که برای نگهداشت جان و جایگاه نزدیکان سلطان سودمند بود ولی فرهنگ بله را تشویق نمی‌نمود و به جای وزیر و رایزن در پیرامون شاه بیدار آفیت طلب و سودجو در کنار سلطان خیره سر نگه می‌داشت همزمان بر روی کار آمدن صفویه در ایران ماکیوولی در بخش چهارم کتاب شهریار خود می‌نویسد که در ممالک شرقی شهریار به یاری وزیرانی چاکرمنش حکومت می‌کند که مقام خود را به لطف و اجازه او مدیونند و حال که در ممالک غربی شهریار به نیروی اشراف و بزرگزادگان تکیه دارد که مقام خود را نه به حکم او بلکه به اعتبار قدمت تبارشان احراس کرده کردهاند. از آنجا که نهاد وزارت نیز در آن دور جایگاه والای خود را از دست داده بود و وزیران به چیزی در اندازه پیشکاران یا میزا به نوویان سلاتین و امیران افت کرده بودند سخن ماکیولین نشانگر دریافت و از بودن کمایگان و بیماگان در پیرامون سلطان شرقی به عنوان پیشکار و رایزن بوده است. این به راستی نشانه روشنی از خاموش شدن با پسین شله اندیشه سیاسی و تدبیر امور کشور در خاورزمین و از جمله در ایران، از دیدگاه بیگانگان بوده است. گفته شد با آمدن ترکان آسیای میانه به فلات ایران و دستیافتن آنان به قدرت که با برانگیختگی و پشیبانی خلافت اسلامی نیز همراه شد، اندیشه سیاسی ایران شهری جای خود را به سلطنت مطلقه داد. افسون بران از آغاز صفویه با بیرنگ شدن جایگاه وزیر در معادلات قدرت سلطان به تنها نهاد تصمیم گیری در کشور بدل شد که در برابرش هیچ نیروی قامت نمی برکشیده شدن تشیع و تصوف و مشروعیت گرفتن سلطان صفوی از این دو، افزون بر رهبری سیاسی و سپاهی برایش سروری و چیرگی معنوی و دینی و اخلاقی نیز به همراه آورد. بدین گونه سلطان دارای اختیارات بیمرز گردید و هیچ نهادی توان پاسخخواهی از او را در هیچ زمینه ای نداشت. هرچند صفویان واژه شاه را به جای سلطان به دامنه واژگان سیاسی ایران برگرداندند، ولی از دیدگاه درون مایه و گوهر این نهاد خمیر مایه آن همان سلطنت پیشین بود و از خاصگاه نظری شهریاری توهی بود. همچنان که گفته شد در دوره اسلامی سلطنت عمدهترین و در برخی زمانها تنها نهاد سیاسی ایران به شمار میآمد. ولی در دوره های کوتاهی وزیرانی نیز پا به بهنه دیوان سالاری گذاشتند که کوشیدند وزارت را به عنوان نهادی در کنار سلطنت و با استقلال نسبی از آن به نهاد متولی دامنه مساله ملی دگرسان کنند. چنین کوشش هایی ویژه با خاج نظام توسی در فرمانروایی سلجوقیان و خاج رشید و فضل الله حمدانی در روزگار مغلان به فرازهایی رسید. در دوره اسلامی درگیری های میان سلطان و وزیر به از میان رفتن بیشتر از صد وزیر و در برخی از موارد نابودی خانواده های آنها انجامید. وزیران در درازای تاریخ پرفراز و نشیب ایران از آغاز تا پیش از صفویه نه تنها مردان سیاست و تدبیر بودند بلکه بیشتر آنان دانشمندان اصر خیش شمرده شدند و همچنین دستی در دبیری و سخنوری داشتند از میان بردن بزرگانی که در جایگاه وزارت در پاره های زمانی گوناگون کوشیدن که نگاه خردمندانه و سازنده به مقوله کشورداری و تدبیر امور ملت داشته باشند به فرمان سلاتین و گاهی خلفای وقت نشانگر آشکار نبود امنیت در رده های بالای تصمیم های کشوری و یک بودن رهبر خودکامه در قانون شکنی و پیمان شکنی بوده است، از فضلبن سحل سرخسی وزیر ایرانگرای معمون عباسی و احمد اسفراینی وزیر ایران دوست سامانیان و خانواده برمکی در عهد هارون و رشید گرفته تا قائم مقام فراهانی بزرگ یا همان میرزایی سا در زمان فتلی شاه قاجار قائم مقام فراهانی یا میرزا ابوالقاسم در سلطنت می محمد شاه و میرزا خان امیر کبیر در سالهای آغازین عهد ناصری نمونه از این دست وزیرانی بودند که کوشیدند تا به سامان کردن کارهای کشور بپردازند و زندگی خیش را بر سر این از کف دادند تا بار دیگر روشن شود که سلطان در خودکامگی و بیداد هیچ مرز و محدودیتی ندارد و به هیچ سامان و هنجاری پایبند نمی ماند حتی اگر قانون و نادرست زمان خود او باشد. پانویس وزیران در درازای تاریخ پر فراز و نشیب ایران از آغاز تا پیش از صفویه نه تنها مردان سیاست و تدبیر بودند بلکه بیشتر آنان دانشمند اصرخیش نیز شمرده می شدند و همچنین دستی بر دبیری و سخنوری نیز داشتند. نگاهی به فهرست وزیران صده دهم ده تا پانزدهم میلادی پشتوان این اداس، فضل ابن سهل سرخسی وزیر ایرانگرای معمون عباسی ابوالفضل عب بلعمی وزیر و تاریخنگار سامانیان عبو علی بلعمی وزیر سامانیان فضل احمد اسفراینی وزیر ایران دوست سامانیان و محمود غزنوی عبوریحان بیرونی وزیر و دانشمند زمان محمود غزنوی خاج نظام الملک توسی وزیر و دانشمند سلجوقیان خاجه رشید وتوات وزیر خارز شاهیان، خاج نسیر توسی وزیر و دانشمند دوره هلاکو، خاجه رشید الدین فضل الله همدانی و اتا ملک جوینی وزیران ایلخانیان مغول. کنار رفتن جایگاه شاهی، و جایگزین شدن آن با نهاد سلطنت پیامد ویرانگر و زیانبار دیگری نیز برای ایران شهر به همراه داشت و آن از میان رفتن پهلوانان یا بزرگان محلی از خانواده‌های نژاده در کشور بود در شاهنامه وجود نیروی مقتدری در کنار سامانی شاهی دیده می‌شد و آن هم جایگاه پهلوانی بود این نهاد در دوره حماسی شاهنامه نقش نهاد وزارت را که خالی بود پر می‌کرد پهلوانان همانند سام، زال، رستم، گودرز، گیو و بهرام همواره در راستای نگهداشت داشت کیانی کشور و صلاح ملک و ملت گام برمی داشتند ولی شخصیتی مستقل از پایگاه شهریاری داشتند. گرچه پشتیبانان نهاد شاهنشاهی بودند ولی گاهی نکوهش کننده شاه و پیشگیرنده نابخردی ها و بی او در کشورداری نیز بودند. اینان راستی تدیل کننده قدرت شاه در کشور بودند و این از ویژگی های برجسته سنت ایران شهری در کشورداری و جهان آرایی بود. پهلوانان از آنچنان استقلال چشمگیری برخوردار بودند که در پاره زمانها از فرمان شاه سرپیچی می کردند. بنابراین پهلوانان از پایگاه شاهی به عنوان نماد یک پارچگی کشور پدافند می کردند، نه از شخص شاه. پهلبانان در شاهنامه نه تنها از نبود شاه در کشور مانند گرفتار شدن که در مازندران و یا هاماوران در راستای قبض کردن قدرت برای خیش بهره نمی گرفتند بلکه امنیت و آسودگی را به ایران شهر بر می گردندند و برای بازگرداندن شاه به کشور میکوشیدند. چون غزر شد از بخت بیدادگر به پایان اندر رای پدر همه مهتران سام را خواستند همان تخت فیروزه آراستند بر آن مهتران گفت هرگز مباد که جان سپه بود کند تاج یاد نمونه دیگر آن بود که در زمانی که پیروز شاه ساسانی در جنگ با هپتالیان کشته شد سوخرا که بزرگ سیستان بود نگذاشت که کشور به گرداب بلوا و آشوب بیفتد و با خردمندی و نیک خواهی پا پیشنهاد و کشور را نگه داشت و حتی برای آزاد نمودن اسیران و مالهایی از دست رفته کوشش نمود و آنها را از هپتالیان بازپس گرفت. شوربختان سنت ناپسند و ویران کننده نبرد میان سرداران یا پهلوانان و شاهان در اواخر ساسانیان با شورش بهرام چوبین سردار برازنده ایران شهر بر علیه تاج و تخت ساسانی آغاز شد. خسرو پرویز با سربنیست کردن افسران شایسته خود به این بدعت ناخجسته دامن زد. این روند در دوره اسلامی گاهی به نمایشی از حراس و وحشت بیمرز انجامید. کودتای سرداران نیرومند بر علیه سلطان وقت از سوی و از میان بردن سرداران کار آمد به فرمان سلطان نگران از سوی دیگر. در نبود پهلبانان که در دوره اسلامی با سرداران جایگزین شدند و در فتور و شکنندگی جایگاه وزارت و دستگاه دیوار سالاری در دوره اسلامی تاریخ ایران سلاتین بی ریشه و بی هویت که پشتیبانی ایل یا مجموعی از ایلات را با خود همراه داشتند یک کتاز پهنه قدرت در ایران شده بودند و هیچ مانع و صدی را در برابر خودکامگی، هوسرانی خشم، خیرسری و نابخردی های خیش تاب نمی آوردند. دوم، بی اعتبار شدن مالکیت. ایران در برابر تاخت و تاسهای بیابانگردان به ویژه در دوران پسا اسلامیش بسیار آسیب پذیر بوده است، پس از حمله عرب مسلمان به ایران در صد هفتم که از سوی باختر انجام گرفت، یورش های صحراگرد ترک و ترکمن و مغول و ازبک از سوی شمال خالی رخ داد. فارغ از اینکه از چه سمت و سوی این آفندها انجام پذیرفت، نه تنها به بیرانی مدنی همه فلات ایران می انجامید بلکه آسیب شگرفی بر پیکر اندیشو و منش ایرانیان وارد مینمود. نبود امنیت اجتماعی در پی این تاخت و تازها در رازای هزار سال گذشته تا همین روزگار رضاشاهی به مخدوش شدن حق مالکیت و تا اندازه از میان رفتن آن در کشور انجامید. با چیرگی یک سردار بر بخشی از کشور و کنار زدن زمامدار پیشین و یا چیرگی یک قبیله بر منطقه ای همچنان که جانها پرپر میشد دارایی و املاک نیز دست به دست میگشت. بدینگو امنیت جانی و مالی به پایینترین رده خود می رسید. یک نظام حقوقی نمی به وجود بیاید زیرا هیچ دوره آن اندازه نمی پایید که سامان و هنجاری ریشه بدواند تا دستگاه دیوان سالاری آبرومندی به تواند کشور را به سامان کند. نبود امنیت مالکیت خصوصی افراد بر زمین های کشاورزی و یا کالاهای بازرگانی در هزار سال گذشته به پدید نیامدن اشرافیت مستقل انجامید. صد البته رده مستقل شهری هم شکل نگرفت. اشرافیت برجسته و با که در همه تاریخ ایران پیش از اسلام به جز سالهای پایانی ساسانیان نقش به سزایی در موازنه قدرت تعدیل امور و نظارت بر شاه و وزیرانش داشت در دوران پسا اسلامی به ویژه پس از ورود ترکان و مغولان به ایران ریشکند شد. این رده پر اهمیت که در قالب خانواده های برجسته و صاحب نفوزی چون دودمان های سورن، کارن، اسفندیار، مهران، گنارنگ در متون تاریخی و همچنین در پیکر پهلوانان دودمان های سام نریمان، گودرز کشواد و نوزر در هماسه ملی جلوه گرمی شدند، قایبان بزرگ پهنه سیاسی و اجتماعی ایران در صده دهم ده تا بیستم بودند. سنت ترکی مغولی اهدای زمین از سوی سلطان به برخی وابستگانش برای نگهداشتن وفاداری آنان به سلطان که تیول نام داشت با پسین های اشرافیت سنتی و ریشه کشور را گرفت و مانده آنان را با تازه به دوران رسیده هایی که همه چیز خود را از سلطان وقت داشتند جایگزین نمود اینجا دیگر چشمداشت استقلال عمل و نیکرعی و دوراندیشی در کشورداری از این رده نوین بیهوده بود. آنچه از آنان برمیآمد در بهترین حالتش نگهداشت خودشان و منافعشان در برابر خودکامگی و خیرسریهای سلطان و یا طوفانهای برامده از تاج و تخت بیگانگان به ایران زمین بود. نه تنها نبود اشرافیت نژاد و آبرومند در بخش‌های دور و نزدیک کشور بلکه ناپدید شدن نهاد برجسته وزارت از آغاز صفویان در آغاز سده هم به این وضعیت آشفته و ناپایدار که هیچ چیز و هیچ کس مالک و دارنده چیزی نبود مگر به اراده سلطان دامن زد دیگر عاملی که از ساخت اشرافیت مستقل و همچنین شکل گیری رده شهرنشین جلوگیری نمود، ایلات و اشایر کوچ کننده به پشته ایران بودند. به دلیل کم‌آب بودن این فلات، بخشی از جمعیت ناچار به کوچهای تابستانی و زمستانی بودند و چاره‌ای جز گلداری برای گرداندن چرخهای اقتصادی خیش نداشتند. نیاز به چراگاه و آب برای دام، اینان را از یک جانشینی و دارا شدن زمین بی‌بهره نمود. چه ناچار به پیوسته از بخشی از کشور به بخش دیگر بودند؟ اشرافیت بر پایه دارا بودن زمین های بزرگ کشاورزی می توانست پای بگیرد و شهرنشینی نیز بر بنیاد یکشانشینی شکل پذیر می بود. زندگی ایلاتی هیچ کدام از این دو پدیده را نمی توانست ایجاد کند. در پی آن، به جای اینکه زمینداران کلان به عنوان نیروهای تعدیل کنندهای در برابر قدرت سیاسی یعنی سلطان پدیدار شوند، ایلات دلاور و مسلح خود عامل تهدید و یا ویرانسازی شهرها و استانهای همسایه میگشتند. نداشتن امنیت اجتماعی و خدشدار نمودن پیوسته مالکیت خصوصی که پیامد سلطنت بیدادگرانه و همچنین تخت و تاز کوچنشینان نشینان در پهنه ایران بود، از پدید آمدن یک ساختار سیاسی تندرست و قابل پیش بینی جلوگیری نمود و به آفرینش محیط حراس و ترس و ناامنی دامن زد. روشن است که از دل چنین شرایطی نه پیوند منطقی و سازنده میان حکومت و رعیت ایجاد می شود و نه اصولا کسی یا این را دارد که در پی اندیشیدن برای بهین سازی روش ها و دیدگاه های اداره کشور باشد، جستار قدرت و خواستگاه آن که از بحث های بنیادین اندیشه سیاسی می باشد نه در محیط هراسناک و ناپایدار و نه در زندگی کوشنشینی پدیدار و بالنده میشد. در همریختگی پیوسته در زندگی شهری و آزار و کشدار شهرنشینان و ترس و حراس دبیران، وزیران بزرگان اشراف و فرزانگان از رئیس حکومت و نیروی بی جایی به مطرح شدن هیچ اندیشه‌ای به سیاسی نمیداد و روند زبان آن را پر شتابتر مینمود. سوم گسترش تصوف اعرفان و صوفیگری، هرچند این دو کاملا مترادف نیستند پیشینه روشن و انکار نشدنی در ایران پیش از اسلام داشت. آیین مانی نمونه خوبی از وجود نگرش های صوفی در ایران پیش از اسلام بوده است که در میان ایرانیان و غیر ایرانیان پایگاهی هم برای خود دست و پا کرد ولی به هیچ روی به جایگاه جریان چیره فکری و اجتماعی در ایران شهر دست نیافت. آینه بودا است که در بخش‌های از شمال خاوری کشور پایگاه داشت در برگیرنده مایه های و صوفیانه بود. در اینجا نمود پررنگ و نیرومند این نهله فکری دوره پسا اسلامی بند نظر ماست، چون تأثیر آن در روان تبار ایرانی و در زندگی اجتماعی ما در 800 سال گذشته سرنوشت ساز و چشمگیر بوده است، اینکه بیوفایی روزگار و بی‌اعتبار انگاشتن زندگی به ویژه در دوره‌های شکست و ناتوانی ملی بر روان ملت ها چیره می شود نیست و پیش بینی آن نیز دشوار نیست. ملتی هستیم که بیشتر 1400 ساله گذشته را در دوره‌های ناامیدی و سرخوردگی به سر برده ایم که پیامدش پا گرفتن شاید غنیترین و افسونگرترین ادبیات عرفانی جهان و ترین موسیقی های موسیقی‌های ملت ملت‌های جهان شده است خونیاگری و ادبیاتی که برای مرهم گذاشتن به زخم همه شکست‌خوردگان تاریخ و ناامیدان جهان هم بس است از آنجا که در آن زمان بجو سوفیگری و گرایش‌های های ارفانی پناه دیگری برای آسیب دیدگان اجتماعی و قربانیان خشونت و بیداد وجود نداشت، مردم به تصوف روی خوش نشان دادند. ارفان در آغاز پیدایش به خاطر خصوصی کردن دین و کوشش در راستای نزدیکی بیمیانجی انسان و خدا کششی برای برخی مردم پمراه داشت که آن را از شریعت رسمی تعمل پذیرتر می کرد. به آرامی ویژگی اندیشه گریزانه و حتی خرد ستیزانه تصوف و عرفان تغییر شکل یافته و گشت و خود دیواری برای جلوگیری از اندیشیدن و سازندگی شد. افکار صوفی منشانه و زندگی گریزانه رشد یافت و عرفان اسلامی و درویشیگری بخش بزرگی از ایرانیان را از زندگی دوستی و امید به با آینده باز داشت. ارزش ناب ایرانی آباسازی گیتی برآمد از نگاه همراهی و همگامی انسان با اهورامزدا برای ساختن جهانی بهتر دیگر ارزش به شما نمی رفت که هیچ بلکه ضد ارزش هم انگاشته میشد نیاز به است که هرچند گرایش های صوفیانه به خودی خود منفی و زده فرهنگی نیستند، ولی هنگامی که توسط بخیر رندان مورد بهرهگیری ابزاری قرار می‌گیرند و یا به دست نادانان به ابتزال می افتند، مایه بدبختی های فردی و همگانی می‌شوند. تصوف و عرفان به جای نهادینه کردن پارسایی و پرهیزگاری، و دور نگه داشتن انسان از رشک و آز و نیاز سبب بیارجی کار و کارگر بیارزشی ساخت و ساز، بیتوجهی به کارهای روز جامعه و پدید آمدن ویژگی های ویرانگر تنپروری، نامیدی، خیال بافی و پذیرفتن آسان شکست شد. پانویس در هند نیز همین نگرش‌های های صوفیانه راز تسلیم ملت هند در برابر بیگانگان در صده های اخیر بوده است. با قشری شدن بیش از پیش دین توسط انصار ترک، برآمده از آسیای میانه و رشد و گسترش تصوف و عرفان انحرافی که پیامد ویرانی های پیدرپه پی شهرها از میان رفتن امنیت اجتماعی نبود سازندگی و آبادانی و نامی شدن از اکنون آینده زندگی انسان در این جهان بود اندیشه های سازنده ایران شهری از میان سرآمدان جامعه رخت بربست و ایران به انجماد فکری و سرانجام به زوال اخلاقی افتاد برخی جریان تصوف و عرفان اسلامی را واکنش بخشی از نخبگان جوامع مسلمان شده به خشک اندیشی و استبداد موجود در مذهب میدانند می توان پذیرفت که طریقت نخست در برابر شریعت ایستاد و از خوشونت و آن کاست، ولی سپس آن پدیده‌ای که بنا بود تجربه شخصی و یا سلوک عاشقانه به سوی خدا یا ذات مطلق هستی باشد به ابتزال مرید و مرادی و گذافگوی بیمارگونه و دشمنی های بی انتهای و سلسله‌های بزرگ و کوچک درویش فرو افتاد رقابتی که اوج زشتی و نابخردی آن در دعواهای حیدری نمتی در تاریخ اجتماعی ایران هویداست سازی آن انداز رونق یافت که شمار های کوچک و بزرگ به 200 هم رسید سعدی درباره سرگذشت تصوف و مبتزلگشتن گشتن آن می گوید یکی از مشایخ شام از حقیقت تصوف گفت پیش از این طایفه ای در جهان بودند به صورت پریشان و به معنی جمع. اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان. رشک و دشمنی که میان فرقه های صوفیگری در جریان بود به مسابقه ای در خیرت ستیزی و بیباوری به منطق و دانش انجامید و بیش از پیش اندیشه برزی و خیرت گرایی را در کشور تعطیل نمود. آرفان اینی و و خوشسرشت در میان خیل صوفیان پرشمار نبودند همچنان که روحانیان وابسته و پاکنه ها در برابر خیل شریعتمداران و دکانداران دین اندک بودند. بیگمان جهانگریزی منفعل در تصوف و عرفان برای سلاطین مغول و فرمانروایان پس از آنان بسیار کارآمد بود چون در پیوند با حقانیت فرمانروایان برای چیرگی بر مردم و های مانند دادگستری و آبادگری صدایی از این نحله فکری بر علیه حکومت در نمیآمد. در دوره آغازین پیدایش عرفان عارفانی همچون منصور حلاج به فرمان فرمانروایان و برخاست شریعتمداران کشته شدند ولی پس از سالیانی چند خود قدرت سیاسی به پشتیبانی از اهل طریقت پرداخت از این رو برخی فرمانروایان محلی به ساختن خانقاه دست زدند مانند خانقاهی که قازانخان در تبریز یا الجایتو در قزوین و همدان برپا کردند همچنین وزیرانی همچون خاج رشیدالدین دین فضل الله و پسرش قیاس به ترتیب در قزوین و در سرخاب تبریز خانقاهایی ساختند. سرشناسترین و محبوبترین عارف ایرانی مولوی بلخی کسانی را که میکوشیدن در پهنه خرد زیست نمایند و اهل آوردن استدلال و برهان برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به انسان سامان آفرینش و طبیعت بودند را نکوهش میکند و آنان را فریب خورده میداند شبهه ها انگیزدان شیطان دون در فتند این جمله کوران سرنگون پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. بدین گونه از دیدگاه این عارف نامدار، آنان که اهل استدلال و برهان هستند، مانند انسان هایی که پایشان مصنوعی است به هیچ جا نمی رسند، پسیشان برام می شود که با کنار گذاشتن عقلانیت و اندیش ورزی راه شور و جنون را در پیش گیرد. مولوی همچنین گفته است زکار افضایی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حلولی دیگر عارف برجسته ایرانی شبستری هم چنین گفته است آقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند از این دست نشانه های خاشموردن اندیشه ورزی و خردگرایی در نزد بزرگان عرفان و تصوف بسیار است که پرداختن به آنان از حوصله این نوشتار بیرون است. آنچه روشن است در فضایی که اندیشیدن و به کارگیری عقل سلیم یا خرد نکوهش می شود جایی برای بالندگی اندیشه سیاسی که در پیوند با گرداندن امور این جهانی مردم و رسیدگی به امور همگانیست است در مجموع پس از چیرگی عنصر ترکی مغولی شعر فارسی که روزگاری سرچشمه امید و زندگانی و خورمی بود تا اندوزه‌ای به خدمت تصوف و عرفان درآمد و در موارد پرشماری جلوگاه بیاخلاقی و خردگریزی گشت زوال و فروپاشی اجتماعی را می شود در ادبیات ویژه آن روزگار دریافت همچنان که یکی از اندیشمندان همروزگارمان می‌نویسد ایرانیان توان فهم مناسباتی را که بر آنان تحمیل میشد، از دست داده بودند پناه جستن در ادب فارسی و نیز عرفان مبتزل که با یورش مغولان ابعاد ای پیدا کرده بود به منزله چاره چیرگی بیرونی برای افتادن در تباهی اخلاقی و معنوی بود ولی گویی که واپسین گریزگاه نیز به شمار میآمد. نگاهی به شاهکارهای ادبیه پس از سده 13 میلادی مانند کارهای سعدی و قیاس آن با شاهکار صده دهم میلادی یعنی شاهنامه تفاوت گوهرین چشمگیری از منش و بینش ایرانی را به نمایش میگذارد. در شاهنامه با انسان سوار سر سرکار داریم و در بوستان سعدی با انسان پیاده شده. این دویست و هفتاد سال بسیار پر حادثه طرز تفکر و برخورد و دید را نسبت به مسائل متفاوت کرد ولی مسائل همانها هستند انسانها چون تفاوت کرده اند باید با دو زبان با آنها حرف زد که زبان فردوسی باشد و زبان سعدی سعدی در جرگه عارفان و سوفیان جای نمی گرفت ولی حکایات شیرینی که در گلستان آورده است نشانگر فضای مماشات، آفیت طلبی، سازشکاری و تسلیم است که در آن روزگار بر کشور چیره بوده است این یک گردش چشمگیر از نگاه روزگار دوران فردوسی به انسان و پیرامون انسان را به نمایش می‌گذارد. اصر عصر فردوسی که هنوز فروزه های فرهنگ ایران شهری در کشور تابناک بود. زندگی دوستی، شاد زیستی، دهشمندی، آزادگی، میهنپرستی و ایستادن در پای نام و ننگ. هنگامی که پرداختن به زندگی این جهانی انسانها گیتیارایی و کشورداری بی ارش شود سیاست ورزی نیز جایگاهی نخواهد داشت. در این چنین کشوری سیاست می شود زههرشش گرفتن از کوچک و بزرگ زد و بند دروغ، درویی، حس بزرگان و نخبگان. آنچه که به کار نیاید انجیش ورزی و پایبندی به اصولی روشن و ریشهدار در زمینه گرداندن کارهای کلان جامعه است. نفوذ عرفان اسلامی و تصوف مردم را از گیتی و امور زمینی بازداشت و حکومتها نیز این پدیده را پسندیدند چه در برابر زندگی روزمره ملت نیاز به پاسخگویی چندانی نداشتند. آشکار است که این گونه جوامع نیازمندی سیاسی ندارند چندیش سیاسی ایران شهری باشد چه نظریه دیگری برآیند فراز جستارهایی که در این دفتر به خوانندگان گرامی ارائه شد میتواند بدین گونه فشرده و بازنویسی گردد یکم، رونسانس یا نوزایی ایرانی در پی سامان دادن به رستاخیز فراگیر فرهنگی و اجتماعی بن بر بنیاد بنمایه های اندیشه و منش ایران شهری در راستای نجات ایرانیان از فقر فرهنگی، تباهی اجتماعی و عقب ماندگی اقتصادی است. با برکشیدن مفاهیم ارزشمندی چون خردگرایی، دادگری و آبادسازی در پهنه اندیشه و ویژگی های ارزنده منش ایران شهری چون آزادگی، شادزیستی، رواداری و دهشمندی که شوربختانه تا اندازه از جامعه ایرانی رخت بربستهاند، اند می توان مدرنیته ایرانی را که فراورده فرایند رانسانس ایرانی است، پیرخت. دوم، فرهنگ ایران شهری که مجموعی از اندیشه و منش ایران است و ایرانیان با دارندگی آن در روزگار کهن فراز تاریخی خیش را اند در شاهنامه، اوستا متون کوهن پهلوی و سنگ حخامنشی و ساسانی میتواند جستجو شود. فرهنگی که بر بنیاد آموزه‌های های برجسته و زندگی سازی، چون خردگرایی، دادگستری، آباسازی، رواداری، آزادگی، شادزیستی و دهشمندی استوار بوده است می تواند باری دیگر برکشیده شود تا روان ملی ما را باسازی نماید و ما را از این بمبسته تاریخی که گرفتارش هستیم برهاند سوم اندیشه سیاسی ایران شهری مجموعه از آرا نگرشها و تجربیات سرامدان جامعه ایرانی را در درازای تاریخ کهن درباره امور بنیادین فرمانربایی و کشورگردانی در بر میگیرد و دامنه خواستگاه قدرت و توزیع آن در کشور قور و کنکاش می نماید شناخت و ارزشیابی ستونهای این اندیشه و بروز نمودن آن با شرایط پیچیده زمان کنونی می نوید بخش راهگوشایی برای بیرون آمدن از بحثهای توان فرسای صده گذشته کشورمان در پیوند با دولت و ملت باشد. چهارم فر کیانی که از پرآوازهترین ویژگی شناخته شده در اندیشه سیاسی ایران شهریست بر خراف تبلیغات معمول به هر دارنده تاج و تخت حقانیت فرمان ربایی نمی دهد. بلکه شهریاری که با دادگری و آبادگری بر کشور فرمان می‌راند، راند دارنده فر به شمار می‌آید. هنگامی که شهریاری یا دولت رویه بیداد و نابخردی را پیش می‌کرده که پیامدش ویرانی کشور و زبال زندگی مردم است، فر از او جدا می گشته و او فاقد حقانیت برای حکومت می شده است. پنجم، شاهی در ایران کهن با سلطنت که حکومتی است که در صده های اسلامی در ایران پدید آمد، تفاوت‌های بنیادین و آشکاری دارد. شهریاری با خودکامگی که ویژگی روشن سلطنت بوده است همخانی و همسویی نداشته است اگر شهریارانی در روزگار کوهن خودکامه بوده اند نقاعده که استثنا بودند حتی اگر شمارشان کم نبوده باشند زیرا خیشکاری شهریار پاستاشت داد و عرجگزاری به جان انسان بوده است ششم اردشیر پاپکان و جانشینانش با پایبندی به یکی نبودن نهاد دین و دولت در جهان بینی ایرانی با آنکه از آیین زرتشت برای پیریزی چتر باوری نیرومندی برای پدافند از کشور و آبادانی آن بهره گرفت از دین زرتشتی یک دین دولتی و از شهریاری ساسانی یک دولت دینی نساختند همراهی دین و دولت در اندیشه سیاسی ایران شهری را امروز میتوان به نیازمندی به یک دولت اخلاقگرا تعبیر نمود و در دستور کار آینده جای داد. هفتم اندیشه سیاسی ایران شهری بر بنیاد خیر همگانی است و این تفاوت دارد با اندیشه سیاسی چیره بر باختر زمین که بر پایه اراده عمومی یا دموکراسی است. حقانیت دولت‌ها در سامان دموکراتیک بر آرای اکثریت استوار است و کارکرد آنها از اهمیت نخست برخوردار نیستند. در بدترین حالت دولت ناتوان و ناشایست بخت به قدرت رسیدن دوباره را از دست می دهد. فرزانگان ایران زمین نیخواهی همگان که در برگیرنده ملت کنونی ناسهای آینده جانداران وزیست بوم ایران شهر می باشد را پایه ارزشیابی دولت میدانستند و دانستند و آن بنیاد حکومتی را سزاوار و یا ناشایست می انگاشتند. هشتم آباد کردن گیتی و بهبودی دادن به زندگی مردم خیشکاری شهریاری است. ناتوانی در انجام آن دولت را ناکار آمد و سزاوار فرو افتادن می نماید. کارای دولت ها و توان آنها برای آبادسازی نیازمند شایسته سالاری در کشور است. این مردم را از مشارکت در تصمیم گیری ها بی بهره نمی سازد. ولی برای کارهای کلان کشور تنها دیدگاه های سرآمدان و نخبگان را در خور توجه میداند. نهم اندیشه سیاسی ایران شهری بر کشوری با دولتی متمرکز و مقتدر پافشاری دارد و پخش جغرافیایی قدرت را نمیپسندد. حاکمیت ملی بخشناپذیر ناگزیر حکومت را نیز یک پارچه و نیرومند می‌خواهد دهم در دوره اسلامی تاریخ ایران، اندیشه سیاسی ایران شهری گرچه در پاره زمانها در جوهر خامه وزیران و دبیران هویدا می و گاهی در اندرزنامو و های شعر پارسی جلوه می‌نمود، ولی به دلیل از دست رفتن دولت ایرانی و یک پارچه نبودن سرزمینی برپا و پویا نبود. جایگزین شدن شاهی با سلطنت خطه‌دار شدن مالکیت خصوصی در کشور که پشتوانه اشرافیت مستقل میتوانست باشد و پدید آمدن تصوف و عرفان انحرافی نه تنها اندیشه سیاسی که اصولا اندیشیدن را در کشورمان سرکوب نمود. پایان